أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم, قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم سلم سلم از نظر ترتیب پنجا و سیومین سوره هست و این سوره ای هست که تمام آیاتش یک بار نازل شد برخلاف بقیه سوره ها که تک تک نازل شدند خیلی کم سوره داریم که یک بار یک جا مگر سوره های قصار و سوره های کوچکتر این ازون اون سوره هست که یک بار نازل شد و ما ربط این سوره را اگر بیان بکنیم با سوره های قبل از این دو ای که شما خاندید هم سوره یهود هم در سوره یونس در هر دو سوره بحث توحید بود در سوره یونس دلائل اقلی زیاد بود در سوره یهود دلایل نقلی از انبیاء متفاوت بود هر دو سوره این را ثابت میکرد که بغیر از الله عزوجل هیچ کسی را عبادت نکنید و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وإلى فمود أخاهم صالحه قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وإلى مدينا أخاهم شعيبه حميمين اعبد الله ما لكم من إله غيره أي قوم فقط يك رب را پرستش کنيد بغير از اون ديكه معبودي شما نداريد حال در سوره يوسف ميخانيم که مسئله توّهيد انقدر مهم هست انقدر اهميت دارد که يوسف عليه الصلاة والسلام در زندان هم همین تبلیغ می کرد. در زندان هم همین تبلیغ کرد. یا صاحب یه ارباب و متفرقون خیر امیل الله الواحد القهار ای دو رفیق و دو همراه زندان من. آیا رب های مختلفی را و خدایان مختلفی را ما عبادت کنیم بهتر از ام الله الواحد القهار یا خدای یگانه و قهار را؟ لذا در اونجا یوسف علیه صلی و سلام هم همین تبلیغ را کرد این یک ربط ربط دیگر این که در سوره هود خاندیم قبل از این سوره که اولا هیچ کسی به جز الله عالم الغیب نیست آخرین آیه سوره هود بود ولی الله غیب السماوات والارد غیب دان فقط و فقط الله است البته این ولی الله غیب السماوات نتیجه و حاصل کل سوره است و دوم خاندیم دانم فقط خداست و الیه یرجه و الامر کلو متصرف و مختار تمام امورم خداست غیر از خدا هیچ کسی نیست وقتی که غیر از خدا غیب دان کسی نیست متصرف و مدبر کسی نیست فعبد و پس فقط او را عبادت کن حال ما در سوره یوسف هم از این داستان یوسف چندین از کنم که نکته های خوب اعتقادی و ایمانی می گیریم از سوره یوسف یاد می گیریم که واقعا هیچ کسی عالم الغیب هم نیست مختار و متصرف هم نیست حتی انبیا نیستند یعقوب خبر نداشت که یوسف در کنار من در نزدیک کنان در چاه کنان یوسف شب را تا صبح سپری می کند غیب نمی داند و یعقوب وقتی که فرزند دل بند را از دست می هیچ کاری برایش نمی کند نه یعقوب میتونه کاری بکنه نه خود یوسف میتونه کاری بکنه معلوم میشه از این داستان و ده ها دیگه نکته ایمانی که بنده ایشالله در لابلا بحث ها میکنم معلوم میشه که غیر از خدای عزوجل اتا انبیائش نه غیب دانند نه مختار نه متصرفند دوست دارم مردم عزیز ما از این سوره زیبا کہ اللہ تعالی احسن القصص گفته، این نکات را بگیرند نکات ایمانی را و نکات اخلاقی را نکات عملی را نه ایک سری نکاتی که متاسفانه در این فیلم که درست کردن فیلم یوسف پیامبر توری تحریف شده و اصل داستان و اصل مطلبی که مراد اللہ عز و انشاءاللہ اون را برجستی خواهم کرد و خدمت شما عرض خواهم کرد اون مطلبی که مراد اللہ اون کنار گذاشته شده کل داستان شده ایک داستان عاشق و معشوق اول داستان تا آخر داستان گوی یک یوسف زیبارویی هست و یک زلیخای دنبالش هست و دیوانش هست و تا آخر پیداش میکنه و باش ازدواج میکنه و کل داستان اونجا اون, اون چیزی که در فیلم نشان داده میشه اینه در حالی که شما میخانی چند جا بحث زلیخا میاد اول و آخر دو جمعیت. ایک جا یک جا که اونجا که زلیخا میخاد که کیفته یوسف میشه میخاد که نزدیک یوسف بره یوسف را الله حفاظت میکنه یک جا اونجا آخر که زلیخا اقرار میکنه بله اشتباه مالی بود دیگه ذکری از زلیخا نیست دیگه بحثی از زلیخا نیست تو قرآن نیست تو داستان های اسرائیلیات فراوان پس بگیم که این داستان بر اساس آیات قرآن نیست این فیلم این فیلمی که درست کردن بر اساس اون روایتهای اسرائیلی هست که لا نصدق ولا نکذب نمورد تصدیق نمورد تکذیب هرچی که با قرآن تطبیق داشته باشه چرا اما هرچی غیر از آم باشه قابل قبول نیست لذا در این سوره این رابطه سوره بود که با توجب مطالبی که در سوره گذشته هست الله عزوجل در این سوره هم بیان می‌فرمایند اما شان نزول این سوره را می‌خوام خدمت شما عرض کنم چی شد که خدا تعالی این داستان را برای پیامبرش به تفصیل تعریف کرد اصلش این بود که یهودی‌های مدینه نم خدمت شما ارز کردم اینها همیشه پشت پرده و پشت صحنه بودند مشرکین مکه مشرکین بدبخت مکه می رفتند از اونها خط می گرفتند چون یک مبارزه بود با رسول الله صلی الله علیه وسلم هی از اونها خودشون علیفی بلد نبودند چیزی بلد نبودند می رفت از اونها یه سوال یاد می گرفتند می آمد مطرح می کردند اونا هم سوالات جورا جوری بیان می عجیب و غریبی بیان می کردن. یکی از سوالات این بود شما برید از این پیامبر بپرسید بگید که جای بنی اسرائیل معواه بنی اسرائیل مسکن اصلی بنی اسرائیل ملک شام بود سرزمین فلسطین بود اونجای که ابراهیم و السلام اونجا بود اسحاق بود یعقوب بود چی شد که سر از مصر در آوردند؟ آخر موسی از مصر میخواست که اینا رو چکار بکنه نجات بده به شام ببره علت چی بود چه اتفاقی افتاد که همه آمدن اینجا شام آمدند مصر آمدند چرا ملکشون را ترک کردند پس منظر این یک داستانی اون چیه لذا وقتی که این سوال را مطرح کردند الله عزوجل در جوابشون سوره یوسف را نازل کرد که سوره یوسف علاوه از این که جواب سوالشون بود، علاوه از این که جواب سوالشون بود دیگه مشخص شد چرا رفتم به شام. داستان یوسف را کسی به خانه می یعنی یانیش؟ اما در این سوره سرآپا موعظه پند نصیحت توحید کردم از کردم برداشت هایی که سوره یوسف میشه خیلی هستند این برداشتا. بازی از این برداشت‌ها به غیر از الله عالم الغیب نیست، مختار نیست، متصرف نیست، مشکل گشا نیست، حاجت روا نیست، حتی انبیا از سوره یوسف پس درس توحید هم میگیریم این دلیل نزول سوره مبارکه یوسف است. الله عزوجل می‌فرما: الف لام را این از مقطعات هست از متشابهات هست الله بهتر میدانه معنی اشرا تلک آیات الكتاب المبین این آیات آیات کتاب مبین هستن کتاب روشن قبلا خدمت شما یک قاعده اکثری ارز کردم که اگر صفت کتاب حکیم بیاید تو سر بیشتر دلایل اقلی هست اگر صفت کتاب مبین بیاید در انصور بیشتر دلایل نقلی الان در این سوره کلا داستان ان انزل الله قرانا عربيا لعلكم تعقلون ان اول فضیلت کتاب شرف کتاب و مقام ولای کتاب همان ما نازل کردیم ان کتاب را بسوره قران کی خانده میں شیب زبان عربی هست. حکمت عربیت لعلكم تعقلون تاکہ مخاطبین اول بفهمند و بعد بمخاطبین گروه دوم یعنی بجهانیان برسانند اللہ عزوجل برای این مهم عربها را انتخاب فرمود که عربها صلاحیت داشتند و دارند و صلاحیت خودشون را نشان دادند بار بار خدمت شما عرض کردم چطور در مدت کوتاهی تمام دنیا را در ظرف سی سال بعد از رسول الله نه بر قدرت شرق گذاشتن نه غرب همه جا دین خدا را بردند رسانی دند لعلكم تعقلون نحنو نقصو علیک احسن القصص ما تعریف میکنیم بر تو و قصه میکنیم بر تو بیان میکنیم احسن القصص بهترین قصه را این سوره احسان القصص هست زیبا ترین قصه هست ببینید قصه اون قصه خوب هست که برا برای ما و شما مفید باشه نافع باشه داستان هایی که اون داستانها فایده ندارند بلکه ضرر دارند خاندان اون داستان ها دنبال کردن اون داستانها ها داستان های بیشتر رمان عاشقانه بیشتر در عالم تخیل هستند واقعی هم نیستند اینا برای جوانان خیلی خطرناک هستند اینا سم هستند اصلاً افکار را ذهن را عوض میکنن در بعضی از افراد بی حیائی درست میکنند. لذا احسن القصص اون داستانی هست که مفید باشه برای ایمانت برای عملت برای تقوات برای اخلاقت ولی متاسفانه ارز کردن بعضی از این داستانه قرآنی را هم بعضی ها چنان درست کردن که یک داستانی عاشقانی درست کردن که همیشه طرف فکر چیه؟ به فکر عشق و اشق بازی هست این طور نیست احسن القصص است چرا احسن القصص است چون ما در این سوره یاد می گیریم که فیصله کامیابی و ناکامی در زمین نیست در آسمان فصله میکنه. الله فیصله میکنه. کامیاب کیے ناکام کیے در این سوره یاد می گیریم که عزت و ذلت به دست نیست عزت و زلت دست رب العالمین است تمام نقشه ها برای یوسف نقشه های چیه؟ ذلت هست به عنوان یک برده می فروشند یک پیغمبر زاده را به عنوان یک غلام اونم پول بسیار بیچ ناچیزی بی ارزشی بسمن بخص دراہم دراهم معدوده. اما خدا می برے عزیز بسرش میکنه اینجا ببین نقشه ها نقشه های ذلت نقشه های از کنم کم کردن است اما تصمیم در جای دیگه است در سوره یوسف که احسن القصص است می خوانیم که حسد وقتی که کسی حسد داشت کسی سوز دروری داشت خودش را علاج بکند و ایلا حسد رسوائش میکنه حسد بدنامش میکنه همونطور که برادران یوسف را کرد در سوره یوسف می خوانیم و یاد می گیریم احسن القصص است که صبر و استقامت بزرگترین کلیدی فرج است. هر مشکلی داشته باشی صبر کن، زندانت بینداز، صبر کن. انسان هایی که صبر می کنند، انسان هایی که استقامت می کنند، خدا عزّ به اونها چنان عزتی می ده که تکه راستای افتاده اما در دل انسانها جای دارد. در دل انسانها ها عظمت دارد هر کسی افتخار میکنه یک مصافیه بکنه لذا نشان میده سوره مبارک یوسف که صبر و استقامت چی هست کلید فرج است مفتاح فرج است و همچنین سوره یوسف سو خیلی چیزهای دیگه هستند که مفسرین نوشتند بعضی هر انشاءاللہ در لابلا برداشت ها و فقه سوره فهم سوره اون که از سوره مستفاد و برداشت میشه در آیاتی که بخوانیم ارز می کنم. اما سوره یوسف که وقتی که نازل شد در زمان این سوره وضعیت مسلمانان مکه همچون یوسف بود همونطور که یوسف تحت فشار بود یوسف در اقلیت بود رسول الله با اصحابش در اقلیت بودند تحت فشار بودند و همونطور که الله عز و جل یوسف را بیرون کردند یوسف را از چی بیرون کردند؟ از شام بیرون کردند و اونجا رفت یوسف عزیز مصر شد؟ رسول الله صلی الله علیه و را رحم وقتی که بیرون کردند نقشه کشیدند دیگه که بکشندی مجبور شد بیرون بیشه اللہ تعالی اونجا برایش حکومتی تشکیل داد اونجا حاکم تمام مسلمانان شد تمام کره زمین از نام نامی ایشون می ترسید می لرزید لذا همون طوری که یوسف بعدن برادران آمدن پیش یوسف شرمنده شدند خجل شدند یوسف همه را بخشید و فرمود لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین رسول الله صلی الله علیہ وسلم هم فاتحانه عزت سربلند وارد مکه شدند و مردم مکه سرشون رپائین انداختند رسول الله این همون جمله یوسف را فرمود لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین لذا خیلی داستان یوسف، با داستان رسول الله و با داستان مسلمانان ضعیف در مکه هم داشت. پس این سوره وقتی که نازل شد، علاوه از این که جواب سوالی اونها بود، یک مرهمی بر زخمها هم شد. مرهمی بر زخم های دلها ی شد که واقعا اونها یاد گرفتن از این سوره که خدای از و با بندگانش چیکار میکنه فقط بندگان صبر کنند رسا عزیزم برای من و شما این سوره هم میتونه درس باشه این سوره را به نیت یک داستان نخانیم به نیت یک عبرت به نیت درس گرفتن از نکت نکتش از بخش بخشش ارز کردم هم درس اعتقاد هم درس ایمان هم درس اعمال، هم درس اخلاق ، هم درس پاکی و افت. همه ما هم برادران هم خواهران میتونن بهترین درس رو بگیرن الله از زواجل ما را سیرته پاکان و بر سیرت انبیاء علیہم الصلوات والسلام زنده بدارد لذا الله می فرماید این جهت این احسن القصص است این تفسیر احسن القصص بود نحن نقص علیک احسن القصص ما بیان می بر تو زیباترین ترین بما اوحینا الیک هادا القرآن چطور زیباترین را؟ در غالب وحی خیلی سورت های وحی بود که بدون قرآن الله به پیغمبرش وحی می کرد اما این رد در غالب وحی مطلوب بما اوحینا بسبب اینکه ما وحی کردیم بسویت و این قرآن را و این کنت من قبلهی لمنالغافلین همانا قبل از این ای رسول من تبودی از بی خبران بی خبر بودی از این راستان خبر نداشتی خدا بهت خبر داد این دلیلی که تو آقیان پیغمبر خدا هستی نبی خدا هستی که به تو خبر میدهد اذ قال یوسف از این داستان آغاز میشه. اما یک نکته خدمت شما عرض کرده بودم قبلا اینجا مستاقش را عرض می کنم که الله عزوجل هر وقتی در قرآن یک داستان طولانی ذکر بکند گاهی انسان زه نش بجزیات داستان، بتوان و فصلش میره. اون درسی که باید بگیری، اون ای که باید یاد بگیری از داستان، اون نکته انسان در طول داستان فراموش میکنه. به این خاطر عادت الهی، این هست سنت الهی داستان مفصل را اول خلاصه شر اول داستان و آخر داستان رمیگه تا ما از این داستان اون چیزی که باید بگیریم بگیریم. بعدن تفصیلم بیان میکنه. کنی همین روش در سوره یوسف بکار برده شده در سوره کهف در اول داستان اصحاب کهف هم خدا همین آورده اول داستان روی صورت اجمال و خلاصه بیان کرده بعدن تفصیل و توضیح این یکی از بزرگترین روش ها هست برای تفهیم مسئله لذا الله می فرماید این اجمال داستان است اذ قال یوسف لابی زمانی که یوسف به پدرش گفت یا ابی ای پدر من انی رایت احد عشر کوكبا من در خواب دیدم 11 ستاره را والشمس و خورشید را والقمر و ماه را دیدم همه اینها را که رأيتم لی ساجدین من آنان را دیدم که به من برای من سجده کنان بودند سجده می کردم مرا همه را دیدم یعقوب علیه صلی فورا متوجه شد نبی خدا فراست دارد علم الله بهش داده علم وحی هم داشت علم تعبیر هم داشت متوجه شد که یازده تا ستاره یازده برادرند شمس پدر است، قمر مادر است گرچه بعضی میگویند مادر یوسف فوت کرده بود در وقت زائمان بنیامین فوت کرده بود این خالش هست روح المعنی روایتی آورده سدی ان القمر خالته لان امه قد قدماتت مادر اسرائیل مرده بود اما بعضی میگن نه وقتی که قرآن مادر میگه دیگه مادرش هست ابوین بالاخره پدر نصیحت میکنه فرزند را قال يا ابني لا تقصص رؤياك ای فرزند من ای پسرم من لا تقصص تعریف نکون رؤیاک خواب خودت را خواب که دیدی بر برادرانت فیکیدو لکه که دا برای تو اونها مکر می کنند معلوم میشه از قبل از قبل اونها حرکات نشان داده بودن و یعقوب علیه بیجهت سویزن نداره از سویزن پاک هستند از اینجا هم معلوم میشه بعدا هم معلوم میشه که وقتی میان تازه مطرح بکنم میگم پدر چرا به ما اتمینان نداری معلوم میشه که قبلا چند بار اینها از یوسف را خواسته بودم پدر اعتماد نکرده بود یا همراهی یوسف را یا برای کار یوسف را نه اینکه حتما همین سفر پدر اعتماد نکرده بود باور نکرده بود به این خاطر از قبل یعقوب علیه السلام حرکاتی دیده بود و ببینید این حرکات نشأت میگیره از چی؟ از حسادت انسان باید از حسادت پاک باشد دور باشد واقعا هر کسی سعی کند یک نعمتی که خدا کسی دیگه داده این همین فکر اگر من بکنم آخی خدا بیش داده اگر اون از من بهتر است خدا را بهتر کرده اگر پول بیشتر داره خدا بش داده اگر علم بیشتر داره خدا بهش داده اگر انسان هر چیزی را به خدا نسبت بده حسادت نمیاد و بعض اینها این برادران هم عجیب بودند که چرا پدر این برادران کوچک را دوست داره خب این طبیعی هست طبیعی هست بچه کوچک بل خصوص بچه که طبق روایتهایی ارز کردم مادرشون را از دست دادند این بچه مظلومه ای این بچه علاوه از اینکه خدا تعالی او را دوست داشتنی آفریده بود این مثل این میشه که یعنی از نادانی و حماقت حسادت میخواه مرز کنم مثل این میشه بچه ای کوچیکی تو را شما به بغل میگیرید دوستش دارید او را می بوسید اون بچه بزرگ که حسادت میکنه میگه تو هم پس بیا بغلم. میشه گویم 20 سال سندر سی سال سندر اون هم به بغل بگیری بحث اینه که اینها در این مسائل حسادت داشتند و این حسادت خودشون را نشون داده بودند چند دین بروز داده بودند لابود یک سری حرکاتی یک سری کاری یک سری کارگرفتنی یک سری اذیت کردنی که یعقوب این هر می دید پیغمبر خدا بود الله بهش فهم و درک بالا داده بود به این خاطر گفت که فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو و مبین بدون شک شیطان برای انسان دشمن آشکاری هست بیشتر تو پوست اونها میره رکه خب اینکه از همه کوچکتر است دارای این فضیلت لذا الله عز و جل می فرماید و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأويل الأحادیث. یعقوب یوسف گفت که ای فرزند من، این گونه تورا خدايت علی انتخاب میکند. یجتبیک بالنبووا پیغمبر قرار میده. تورا رب پیغمبر قرار میده و یعلمک من تأويل الأحادیث. بعضی گفتن این واو واو تفسیریه هست انتخاب میکنه یعنی چه یعنی به تو علمی ده. علم میده علم چی من تأویل الاحادیث تأویل الاحادیث تفسیرش چیه میدونی تأویل انجام را میگن آخر کار را میگن احادیث هم سخنان را میگوین بعضی گفتند مراد از تأویل الاحادیث تعبیر خواب است چون در تعبیر خواب کسی خواب ببیند خواب تقریبا عاقبتش را انجامش را آیندش را میگه چی میشه خوب میشه یا بد میشه پس خدای عز و جل چی یاد میده و یعلمک من تأویل به شما تأویل الاحادیث یاد میده امام مجاهد و امام سدی همین تفسیر را کردند گفتند تعویل الاحادیس یعنی تعبیر خاب امام حسن بصری رحمه الله تعویل احادیس را تفسیر میکنه به عواقب امور یعنی خدای تعالی به شما علم و فهم و درک و درایت میده که آینده نگر میشی مثلا شما ببینید بی بعدا میخانیم خابی که پادشاه دیده بود یوسف علیه السلام فقط خواب را تعریف نکرد تعبیر نکرد آینده نگری کرد مدیریت کرد گفت شما چنین کنید چنان کنید اینطور برنامه ریزی کنید سیلو درست کنید در از کنم که گندم از خوشه را گندوم ها را از خوش جدا نکنید این آینده نگری هست این دورندیشی هست این مدیریت هست پس معنای دوم تعبیل احادیس یعنی چه؟ یعنی آیندنگری از اواقب امور خوب سر در میاری و خوب برنامه ریزی می کنی و بعضی گفتن که تعویل احادیث یعنی وحیه وحی خدا بر تو نازل میکنه کتب سماوی را به یاد میده و احادیث انبیاء سابق مراد هستند انبیاء گذشته تعلیمات اونها را که خلاصش شوحی میشه همه اینها درست هستند همه را خداوند عزوجل به بیوسف علیه السلام عنایت فرمود و یتم نعمته علیك و علی آل یعقوب الله نعمت اشراق تکمیل میکند بر تو و بر آل یعقوب تکمیل کند این نعمتی که به من داده که نبوت است با تو تکمیل میشه کما اتم مها علا ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق گونه که تکمیل کرد این نعمت را بر دوتا پدرت بر ابراهیم و اسحاق اونها هم پدر نبی بود هم فرزند مرا خداوند پیغمبر قرار داده تو را هم خدا پیغمبر قرار میده ان ربك عليم حکیم بدون شک رب تو عليم هست دانا هست و کارهش با حکمت این پایان داستان دا بود تا اینجا از کردم به صورت خلاصه اجمالا همین در یک جمله در یک آیه بیان شد که خابر دید پدر تعبیر کرد و بعدا گفت که نتیجه این میشه که خدا بهت نبوت میده خدا بهت جایگاه میده عزت میده خلاصه خدا داد همون طور شد اما تفسیل قبل از اینکه تفسیر بیان جمله ما ترزه الله تعالی می فرماید لقد کان فی یوسف واخوته آیات للساائلین همانا در یوسف و برادرانش نشاناتی هست برای سائلین سائلین کی هستند همین مشرکین مکه همین ها که سوال کردن اصل سائلین یهودی های مدینه بودند اونها گفتن سوال کنید. خب نشانات زیادی برای سائلین است. اگر می ایمان بیاورند. نشانات بر حقانیت و صداقت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نشانات بر اینکه واقعاً اون چی میگوید، از وحی میگوید. ولی سائلین چون در تعصب گرفتار بودن در اناد گرفتار بودن اونها درس نگرفتند. خب حال اصل داستان و تفصیل داستان الله عزوجل فرماید اذ قالوا لیوسف و اخوهو احبوا ابينا زمانی که برادران با هم دیگه گفتند لیوسف و البته یوسف و برادرش بنیامین اون برادرش که از مادرش بود احبوا إلى ابينا بر پدر بسوی پدر محبوب تر است از ما منا از ما واقعا مرز بزرگی از حسادت ولی اینکه فرزند پیغمبر باشی نباید داشته باشی از ما چرا محبوب ترند چرا اونارو دوست دارد در حالی که و نحن عصب ما یک جماعت هستیم یک جماعت چنا جماعتی که تمام امور را ما انجام میدیم باید منت گذاری ما باشد شکر گذاری ما باشد کارهای خانه را ما انجام میدیم کارهای گلداری را ما انجام میدیم کارهای بالاخره معاش را، معیشت را درامت را ما انجام میدیم تمامی کارها را وظائف را ما انجام میدیم آب ما میاریم نان ما میاریم همه کارها را ما انجام می انجام میدیم اون تا را دوست داشته باشد لذا این در واقع علت اصلی بود حسد حسوااقیان حسد بیماری بسیار محلکی هست. تعالی تعال را از حسد نجات بده. خیلی حسودها هستند که بر حسد خودشون عمل میکنند و میروند اقدام میکنند. بیشتر مثلا دوتا فامیل با هم دیگه حسادت دارن دوتا به سرمو با هم دیگه رقابت دارن حسادت دارن این حسادت و رقابت باعث میشه که بروند و اقدام بکنن بر علیه هم دیگه گاهی هم دیگه رو میکشند به هم دیگه zarar میرسانند هم دیگه رو ضربه میزنند لذا حسادت اگر کسی دارد هر کسی خودش میفهمد علاج بکند درمان بکند علامت حسادت اینه که اون طرف وقتی که پیشرفتی کند اینجا این طرف خود به خود میسوزد این ناراحت میشه خب شما چرا ناراحت میشه؟ از شما کم شد و حسادت را باید ما علاج بکنیم با مربیان با علمائی که در این زمینه ارس کنم که کار کردند باید این چی مریضی هست شما ببینید شما مریض میشید سریتون درد میگیره میدهیتون مشکل پیدا میکنید پیش دکتر میرید چرا برای این نوع مریضی ها ما پیش دکترهای روحانی نریم پیش اتبای معنوی نریم چرا نریم خودمون را درمان نکنیم بگیم مریضی چیه مشکلیمون چیه تا اون برای ما بگه چیکار بکنیم از بعضی از اساتیل و مشایخ من شنیدم که برای حسادت و علاج حسادت و درمان حسادت چند پیشنهاد دادند یکی اینکه فرمودم با کسی که حسادت داری اولا پشت سری او برای او دعای خیر کن برای ترقی بیشترش برای پیشرفت بیشترش خدا بهش دادی بهتر بیش بده خداوند دا در مالش برکت بده در جانش برکت بده هدایتش کن دیدارش بکن اولادش را براش نگه دار تو براش دعا بکنی خدای از زوجال میبینه برخلاف نفس داری رفتار میکنی خدا نفس ترا اصلاح میکنه خدا حسادت ترا دور میکنه دومینه دو که سعی کن بهش هدیه هم بده هر وقت دیده اون هدیه هم بده تا این هدیه محبت میاره محبت هم هیچ وقت از یک طرف نمیاد. محبت دو طرف خود به خود تو که هدیه بده فردا اون به هدیه میده اگر نه هم اشکال نداره بالاخره هدیه یک محبتی یک نوع احسانی را ایجاد میکنه و سوم اینکه پشت سر او, او را تعریف کن جایی که از او بد بگی از اون تعریف بکن این پسر من ایمان واقعا آدم درستیه خدا حفظش کنه چنين چنان از اون خسال خوبش تعریف کن بالاخره اینها باعث میشه همه شما بر خلاف نفس حرکت بکنی بعدا رب العالمین این نفس را زود درمان میکنه بعد چنان مهر و محبتی در دل دوتایتون پیدا بشه که از همدیگه از برادر با همدیگه نزدیکتر باشید با همشی رو شکر بشید لذا اینا حسادت داشتند هر کسی حسادت داشت به اون کسی که باو حسادت داره سعی کنیم به اون خیر برسونیم به هر طریقی که ممکن است الله می فرماید اذ قالوا يوسف واخوه احب الى ابينا ونحن عصباء زمانی که آنها گفتند یوسف و برادرش محبوب ترست بپیش پدر ما از ما و نحن عصبت و ما جماعتی هستیم ما جمعی هستیم ما گروهی هستیم ان ابانا لفی ضلال مُبِين همانا پدر ما در گمراهی آشکار است گمراهی آشکار یعنی چه؟ خطا در خطا هست در غلطی هست اشتباه هست اشتباهی اشتباه آشکاری ما دردش میخوریم چرا اونا رو دوست داره؟ لذا چیکار بکنیم با هم مشوره کردن. اُقتلوا یوسف او اترحوه ارض وجه ابیکم یوسف را بکشید اول باید یوسف را از بین ببرید. بهتر یوسف است. ااو اترحوه ارضا یورا در سرزمین بیاندازید. در منطقه‌ای در سرزمینی که دوباره نتون انجا بیاد اون زمان سفر کردن راحت نبود یک بار که سرکارت می افتاد در یک منطقه دوری برای همیشه اونجا بودی نمی تونسته بیای تا یخلو لکم وجه ابیکم توجه پدر خالصتم برای شما باشد خالی برای شما باشد یعنی اون وقت دیگه پدر یوسفی ندارد چقدر احمقانه هم فکر کردند بعدن معلوم شد که پدر یک یوسف ده تا یوسف شد شب و روز دیگه یوسف یوسف بود رضا گفتن که خالص بیشه برای شما توجه پدر شما خب گناه را چکار میکنی؟ وجدان داشتند فرزندان پیغمبر بودند گناه را گناه میدانستان اشتباه را اشتباه میدانستند اما شیطان چطور انسان را فریب میده؟ ما را هم گاهی فریم کار را بکن بعد توبه بکن و تکونو من بعده قوم صالحین بعد از اون قوم صالحی بشید یعنی قبل از اینکه که گناه را بکنن پیشا پیش توبه را در زمیر خودشون در دل خودشون مخفی کرده بودند اللهم ابن کسی نوشته فَأَزْمَرُتْ توبه تَقَبْلَ الزَمْبَ قبل از گناه در دلشون فکر توبه هم بودند گفتم بعدا ما توبه میکنیم بر میگردیم به خدا ولی این کار را باید بکنیم اگر میخوایید چند برادر بودن اینها، اما یکی از برادران با این پیشنهاد مخالفت کرد اینکه یوسف کشته بشه گفت نه قال قائل منهم قائل از آنان گفت لا تقتل یوسف یوسف را نکشید بلکه والقهه في غيابه الجب ان ربي اندازه در یک گمنام چاہی که مردم اینجا با او چا آشنایی نداشته باشند یہ چاہی که کاروانی که از چاه ها داشته نباشه اونجا بر به فکر آب بره و هم بعضی تفسیران نوشتن که چاہی آب داشته نباشه فی غیابه الجب تا کہ یلتقط بعضو سیاره یعنی بعضی از مسافرین اون رب بچینند برای خودشون بردار این کنتو فائلین اگر میخوای کاری بکنین این کار را بکنی نکوشید این که بود ابن عباس رضی الله عنہما میفرماید که این برادر بزرگ یهوزا بود هم یهوزای هم یهودا اما بعضی دیگه گفته اسمش روبیل بود والله عالم قرآن وقتی اسم را نگفته. مفسرین از روی تورات همه اسمها را نوشتند هر ارز کنم که ده تا برادر اسمشون را نوشتند ولی خب چون اینا لازم نیستند ما بدونیم اسم اون کی بود اسم این کی بود ابهیمو ما ابهمه الله چیزی را که خدا مبهم و سرپوشیده گذاشته ما هم همینطور میگذاریم لذا یکی از اونها قال قائلون من هم قرآن میگه یک گوینده از اونها گفت گفت که یوسف را نکشید و در چاه گمنامی ببرید اگر میخوایید بالاخره رفتم پیش پدر مقدمتن اول من بر پدر قالو یا بانا ما لکلا تأمننا على یوسف ای پدر ما چی شده شما را چرا شما شما برما اطمینان نداری نسبت به یوسف در حالی که و اینا له لناصحون ما خیر خواهیو از دل و جان دوستش داریم ببینید این داشته باشی که از این آیه بنده قبلا برداشت کردم معلوم میشه که قبلا هم اینها یک سری بی اعتمادی های ایجاد کرده بودند حرکاتی از اینها صورت گرفته بود که حضرت یعقوب بهشون اعتماد نداشت قبلا حتما برای کاری میخواستن یوسف را بفرستند یا با خود جای دیگه ببرند غیر از این که بخواند خان سرش بیارند به غیر از این یعقوب گفته بود نه یوسف را نمیفرستم از قبل اعتماد نبود له زینا مقدمه چینی میکنند و میآیند زبان نرمی اختیار میکنند زبان توازو زبان خیرخواهی زبان دلسوزی زبان چرب از همینجا معلوم میشه که یعقوب پیامبر این نبی خدا علم غیب ندارند نمیدونه اینا بشت سر با هم مشوره کردند وقتی غیب انبیا غیب ندارند چطور بقیه انسان ها غیب میتونن داشته باشند لذا الله می فرماید قالوا یا ابانا ما لا تطمئن على يوسف ای پدر ما چرا شما اطمینان نداری بر ما نسبت به یوسف و اینا له لناصحون همانا ما خیرخواهی او هستیم از دل و جان ارد خیرخواهی می کنیم خب این مقدمه بود این تمهید بود هدف چی می بگید ارسل همانا غدن یرتع و یلعب بگذار هم رابا ما فردا اردک یرتع بچرد یعنی بازی کند بگردد تو بیابان و لعب و بازی کند و این ناله لحافظ همانا ما حافظ او هستیم ما نگاهبانی هستیم ما مثل چشمیمون ازش محافظت میکنیم نمیگذاریم بیش آسیب بی برس بیشتر فردا با ما بیاد بیابان هست و در بیابان خوش میگذارد بازی کند تفری کند ببینید از اینجا معلوم میشه که تفریحات و یک سری ورزش هایی در بیابان و بازی ها و اینها برای مردم اشکالی هم ندارد و این خلاف شعن و وقار انسان هم نیست بگه بزرگی انسان را کم میکنه نه کسی مثلا تو کوه میره. یکی کو نوردیم میکنه یکی مثلا دوندگی میکنه یکی یک ورزش دیگه میکنه که تیراندازی میکنه یکی اسب سواری میکنه اینا خوب است و انسان اگر تفریحی چیزی البته قبلا توضیح دادم که کلا زندگی ما تفریح نباشه هر روز هر روز بالاخره کاری طاعتی عبادتی هم هست هر جمعه هر جمعه اما گاهی انسان در سال یک بار اگر بره و دوست روزی در کوه میخواد تفریه بکنه این چیز پسندیدهی هست اینجا هم قرآن آورده یعقوب هم به فرزندان خودش را نگفت این چی کاری شما میکنید مگر ما مسلمان باید تفریه بکنه مسلمان میتونه تفریح بکنه حتی گاهی که شرایط خوبی باشد خانمها ها را هم میتونه برای تفریح ببره جاهایی که بلاخره نامحرم نباشه جاهایی که بی پردگی و بی حجابی نباشه بلاخره اونها هم باید به اونها خوش بگذارد این حدیثی هست یک روایتی بنده در جای دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم را اے یک صحابی دعوت کرد گفت که یا رسول الله شما مهمان من هستید رسول الله فرمود آئیشه تمعی آئیشه هم هست با خوب بیارم گفت نه یا رسول الله غذای من کمه اندازه شماست گفت فلائزن پس من نمیام من بدون آئیشه نمیام میخواست بلاخره جای میره تفریحی غذای خوبی بخوره آئیشه هم با خودش ببره یه روزی دیگه اون صحابی آمد گفت شاید امروز رسول الله بیاد بعض هم سؤال گفت نه یا رسول الله به اندازش شما گفت فلا ایذن پس نه بار صبح او مجبور شد غذا بیشتری آماده بکنه بار صبح محمد گفت یا رسول الله امروز مهمانی من است گفت عایشه هست گفت بله هست گفت پس برو ما میاییم بیرون مدینه بود عایشه رضی الله را برداشت ام المومین خودش تعریف می‌کنه میگه ما وقتی که از مدینه فاصله گرفتیم به اندازه که خانه های مدینه دیگه پیدا نمی‌شد و کسی ما را ندید گفت آیشه الان بیا با هم مسابقه میدیم کی سریتر میدوه میگه ما مسابقه دوندگی دا دادیم من سبکتر بودم من از رسول الله سبقت گرفتم تا این حق بلاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم رعایت می کرد و اسلام خشکی نداره اما اون تفریح که تفریح جائز باشه. بعضی از ما چنان از دین را بلاخره تفسیر میکنیم و چنان تحلیل میکنیم که اصلا سرپا خشکی هست و گوی از زنها باید بر همیشه قفل باشن گرچه امروز الان زنها ماشاءاللہ قدرتشون بیشتر شده ولی نبی اون حدی که غربی ها انجام می دهند که همه چیز خلاصه به زن بشه و نبی این اندازه که بعضی افراد خشک انجام میدهند که زن هیچ اختیاری نداره اسلام تفریحاتی و یک سری از کنم که لذاتی را که جائز هستند و خوشی های را خوبی های را تفریحای را، شرورای را که در او غفلت نباشه، اسلام گذاشته جایز قرار داده، اما نباید در اون مبالغه باشه. هر چیز حد خودش را باید داشته باشه. لذا اینجا هست همین که اینا گفتم ما میریم بازی میکنیم این یه وقت این نوع روایت ها بنده زیاد این روایت ها را تعریف نمی کنم برای بعضی جرأت بیشتری پیدا نکنه با یک آدمی که خیلی آدمی تندی بود من گفتم بیا امروز برای روایتی میخانم تا روایت را باز کردم اونم بالاخره عالم بودمی درست من چی بگم گفت نه نه برای من نخون این روایت یعنی نمیخواست که اصلا آماده نیستم بعضی ها که بگن که نه تفریحی هم وجود داره لذا اما سو استفاده هم نشود گفتم ما میرم بازی میکنیم تفریه میکنیم و از یوسفمون محافظت میکنیم اما حضرت یعقوب علیه سلاط و در وحله اول رد کرد رد کرد مطالبه اونها را خاص اونها را گفت نه من یوسف هم را با شما نمی فرستم قال اینی لیحزنونی ان تذهبو به همانا مرا غمگین میکند و می مرا حزین میکند مرا ناراحت میکند ان تذهبو بهی اینکه اون را ببرید و اخافو ان یکله الزیب می ترسم اون را ببرید و شما غافل بشید و گرگ او را بخورد و اخافو این یکوله و زیب می ترسم او را گرگ بخورد و انتم انه غافلون شما غافل باشید شما تو بازی خودتون مشغول باشید این بچه ای هست میگن در اون زمان در شام گرگ زیاد بود و گوسفندها ها را بیکردند گرگ ها در گذشته زیاد بودن الان کم شدند این بلاخره حرفی نشد که دیوانه را به یاد خرمنم داغتن بود اونا گفتن پس خوبه بالاخره پدر چیز خوبی یادآوری کرد بهترین بهانه همین گرگ است لذا آنها گفتند پدر چرا ما را دست کم گرفتی قالوا لان اكله الذئب اگر گرگ او را بخورد و نحن عصبه و ما هم یک جماعتی هستیم یک گروهی هستیم الله پس از ما زیانکارتر کسی نیست از ما بدبختر هم وجود نداریم این وقت اینقدر ما بدبخت و پس باشیم که تنها برادر عزیزیمون را گرگ بیاد از پیش ما بخورد این چطور ممکن است لذا از اس سیاق معلوم میشه اندماج از کل داستان را قرآن تعریف نمیکنه از سیاق و سبق میفهمید چونکه کتاب داستان نیست بلاخره معلوم میشه که یعقوب علیه صلات السلام راضی شد و یعقوب یوسف را فرستاد باشه ببرید با دلی نخواسته الله تعالی میفرماید او را بردند داستان را کلش را اونطوری که ما شنیدیم قرآن تعریف نکرده اما در روایت های تفسیری میاد که عرض کردم این روایت های تفسیری بیشتر از اسرائیلیت گرفته شده بعضی ها که با اکاєده ما در تضاد و در تناقض اونها را ما با شدت رد میکنیم بعدن میخوایم انشالله بعضی از اونها را بعضی دیگر را رسول الله فرمودند لا نصدق ولا نكذب نتایید میکنیم نه تکذیب میکنیم الله بهتر میدونه تو کتابایشون هست احتمال هست که واقعا پیغمبر بر پیغمبرشون وای آمده این احتمال هست که ملله خودشون تحریف کردن از خود درست کردن به این خاطر ما سکوت میکنیم درباره اون ما مسائل حس که یعقوب یا علیه صلی اللہ تا بیرون کنان تا آخرین حد روستا خودش با یوسف رفت بعد از اون بالاخره یوسف را به اونها سپرد و تا جایی که چشم کار می کرد، چشمش به یوسف گویی اللہ تعالی در دلش قرار داده بود آخری ملاقات است انگونه رفتار کرد این برادرها هم یوسف را با یک نازی بر دوش گرفتن میبوسیدن او گفت به دوش به, به آغوش من بده او گفت به من بده بالاخره به این صورت با جلوی پدر با یوسف محبت میکردند بردند یوسف را تا اینکه وقتی که از چشمان پدر غایب شدن پدر برگشت از اون به بعد یوسف را گذاشتن زمین و بعد از اون شروع کردم به کتک زدن یوسف یکی توگوشی میزد یکی پسگردنی میزد یکی اردنگی میزد یوسف تعجب کرد که چرا رفتار اینها عوض شد از همین جا یوسف فهمید و متوجه شد که اینها این نقشه‌ای بود دیگه دیر شده بود فاصله گرفته بودند و یوسف را با همون وضعیت بردند کتکش زدند و آخر همون چاہی که نظر بود پیش اون چاه رفتند و یوسف را بستند و در چاه آویزان کردند قرآن میگه فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ زمانی که او را بردند و اجمعو با هم دیگه اجماع کردند با هم دیگه اتفاق کردند اَنْ يَجْعَلُوهُ فی غَيَابَتِ الْجُبُ اینکه اون را قرار بدهند در چا گمنام جمنام چاهی نامشخص، بعض میگه غیابت الجب چاهی بسیار عمیق، و اوحینا إليه لتنب بأنهم بأمرهم هذا، وهم لا يشعرون ما بیوسف وحی کردیم. سوال اینجا است که آیا مگر یوسف همین بچگی تفولیات به پیغمبری رسیده بود؟ اینکه جوابش مسلمه نه؟ بعضی میگن یوسف علیه صلی اللہ وسلم ساله بود بعضی گفتن دوازده ساله بود در بیان این دوتا سن بیان کردن از هفت سالگی تن دوازده سالگی خلاصه همین حول و حوش بود گرچه بعضی از علمات جمع قلیلی اعتقاد دارن که یوسف را خدا از بچگی نبوت داد اما قول صحیح اینه که این واحی به معنی الهام است در دل القا کردن است این وحی مثل اون وحی هست که شما خان دید در سوره نح و اوحا ربکا الى النحل رب تو به اصل وحی کرد یعنی در دلش اندخت که ای زنبور این راه را مستقیم برو بکندویت میز هر زنبور خدا به دلش قرار میده این را این وحی مثل اون وحی هست که به دل مادر موسی و اوحینا الى ام موسی ان اوضعی شیرش بده نترس هر وقتی که احساس خطر کردی ببر تو صندوقچه چه بذار تو دریا اصلا چنان در دل مادر موسی خدای از جل این الهام را کرده بود و دلش قرص بود که مطمئن بود این بچه به من میگرده. پس بعضی وقتها خیلی از ما هم هستن که خدا یک چیز به اونها الغام میکنه شما میدونید که حتما من الان زودتر برم به نفع من از همونطور میری خیر هم میبینید نفع میبرید از خطر محفوظ میمنه پس این وحی به این معنی خدا در دل یوسف الغا کرد. یوسف با خودش گفت و خدا به دلش داد که یک روزی میشه که من به اینها خواهم گفت شما چرا ز... با من این ظلم را کردید یک روزی میاد که صفحه بر میگرده به دل یوسف این حرف نشسته بود چطور نشسته بود الله الهقا کرده بود الله الهام کرده بود لذا الامی فرماید و اوحینا الیه لتنبئ انهم هذا ما به او وحی کردیم در دلش انداختیم لتو نبی انهم بی امرهم حتما حتما تو خبر می دهی را ای یوسف بی انکار شان بی امرهم حاضا انکاری که می کنن یک روزی بیشون خواهید گفت که شما چرا انکار را باما کردید و هم لا یشعرون انها آقبت انکار را نمیدانند که چه رسوائی و چه زلتی براشون دارے انان همی ولی خدا می بل اخر یوسف مظلوم را تو چا انداختند خودشون آمدند دیر آمدند به وقت شب آمدند هر وقت باید بعد از ظهر می آمدند این اولین دروغ دروغ عملی این را میگن دروغ زبانی نبود دروغ عملی همین جا خودشون را مشغول کردند بازی کردند و مسابقه دادند هر کاری کردند خندیدند قهقهه زدند و خوشحال بوده از این که در کارمون موفق شدیم و بالاخره شب دیر شد یعقوب علیه صلی اللہ هر لحظه هر ساعت لحظه شماری میکنه نگاه میکنه میفرسته میبینه خبری نیست. هیت دلش شور میزنه هیت دلش بالاخره جوری میشه که چه خبره غرار استی اتفاقی بیفته تا وقت عشاء آمدند بس این اولین دروغ آمدن وقت عشاء خودش یک دروغ عملی یبکون گریه می کردند این دروغ دوم بود چند دروغ اینها سره هم الله اللہ می فرماید و جاؤ اباهم عشاء آمدن پیش پدر شام به وقت عشاء مکر اول یبکون در حالی که گریه می این مکر دوم این هر دو عملی سومی قولی قالوا یا ابانا اینا ذهبنا نستبق امكره قولی هست ای پدر ما ما رفتیم که مسابقه بدیم و ترکنا یوسف عندما متاعنا ما یسفرا ندر جای وحشید ندر جای دوری کنار وصال خودمون گذاشتیم عندما متاعنا فاكله الذئب ورا گور خورد ورا گور خورد همون که تو پیش بینی کردی درست پیش بینی کردی گور غمدو خورد اما دوست دوز بریش خود پری داره پیشاپیش میگه و ما انت بمومن لنا تو مرا تعید نمی کنی پدر ما می دونیم تو حرف ما باور نمی کنی ما هرچی بگیم تو باور نمی کنی و ما انتا بی مؤمن لنا ای بی مصدق لنا شما مارا تصدیق نمی کنی تایید نمی کنی ولو کن نصادقین گرچه ما راسگو هم باشیم راست بگیم هم شما قبول نمی کنی خب این تا مکر بودند دو تا عملی یک قولی مکر چارم پیراهن را آوردند و جاو علا قمیسهن بدن من کذب قمیستش را آوردند با خون دروغین این هم یک دروغی دیگه بود خون دروغین بود چون خون یوسف نبود خون برهی بود بزغالی بود این چیزی را کشته بودند و با اون ملتخ کرده بودند اما غافل از اینکه پیراهن را هم مقداری پاره بکنند پیراهن را هم تکه تکه بکنند پیراهن سالم اما پر قال بل سوالت لكم انفسكم امرا يعقوب متوجه شد يعقوب متوجه شد اما از طرف یعقوب دلش غرس بود اون که دیده بود یوسف علیه السلام میدونست اون خواب عملی میشه ولی نمیدانسین پیرمرد که چهل سال طول میکشه گفت بالاخره چند روزی جدا میشه دوباره میاد. الله می‌فرماید: قال بل سوالت لكم انفسكم امراء. فرزندانم شما واقعیت را نمی‌گید، بلکه حقیقت اینه که نفس شما برای شما یک امری را تزیین کرده، زیبا و آراسته کرده، کاری را در دل شما نفس برای شما آراسته کرده، الان اون را عملی کردی. به من گویید. فصبر جمیل من چاری بغیر صبر جمیل نقام داشت سبر جمیل صبر جمیل اون صبری را میگویند که در اون شکوه نباشد در اون داد و فریاد آه و فغان نباشد والله المستعان و على ما تصفون الله انزاتی است که از او استعانت گرفتی میشه. از او باید کمک گرفت بر اون چی که شما بیان میکنید. شما میگه گور خورده بعد از خدا کمک گرفت بالاخره یوسف علیه السلام را به این صورت در چاه گذاشتند اون شب در چاه بود برادرم پیش یعقوب بود روز بعد یعقوب علیه السلام نگذاشتین اینا گفت برید یوسف را بیارید به بی هر قیمتی شده اینا میخواستن برن بدونن چی شد تکلیفی وقتی کسی پیدا نکنه بیار مستقیم به خانه از این هم میترسیدند. لذا رفتن دوباره دیدن یوسف هنوز تو چه هست دورا دور قرار گرفتن دیدن کاروانی آمد الان روز دوم بود روز سوم بود بیشتر بود کمتر بود قرآن نگفته بالاخره از فقط حضور برادرم معلوم بود که اونها همش مترسد بودند همش زیر نظر داشتن که چی میشه وجاعت سیارتون امتحان دوم سبحان الله از عزوجل وقتی که انسان های بزرگ را امتحان میکنه امتحاناتش هم بزرگه امتحانات هم بزرگه و لحظه به لحظه امتحان سختتر میشه مرحله بعد امتحان از مرحله قبل مشکل تر میشه الله می, می فرماید وجات سیاره سیاره آمد یعنی قافله آمد کاروان آمد خب کاروانی ها همیشه عادتشون اینه که یک نفر معمور آب هستند فَأَرْسَلُوا هم فرستادن واردشون را وارد یعنی مسئول آب اون را فرستادند که دل دَلْوه به خودش را آویزان کرد برادرانم از دور نگاه میکنند کنند را آویزان کرد یوسف علیہ السلام وقتی که دید دلو ریسمان آمد خوشحال شد در دلش یقین داشت که خدا یاریش میکنه خدا نجاتش میده لذا خودش را به دلف بست به ریسمان بست در دلف خودش را قرار داد او بلند کرد اون که بلند کرد وقتی که اینجا یوسف را دید تعجب کرد سبحان الله چه غلام و چه پسرک رانایی، چه پسرک زیبایی اینجا تو چایی چکار میکنه قال يا بشرا هذا غلام يا بشرا اي کاروان شما را مجدباد خوشخبری باد شما را غلام این پسری هست غلامن اي غلامون عظیم و خیلی از نظر قیمت ارزش داره واسروه بضاع الله می فرماید اون را چیکار کردند مخفی کردن به عنوان یک کالا اتجاری این کاروان میگویند که از فرزندان اسماعیل علیه السلام بودند از عربہ بودند فردی امام مجاہد رحمه الله کے شاگرد ابن عباس ایشو می که امره مالک ابن دعر و اصحابه این مالک ابن دعر بودن جا و اصحابش عن تجاری الذین معاهم فی از این تجاری که در اون کاروان بودند و قالو هو بزاعت گفته این یک بلاخره کالای تجاری هست ما این را میبریم از میگیم که از اهل شام خریداری کردیم و اونجا میبریم میفروشیم لذا به بقیه کاروانیان نمیگیم که بعد اونا میگن شما دیدید ما هم با شما شریک لذا به این خاطر مخفیش کردند اما برادران امد ادعا کردند و الله و علیمون به ما یعملون خداون بهتر میدونست اون که اونها عمل میکردن اینا میرا خدا زیر نظر داشت زیر کنترل داشت اما برادران یوسف علیه السلام آمدند و گفتند که این غلام ما هست این برده ما است شما این را خریدید شما این را برداشتید ما این را میخواییم البته میفروشیم اگر میخوایید اونا دیدن که صاحبی در آمد گذاشتند که برای اون قیمت اونها راضی شده هیچ چی نبود قیمت بسیار ارزانی و شروحو به ثمن دراهم معدوده اون را فروختم به پول بی ارزش بخص بی ارزش بعضی میگن هیچده درهم بعضی میگن 20 درهم 20 درهم و هیچده درهم هیچ چی نبود دراهم معدود یعنی چند درهم مشخص و کانو فیه من الزاهدین علت اینه که اونا نیاز به پول نداشتند از نظر پول زاهد بودند زاهد یعنی بی رغبت بی میل میلی به پول نداشتند میلی به رفتن یوسف از این منطقه داشتند به این خاطر پول برای اونها مهم نبود هم میخواستند که کاروانیان ببرن یه وقت ما بعدا بگم مالکیه و هم پولی را مطرح کردن که اونها بخرند را لذا این فرزند پیغمبر را این پیغمبرزاده را به پول ارزشی، عرزش، فروختند و دادند اونها هم با خود برداشتند خاطرشون جمع شد برگشتند به خانه بازم به پدر گفتم پدر ما يوسف ال وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه, أو نتخذه ولدا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 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمَ وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِ المحسنين سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد از اينکه به بردي و غلامی از طرف برادرانش فروخته شد این خودش یک امتحان بزرگی بود و یک رنج بزرگی بود برای یوسف که یک انسان پیغمبر زاده دارای بهترین اسالت و نجابت فرزند یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم تمام پشت در پشت نبی پیغمبر اما به عنوان یک برده و یک غلام فروخته میشه این زخم بزرگی بود این امتحان بزرگی بود علا ای حال از اونجا آوردند یوسف را کاروانیان به مصر آوردند اینجا که به مصر رسیدند شخصی در مصر او را خریداری کرد قران کریم اسمش را نگفته فقط قرآن می میآیت که وقال الذي اشتراه من مصر گفت اون کسی که خریداری کرد یوسف را از مصر از اهل مصر این کی بود بعضی میگویند که این سروزیر مصر بود کسی که در راس تمام وزرا بود و عزیز مصر اون وقت میگفتند چونکه رئیس الوزراء بود در رأس وزرا بود بعضی معتقدند که این اون وزیر اصلی که در رأس وزرا بود نبود بلکه وزیر خزانهداری بود ولی از مجموعه آیات معلوم میشه که این ها دو دوتا وزیر جداگانه نبودن کسی که در رأس وزارت ها بود و کسی که خزائن بدستش بود یکی بود علا ای حال این فرد یوسف را خریداری کرد اسمش چیئه الله عالم روایتی از ابن عباس رضی الله عنهما داریم اون روایت هایی که حتی صحابه روایت میکنند به نقل از علمای بنی اسرائیل روایت می به نقل از ما یهودی که مسلمان شدند، از اونها نقل میکنند. اونا از کتابهای خودشون روایت میکنند. چون در قرآن و از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی گفته نشده. ابن عباس رضی الله تعالی نهم یفرماید که اسمش قتفير بود. اسمش قتفير بود. این کسی که یوسف را، یوسف عليه السلام را خریداری کرد و در روایت دیگری هست که اسم این فوتیفار بود نام دیگری هم ذکر کردم معروف ترمی قدفیر هست و فوتیفار هست این فرد که ما بهش عزیز مصر می گوییم عزیز مصر او را خریداری کرد اما از قضاء این عزیز مصر بی اولاد بود الله تعالی به این فرزندی نداده بود وقتی که اون رعنایی یوسف را دید زیبایی یوسف را دید و فهم و فراست یوسف را کسی که خودش فهمیده باشه در همون برخورد اول متوجه میشه که از حرکات از نوع صحبت از ادب، از تمام نقل و حرکت میدونه که این فرد یک فرد عادی نیست لذا متوجه شد که این فرد علاوه از اینکه زیبایی ظاهری داره زیبایی باطنی هم داره یعنی اغل هم داره درک هم داره فهمیده هست به همین خاطر به همسرش گفت که این مثل بقیه برده ها نیست برده اونا زیاد داشتن برای خدمت غلام زیاد داشتن یکی مسئول آب بود یکی مسئول نان بود یکی مسئول نظافت بود یکی مسئول پخت و پز بود هر یکی در یک بخشی کار می کرد غلام ها در زمان گذشته نظام غلامداری و برده داری خیلی زیاد بوده لذا بلخصوص اون بالاخره اینها که متعلق به پادشاه بودند و به سلطنت بودند برای هر کارشون یک غلام داشتند برای هر کارشون یک برده داشتند اما به زنش گفت که این برده با بقیه برده ها فرق میکنه جای این را در جایی که بقیه برده ها هستند نگذار به این جای معززتری به جایی که بالاخره شرف و عزت و اکرام این بیشتر بشه به بی این جای بده و همچنین این امید ما نگاه می کنیم در آینده این را برای خودمون اصلا فرزندی به فرزندی می گیریم لذا وقال لذش تراه من مصر گفت اون کسی که خریداری کرد او را از مصر لمراتی برای زنش زنش اسمش کی بود الله و عالم در همین روایت های اسرائیلی آمده که اسمش زلیخا بود هم زلیخا هم زلیخا هم راعیل ستا نام گفتند بالاخره به اون زلیخا یا زلیخا گفت اکری میمثواهو یعنی جای شرا جای خوبی بکن جای مناسبی باشد عسا این ینفعنا عسا این ینفعنا ببینید معلوم بیشه که این عزیز مصر که عزیز مصر شده بود مفت عزیز مصر نشده بود فهم و فراست داشت دانایی و عقل داشت با وجودی که یوسف کوچیک بود بچه بیش نبود ولی از همین پیشانیش فهمید از درک و عقلش فهمید از نقل و حرکتش فهمید که این انسان آینده درخشانی دارد به این خاطر به زنش گفت عصا این ینفعنا توقع داریم امید داریم که به ما نفر برساند در آینده برای ما این نافع میشه برای ما مفید میشه میتونه که یکی از بهترین های کاخ و قصر ما بشه او نتخذه ولدا یعنی که ما این را در آینده متبنا میکنیم متبنا یعنی پسر خانده، فرزند فرزد خانده من تو که فرزندی نداریم این را فرزند خودمون قرار میدیم این بچه باهوشی معلوم میشه بچه فهمیده معلوم میشه لذا امید هست که عصا این فعنه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه که از صحابه هست و از مفسرین بزرگ هست ایشون جمله دارد می فرماید که فهم و فراست سنفر را خیلی تعریف میکند میگه سنفر واقعاً از مجموعه قرآن و سنت معلوم میشه که این سه نفر خیلی فهمیده بودند خیلی دوراندیش بودند و تشخیص اونها تشخیص بیست بود تشخیص خیلی عالی بود یکی از عزیز مصر که یوسف را وقتی که دید گفت که این در آینده میتونه برای ما مفید واقع بشه یعنی خدای تعالی به اون چنان فهمی داده بود که درک کرد فراست و این عقل مندی عزیز مصر بود دوم دختر حضرت شعيب دختر حضرت شعيب که وقتی که موسی عليه و السلام را دید گفت که ای پدر بهترین کسی که تو به عنوان اجیر و چوپان می بگیری که هم, هم امانت دارد و هم قوی هست قوی و امین است همین فرده از کجا شناخت دیگه موسی را مطالعه کرد در همون برخورد متوجه شد که این انسان چقدر قوی هست و این انسان چقدر امین است چشم پاک است لذا این دختر هم فراست داشت این دختر فهمیده بود از کجا خبر داشت که موسی دارا انده پیغمبر میشه از حرکات موسی علیه الصلا و السلام متوجه شد و سومین کسی که میفرمای فهم و فراست بالایی داشت حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود که بعد از خودش عمر رضی الله تعالی عنه را به عنوان خلیفه انتخاب کرد به عنوان جانشین او در عمر چیزهای دید و عمر همونطور طور که ابوبکر حسن زن داشت و گمان نیک داشت همون طور ثابت شد عمر در زمان خلافت ده سالش کارهایی کرد پیشرفتهایی کرد هم از نظر پیشرفت, و فی، پیشرفت فیزیکی اسلام و هم از نظر قوانینی که وز کرد و هم از نظر نظمی که ایجاد کرد دنیا منده که عمر این سواد را این مدیریت را این درک و فهم را از کجا آورده بود؟ ابو بکر واقعا از بین همه اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم خوب تشخیص داد خوب فهمید لذا ایشون من وقتی که قرآن و سنت را مطالعه می کنم این سه نفر را خیلی فهمیده و خیلی با فراست می بینم علا ای حال گفت که شاید این برای ما در آینده مفید بشه یا ما پسر خانده خودمون قرار می الله تعالی می فرماید مکننا مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اینگونه ما قدرت دادیم یوسف را در زمین قدرت دادیم یا تمکین جای دادیم هر دو معنی درسته یعنی ببینید مرحله اول خدای عزوجل از اون بادیه از اون روستای کنعان از اون قریه یوسف و السلام را آورد به یکی از متمدن ترین شهرهای اون روز دنیا امروز هم مصر خیلی شهر ای هست مصر کشوری ای هست تمدن باستانی دارد و تاریخ چند هزار ساله دارد تمام دنیا متعجب است با اهرام سگانه مصر که اینها چطور ساختند و اینها بشر بوده ساخته یا جن بوده ساخته علا ای حالا امروز هم مصر به عنوان مصر باستان یکی از شعرهای قابل توجه دنیا است ولی اللہ عزوجل در پیشرفته ترین شهر اون زمان یوسف را آورد اونم اللہ تعالی طوری برنامه ریزی کرد ببینی شما کار خدا را که یوسف را چون در آینده خداون می که پیامبر تعین کند و یوسف علیہ السلام مترقی بشه از نظر ظاهر هم متمدن بشه بروز باشد و بتواند که پیامبری ثابت بشه که هم انسان های اون اصر را خوب جواب گو بشه لذا یوسف را الله تعالی با این عنوان میاره. در خانه عزیز مصر پرورش می میده در دل او هم محبوبش قرار میده که او یک جایگاه جائج خاصی بهش میده یه عزت خاصی بهش میده لذا الله می, می فرماید وکذالک مکننا یوسف فی الأرض، این ما قدرت دادیم یا جای دادیم یوسف را در زمین زمین مصر و لنعلمه من تاویل الاحادیس تا اینکه به او بیا موزیم تأويل احادیث یعنی تعبیر خواب خداي الزواجال در مصر به او علم تعبیر خواب داد. این علم تعبیر خواب یه علمی نیست که انسان این را حاصل بکند. بره بخانه یاد بگیره. این یک ملکه و یک استعدادی هست. الله تعالی به بعضی انسان ها میده تا که خواب را میگه گرچه بعضی ها از بس کے کتاب های تعبیر خواب مطالعه میکنن هم مواردا در این زمینه اما بعضی ها خود به خود فکرشون ذهنشون خوب کار میکنه ی استعدادی در مثل شعر که مثلا استعداد شعری هر انسانی نداره یک انسان عالم بسیار بزرگی ہے بیستا سیتا کتاب نوشتے اما یک شعر نمیتونه بگوئے اما یک انسان بیسوادی خاندن نوشتن بلد نیست ماشاءاللہ شاعر ہے لذا بسیاری چیز هاں هستن که استعدادشون استعداد وحبی هست خدادادی هست لذا بیوسف علیہ السلام اللہ عزوجل این ملکر این آیت فرمود کہ علم تعبیر خواب را بهشداد والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون الله تعالی بر امر خودش غالب است این توحید است یعنی ببینید خدا را که هر کاری میخواد بکنه میکنه غالب است بر همه امور مسلط است چطور غالب است غلامی را میار آغا میکنه فقیری را و مسکینی رمیاره در کاخ به او هنری میاموزه به او علمی می میده که بعدن چارساز همه همگان میشه یوسف علیه سلام السلام را همین تعویل احادیث خود داد علم تعبیر داد بیش که بعدن چی شد ساز شد بعدن گره مصر و مشکل مصرہ باز کرد لذا الله تعالی یک انسان بیزاره بی نهایت غریب فقیر ناشنا هیچ که تو مصر نمیشناسی اما خدا بهش علمی میده بهش هنری میده بهش ملکه و استعدادی میده که این میايت 400 دیگران میشه میايت راهکار میده میايت برنامه میده تمام محتاجیو میشند گاه گاهی این توره الله عزیز و یک فردی را از یه خانواده فقیری از یه خانواده که نان شب نداره ولی اللہ تعالی چنان ملک و استعدادی میده که همگان دهانیش وامی موند که این چه ملکی داره این چه هوشی داره چه ابتکاری داره چه هنری داره لذا این خدا که میخواد کسی را عزت بده کسی را میخواد که بالا ببره اللہ تعالی یک استعداد درونی به او می ده که در همه مردم او متمایزه او برتر است لذا الله می فرماید والله غالب على امره الله در امرش غالب است هر کاری که بخواهد او انجام می گيرد ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اما اکثر مردم نمیدانند که هر خدا بکنه همو میشه گدا و فقیر را پادشاہ می کنے پادشاہ را پاین ویارے این اللہ است ولما لما بلغا اشده آتیناه حکما و علما اللہ ہمی فرمایت وقتی که یوسف بسنش رسید بلغا اشده بسن قوت رسید ما به او حکم و علم دادیم ما مولان بلغ اشدهو استفاده میشه برای بلوغ ولی اینجا به اون معنی بلوغ نیست وقتی که یوسف به سن رشد رسید به سن قوت قوت عقلی فهم و درک رسید ما به اون دو چیز دادیم حکما و علما هم علم حکومت داری دادیم و هم علم نبوت دادیم حکما مراد سیاست هست، حکومت هست چون در این کاخ زندگی کرد و هم به او علم داد نبوت. اینجا به یوسف علیه السلام نبوت دادی شد اکثر علماء معتقدند همونطور که دیروز عرض کردم اون وحی که در چاه بود اون وحی به معنی الهام است، به معنی در دلش حرف افتادن است. و این به معنی چی هست؟ نبوت هست در چه سالی بود؟ الله بهتر میداند؟ حضرت اذرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که رئیس مفسران است، ایشون می فرماد: یوسف به سن ۳ سالگی به نوبه رسید. بندی صبحم عرض کردم که انبیا همیش به سن چهل سالگی رسیدند، مگر دوستیا استثناء هست یوسف، عیسی، یحیی. اینا را قبل الله اللہ نبوت داد لذا ابن عباس می فرماید کی سی ساله بود انجا سی سالگی شوامی دونید این جوانی هست وسط جوانی هست جوانی از بیس شروع میشه تا چهل میره لذا متوسطش و وسطش و قدرتش ہمون سی سالگی هست لذا اللہ تعالی هم ہم داد حکم یعنی حکومت علم يعني نبوات اما ابن عباس رضي الله عنه حكم بمعنى حكم نبوهات علم بمعنى علم شريعة ونجد أذكرنا من خدمة شما قبل ما خاند تعبير خابره قبل علم شريعة وحكومة دارية هم ميشه لذا عن ابن عباس أن الحكم النبوهة والعلم الشريعة يعني خداوان بهش حكم نبوهات داد وبش علم شريعة داد خب ارز کردم حسن بسلی میگه ابن عباس میگه سی ساله بود حسن بسلی میگه چهل ساله بود حسن بسلی میگه یوسف علیه و السلام چهل ساله بود و بعد خدا تعالی میفرماید وکذالک نجز المحسنین وکذالک نجز المحسنین یعنی این مخصوص یوسف نیست تمام مخلصین را محسنین به من مخلصین تمام مخلصین را انجور پاداش نیک ما دهیم یعنی بشون نبوت میدیم نه مراد نبوت نیست معنا اینه که عطاهای ویژه عنایت های خاص بهشون میدیم منظور اینه که هر انسانی هر شخصی که در ایمان و عقیده اخلاق و عمل خوب باشد با اخلاص باشد الله عزوجل به او یک نعمت میده یک ویژگی میده یا فهم و فراستی خوبی میده یا درک و دانایی و ریش سفیدی میده یا به او مال میده یعنی خدا از می میگیرت هر کسی که علم تقوا داشته باشد اخلاق و عمل داشته باشد ایمان و عقیده درست داشته باشد مثل یوسف علیه السلام راه پاکی را انتخاب بکند راه را انتخاب بکند الله عزوجل به او ویژگی میده یعنی او را خدا تعالی اجتماعی میگرداند یا به او فهم و دانایی میده که بقیه از او خط گیرند یا او را توفیق خدمت میده یا به او سیادت و سرداری و حکومت و مدیریت می ده یا به او مال و سرمایه می ده خلاص موقعیت اجتماعی خوبی الله برش فراهم یاره که بتواند بی دیگران نف برساند بی, بی دیگران خیر برساند چه کسی و کذالک نزل محسنین تمام بندگان مخلص و با ایمان و نیکوکار را ما انگونه جزائ نیک میدیم. لا اگر انسانی را دیدید که صاحب توفیق است برای مردم خدمت میکنه. برای مردم مثلا شب و روز به گرسنگان رسیدگی میکنه. شب و روز به مردم علم آموزه شب و روز مردم را تبلیغ و ارشاد میکنه. شب و روز مردم از وجودی او خیر میبین قطعا بدون که این سابقه خوبی داشته. در گذشته یک سری کارهای انجام داده مثلا کسی به یک جایگاه بلند هنر می رسد، پادشاه میشه، مدیر میشه برای مردم با خلاص خدمت میکنه مردم از وجود او ناف میبرند این را خداوند به اینجا سنده شخص به صورت شخصی هیچ کس هنری نداره حتی یوسف الله سلام یوسف چون دارای اوصاف خوب بود الله تا لب این جایگاه اورا رسانید. پس خلاصه همه چیز خلاصه میشه در الله. با الله خوب باش اون وقت پادشاهی کو با الله رابطه ای خوب درست کن اون وقت حکومت کن دنیا. لذا الله به هر جا طور میرساند. بالاخره یوسف و السلام به این جایگاه رسید از اون جایگاهی که آمد می‌بینید. در تاریکی یک روزنه ای هست امیدی هست اون آخر تبدیل به نور میشه برای یوسف همون شد اما یوسف علیہ السلام هنوز برای پخته شدن و برای کامل شدن باید مراحل دیگری از امتحانات را سفری بکند عزیزان خداوند از عز وجل بندگان خودش را امتحان می کند بعضی از امتحانات با سختی هستند بعضی امتحانات با نعمت هستند این نوع دومش سختره یعنی اگر من و شما مورد امتحان قرار بگیریم گرست نبیشیم اون وقت سخت نیست اون قدر سخت نیست که مورد امتحان بگیریم قرار بگیریم همه چیز داشته باشیم در ناز و نعمت باشیم در اون شرایط انسان وقتی که در سختی ها بیشتر بیادی خداست در این شرایط انسان شکست میخورد لذا قبلا امتحانات که برای یوسف بود امتحانات در سختی ها بود الان امتحان در امتحان نعمت است لذا انجا یوسف علیه صلی اللہ بسوی یک فعل نامشروع و بسوی یک کار نامشروع دعوت داده میشه. شه ببینید زمینه زمینه از هر جهت برای یوسف فراوان است جوانان یوسف را الگوی خودشون در پاکی و افت بگیرند یوسف و السلام از نظر زیبایی زیبا ترین انسان است رسول الله صلی الله علیه و وسلم می فرماید من در شب معراج وقتی که رفتم انبیاء الهی را دیدم از این انبیاء الهی یکی را که دیدم یوسف بود چنان زیبا بود که اذا اذا قد اعتیش شتر الحسن او كما قال علی الصلاه دیدم که نصف زیبایی جهان را خدا به یوسف داده یعنی شما تمام زیبایی روها یک طرف به اندازه زیبا روحای تمام دنیا نصفش را الله به یوسف داده بود نصفش را به بقیه دنیا یعنی نصفش را بین تمام انسانها تقسیم کرد. یوسف را از نظر ظاهری خدا چنان زیبا قرار داده بود که انشاءاللہ در بهشت ببینیم اونجا متوجه میشیم یعنی چه لذا رسول الله میفرمان در اون شب دیدم خب یوسف زیباترین انسان و بعض اون زلیخا که زن عزیز مصر است اونم زیبا ترینه زنهای پادشاهان و عمراء و سروزیرها شما میدونید اونا بهترین ها را برای خودشون انتخاب میکنند. و بعض در چه ناز و نعمتی در کاخ زندگی می کند و بعض کسی نیست که اونجا بالاخره کاری را مخفیانه انجام بده صاحب خانه خودش دعوت میده، زمینه را فراهم میکنه. درها را میبنده از هر جهت هیچ معنی نیست هیچ تهدیدی هم نیست هیچ مشکلی هم نیست فقط و فقط یک چیز انسان را نمیگذارد اون چیه؟ اون ایمان به خدا اون خوف خدا اون تقوا و خدا ترسی اون انسانی که براش زمین فراهم میشه و از خدا میترسه این دلیل پختگی ایمانش است. این دلیل کمال ایمانش است لذا این امتحان خیلی سخت لذا قرآن و وراودته اللتی هو في بيتها طلبید یوسف را خاص را خاست يوسف را طلب کرد طلبید او را هو في بيتها اون زنی کی یوسف در خانه او بود خانه و کاخ مال خودش بود از ادامه داستان یوسف معلوم میشه اون زمان چون دین نبود هنوز اینها اصلا با خدا آشنا نبودند و با پیامبری آشنا نبودند در اون زمان زنها حرف اول را میزدند و مردها جلوی زنهای خودشون نمیتونستن کوچکترین حرفی بزنم معلوم میشه چون دین ضعیف بود غیرت هم ضعیف بود بی غیرت بودند لذا همه چیز مال زن بود مرد می بینه می بینه که زن مقصره ولی چیزی نمیتونه بگه فقط خواهش میکنه یوسف به کسی نگو این هنر مرد بود که من بد نام میشم لذا الله میفرماید ورا ودته التي یوسف را اون زنی که اللتی هو فی بیتی ها اون کسی یوسف در خانه او بود عن نفسی چیش را تلبید خود یوسف را یعنی خودش را گفت بیا معلوم میشه که زلیخا از چندین وقت گرفتار یوسف شده بود ابتدای یوسف بچه بود بلاخره کم کم در خانه زلیخا رشد کرد بزرگ شد بعد زلیخا گرفتار شد و همیشه در صدد بود و چندین بار اشاره و کنایه کردی بود یوسف علیه الصلا و السلام هم متوجه بود یوسف نمیدونست کار بکنه برای یوسف مشکل بود بالاخره غلام خانه آنهاست اسیر اونهاست و جای دیگه نداره یوسف بالاخره تصمیم گرفته بود که فقط خودش را دور بکند از این مسائل تا اینکه زلیخا هر چی یوسف را اشاره می کرد به یوسف نزدیک می شد می که یوسف دوری میکنه یوسف هیچ علاغی نشون نمیده تا اینکه آخر علنی کرد این بار اول نبود این بار آخر بود این بار دیگه زد به آخر از اشاره به در آمد در ها را بست بهترین زینت و زیبایی خودش را بلا نسبت استفاده کرد و یوسف را هم گفت اونجا کسی نبود تمام موانع را برداشت الان یوسف گفت هی تلک بیا به بی تو دارم میگم بیا دیگه به بی طرف من من خودم را برای تو آماده کردم اینجا بود که یوسف علیه السلام هم صراحتا باش برخورد کرد و جواب داد آيات رأى برسيبكونيد وراودته التي هو في بيتها تلبيد أورا التي أنزنك هو في بيتها يوسف درخان أجبود عن نفسه يعني خد يوسف رأى وغلقت الأبواب تمام درهار بس تمام درهار قفل كردو بس وقالت هيت لك قالت هيت هيت از نزار زباني عربي اسم فعل هست حیط یعنی بیا لکت به بی تو دارم میگم کسی دیگه اینجا نیست تو را دارم میگم بیا به بی طرف من من خودم را برای تو آماده کردم یوسف علیه السلام وقتی دید که زلیخا دیگه تمام شرم و حیاء و هرچی هست گذاشته زیر پا و علنان داره بسوی فساد و بسوی زنا دعوتش میده یوسف علیه السلام چند چیز گفت یک قال ما الله بهترین چیز پنا بردم به خداست این امتحان واقعا امتحان سختی بود برای یسوع. قال ما الله گفت پنا به الله من به خدا می میبرم نکته دوم جواب دوم این ربی همانا اون عزیز مصر ارباب من است آغای من است او آغای من است من با او خیانت بکنم اونی که به من اینقدر لطف داره چون اگر از خدا بهش میگفت این نمیفهمید یعنی چه اگر از گناه میگفت نمیفهمی فقط معاز الله گفت ولی انهو ربی زمیر به طرف عزیز مصر است او رب من است یعنی آغای من است محسن من است به من احسان داره به من لطف داره احسن مثواي جای من را بسیار زیبا قرار داد نسبت به بقیه برده ها بینم مرا چقدر اکرام میکنه چقدر احترام میگذاره من چطور با او این خیانت را بکنم احسن مثواي مسوابی من جایگاه محل زندگی محل استراحت و جواب چارم انه لا يفلح الظالمون این اگر این کار رو من بکنم ظلم کردم ستم کردم هم در حق خدا و هم در حق آغایم انه شان است که لا یفلح الظالمون ظالمان هرگز رستگار نمی شوند گناهگاران هرگز رستگار نمی شوند اون کسی که گناه میکند او کامیاب نمیشه اون رستگار نمیشه لذا من نمیخوام که ناکام بشم نمیخوا که خائب و خاسر بشم لزم من این کار را نمی کنم. الله از در ادامه این وضعیت و شرایطی که یوسف داشت توضیح میده میفرمد والق حمت به زلخ که به صورت پخت تصمیم خودش را گرفته بود نسبت به یوسف یعنی به صورت قط جزم کرده بود اراده کرده بود تصمیم قطعی داشت که این کار را بکند اما یوسف وهم همم بها لولا ار برهان برحان یوسف هم نسبت به زلیخا قصد می کرد اراده می کرد اگر برحان رب را نمی دید اگر خدا به او برحان داد خدا به او مدرک داد لذا این مدرک باعث شد که یوسف انکار را نکند یعنی خدا حفاظتش کرد همه ما را الله حفاظت بکنه از فساد و از گناه ولی برای هر کسی خدا هر کسی را حفاظت بکنه برای او یک بحانه یک دلیلی را ذکر کرده یوسف مجرد هست خانومی هم ندارد جوانم هست ولی الله چطور حفاظتش کرد اللہ میگه اگر برهان رب را نمیدید یوسف هم قسم می کرد برهان رب چیه در این رابطه مفسرین خیلی تفسیرهای زیادی گفتند بعضی میگویند که خدا یک علامتی نشان داد یک آیه نشان داد که یوسف نکند این کار را چیه اون بعضی میگن که یوسف و السلام تو دلش آمد که زلیخا که این قدر میگه چکار بکنم تا میخواست تصمیم بگیره بالای سقف دید که یعقوب و عکس یعقوب را در دیوار دید که دست را به دندان گرفته یعنی داره ملامتش میکنه این روایت زیاد قوی نیست این اسرائیلی هست اگر انسان چینین چیزی ببیند یوسف که پیامبر است هر انسان عادی دیگه ببینی بی پدرش داره نگاه میکنه او انسان فوراً خودش رو عقب میکشه میترسه لذا این کمال نیست که یوسف چنین چیزی ببیند و یوسف دست میکشد بعضی دیگه میگویند که برهانی که خدا به یوسف نشان داد دلیلی که به یوسف داد اینه وقتی که زلیخا میخواست این کار را بکند تو همین اتاق خصوصی و خوابگاه خاص زلیخا بود تو این بوتی بود خدایش بود زلیخا اول اون چادر خودش را روسری خودش را روی بط انداخت یوسف گفت که چیکار میکنی چرا این کار را میکنی گفت چون اون اراده که دارم با تو میخوام این نبی نمارا این خدای من هست این خدا به ذهنش آورد که این که خدای دروغین هست خدای پوشالی هست اون خدای حقیقی که هر جا می بیند اون منو نمی بیند لذا این داعیه در دل یوسف پیدا شد یوسف نه این خدای عزوجل مار رستگار نمی کنه خدا که منو می بینه، این که نمی بینه، این سنگه ولی خدا منو می بینه، لذا برحان رب می گویند اینه و بسیاری از مفسرین میگویند که برحان رب نبوت است همین که خدا بهش نبوت داده بود یک نبی معصومه نبی هیچ وقت گناه نمی کنه خدای عزوجل یوسف را چنین ساخته بود ضمن این که فطرت بشری و اون احساسی که هر انسانی دارد نیاز جنسی انبیا خیلی بیشتر دارند ولی باوجود این اللہ تعالی انها را معصوم قرار داده و شیخ بزرگوار امامی فرماید که برهان رب استقامت و ربط قلب است من در بحث هدایت برای طلاب ارز کرده بودم که خدا تعالی ایک انسانی که استقامت ایک انسانی که هدایت بده درجات مختلف هدایت است چارمین درجه است ثومی و چارمی استقامت و ربط القلب یعنی وقتی که انسان استقامت می کند خدا دلش را غرص می کند بعد تمام دنیا جنب او را از هدایت منصرف بکنه نمی تونه پس این همون ربط القلب است این همون قرسی دل حضرت یوسف است که خدا تعالی به اشعنایت کرده بود لذا یوسف نزدیک نرفت لذا الله می فرماید هم بِهَا لولا الرءا برهان اگر برهان رب را نمیدید یوسف هم قسمی کرد اراده میکرد کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء الله میفرمایند این گونه انکار ما کردیم تا که منصرف بکنیم از یوسف دور بکنیم از یوسف السوء خیانت را والفحشاء زنا را یا سوء سو اراده زنا و خود زنا سوء سو اراده زنا الفحشا خود زنا و بعضی این سو خیانت را یعنی خدای تعالی می فرمیم ما یوسف را دلش را محکم کردیم تاکی یوسف بسوی گناه نره نه خیانت بکنی نه زنا بکنه. چرا؟ انهو من عبادنا المخلصين همانا اون يوسف از بندگان برگزیده ما بود اللہ او را برگزیده بود او را انتخاب کرده بود برگزیدگان خدا هیچ وقت لغزش لغزش نمی کنند پایشو نمی لرزه فریب نمی خورند لذا الله تعالی او را حفاظت کرد او را حفاظت کرد وقتی که یوسف حفاظت شد و از این کار باز آمد دید زلیخا اصلا خودش را آماده کرده حملوار است یوسف علیه الصلا و سلام دوید دوید به طرف در و استبق الباب هر دو سبقت گرفتن به سوی در یوسف جلو و زلیخا پشت سر و اینجا وقتی که رفتند الله عز و جل برای یوسف زمینه باز شدن در را کرد در را تا که گرفت در باز شد در الان چند تا بودند گرسی در داستان آمده هفت تا در بودند والله و عالم این در داستان است تو قرآن نیست و حدیث نیست یکی بود دوتا بودند تا بودند بودن، یا تا بودند معمولا یکی دوتا در که هست لذا هر دو به ثبت در رفتند و معلوم میشه که زلیخا عصبانی شد به خاطر این انکاری یوسف از پشت به یوسف حمله کرد و قدد قمیسه من دبرین پیراهنش را پاره کرد از پشت از پشت که گرفت یوسف نیستاد همونطور پیراهنش پاره شد و رفت وقتی که رفت به قدرت خدا هر دو سید را دیدند آغا را دیدند معلوم میشه که در اصطلاح، مصر اون زمان چون در عربی به شوهر سید نمیگویند در اون زمان در اصطلاح مصر باستان مثل ایران امروز به شوهر می آغا زن به شوهر چی میگه آغا میگه لذا بواسطه والف يا یا سيدها يا افتن آغای او را یعنی شوهرش را لذا الباب پیش در او تعجب کردی نه هر دو چرا می دوند یوسف جلو اون پشت سرش اما زلیخا خیلی مکار بود خیلی زرنگ بود فورا شروع کرد قالت ما جزاء من اراده به احلکا جزای کسی که نسبت به اهل تو همسر تو ای فتیفار ای عزیزی میستر کسی که نسبت به همسر تو سوء نیت داشته باشد جریمش چیه یه معنیش اینه که یوسف به من نظر بد داره یوسف به من حمله کرده مسئله را وارونه کرد مسئله رو عکس کرد این باز ببین لحظه به لحظه به امتحان یوسفی اضافه میشه چی هست جزای کسی که اراده بکنن نسبت به اهلت سوء بدی را یعنی زنا را اما یه وقتی با خودش میگفت که ما بعدا عزیز مصر عصبانی بشه گرچه درون عزیز این غیرت نبود عزیز مصر عصبانی بشه و حکم اعدامش را صادر نکنه این خاطر پیشا پیش خودش تائین کرد الا ان یس جن جزائش چیزی دیگر نیست مگر باید زندان بشه زندان را تائین کرد از اینکه چیز بزرگی نشده وقتی کاری دیگر باش داشته نباشید فقط زندان الا ان یس جن مگر اینکه زندان بیشه او عذابون علیم یا عذاب دردناک مثلا چند ذرب شلاغ لذا کسی که نسبت به اهل تو ای است، چنین قصدی دارد سوی نیتی دارد سوی ارادهی دارد باید تو زندانش بکنی یا اینکه باید او را شکنجه بیدی او را بزنی یوسف علیه صلی اللہ دیگه اینجا چاره ای ندارد به از اینکه از خودش دفاع بکند انسان وقتی که در مواضع تهمت قرار میگیرد سنت انبیا همی همین است که انسان از خود دفاع بکند دلایل پاکی خودش را بگه ببین دلیل بین دلیل من نیستم لذا یوسف علیه صلات و السلام مظلومانه گفت قال هی راودتنی این مرا طلبید از نفسی خودم را خواست به خودم گفت تو بیا پیش من این خاص بالاخره عزیز مصر منده بود که حرف کدوم را باور بکنه یوسف ربی یوسف امیتو مد داشت زلیخا که زنش بود باش زندگی کرده بود فکر نمیکرد که زنم با من خیانت میکنه لذا در دوراهی بود که الله عزوجل شاهدی را حواله کرد الله تعالی پیغمبرانش را خاصانش را در سختری شرایط کمک می لذا اللہ عز و برای یوسف نصرتی فرستاد کمکی فرستاد و شہد شاهد من اہلها شاہدی آمد گواہی داد از اہل زلیخا از اہل زلیخا از, از نخیشان زلیخا از نزدیکان زلیخا گواہی داد خب این شاهد کی بود؟ بسیاری معتقدند که این شاهد تفلی بود ای بود که به سخن آمد چون در بعضی روایت ها هست که تا بچه در تفولیت صحبت کردند در اون روایت ها اسم این بچه هم هست اما بیشتر علماء ما معتقدند که در اون روایت های صحیحی که ستا بچه اسمشون هست که در طفولی صحبت کردن این بچه اسمش نیست لذا ای نبود بعضی مفسران میگم تفلی بود بعضی میگن بچه نبود تفلی نبود چنانچه حضرت حسن بصری حضرت اکرامه شاگرد ابن عباس قطاده مجاهد همه میگن لم یکن صبیعا این, آغ... این شاهد بچه نبود ولیکنه کان رجلا حکیما زار رعی یک مرد حکیم و فهمیده بود و دارای رعی بود رای و فکری داشت اغلی داشت درک و درایتی داشت وقال ابن عم المرأة اصلا پسر موی زلیخا بود تو کاخ کار میکرد تو قصر اونها دفتر داشت او سرسره شنید ببینی معلوم میشه که بچه نبود به خاطر اینکه این کارشناس بود این با دل با دلیل داره صحبت میکنه اگر بچه باشه نیاز به دلیل نیست همین که بچه از گهواره داره صحبت میکنه بزرگترین دلیل خود همینه اما این ببین این به اصطلاح مردم امروز گویا کارگاه بود این کار بود این گفت که شما بیایید و کارشناسی بکنید نگاه بکنید پیرانش چطور پاره است خب دلیلی گفت که قانی کننده بود برای همگان اگر از جلو پاره است مشخص یوسف حمله کرده زلیخا درست میگه یوسف حمله کرده زلیخا از خود دفاع کرده پیرانش پاره شده اگر از پشت پاره است معلوم میشه که پس زلیخا دروغ میگه یوسف در حال گریز بوده در حال فرار بوده زلیخا از پشت او را گرفته و پیرهنش پاره شده لذا با این کارشناسی که ارادات عزیز مصر هم قانوش و, و درسته نگاه کردن دیدن از پشت پاره است دیگر زلیخا ملامت شو سرش پایین آمد و يوسف عليه الصلاه والسلام تبرئ شد لذا يوسف گفت قال هي راودتني عن نفسي اين بود ان نفس من را خود من را طلبيد وشهد شاهد من اهلها गवाهيدات गवाهي از اهل زليخه از نزديكان زليخه وان كيفت بين صورت ان كان قميصو قد من قبل اگر قمیسش پاره شده پیرهنش پاره شده از جلو فصدقت پس راست میگه زلیخا و هو من الكاذبین پس یوسف از دروغگویا است و ان قمیسه قد من دبر اگر قمیسش پاره شده از پشت فکذبت پس دروغ میگه زلیخا و هو من الصادقین یوسف از راس گویا است فلما را قمیصه قد من دبر زمانی که دید عزیزی مصر قمیسی یوسف را پیراهنی یوسف را قدام دوبارین پار شده بود از پشت سر قال انهو من قید کن عزیزی مصر گفت ای زلیخا این قید شماست این مکر شما حیلگری شما این توتی مال توی این کید کن عظیم همانا توتی و مکر شما زنان خیلی بزرگه لذا ببین کاری دیگه نکرد معلوم میشه هر قبلا هم ابتدای دستم ارز کردم هر قومی که در اون قوم دین نباشد غیرت هم نیست غیرت را دین میاره در حدیث میاد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمود که خدا غیور هست پیغمبرش هم غیور هست وقتی که دیندار باشی درس غیرت هم بهت میرسه غیور میشی اما این قوم چونکه دین نداشتند بود پرست بودند غیرت هم نداشتند فقط همین میگه زلیخا تو, تو توتعه کردی تو مک کردی خطرناکی تو این الان تنبیش شد دیگه کاری نکرد و بعد به یوسف میگه یوسف و اعردن ای یا یوسف ای یوسف از این بگذر از این بگذر دیگه به کسی نگو معنیش اینه تعریف نکن و به صلیخا گفت که وستغفری لذنبی که برای این اشتبات از یوسف معذرت بخوا اینکه استغفار از خدا ایمان به خدا نبود از یوسف معذرت خواهی بکن اینکی کنت من الخاطئین که تو خطاکار بودیش تو ما مال تو بودی لذا به همین بسنده کرد به همین اکتفا کرد این اول و آخر فیصله شد یک نکتهی که اینجا ذکر بکنم ارز بکنم اینجا درباره زنها گفته شده انکید کن عظیم مکر زنها و توت زنها بسیار عظیم است بسیار بزرگ است در سوره مبارکه نساء شما خاندید درباره شیطان آمده این نکید شیطان کان ضعیفا کید شیطان ضعیف است الان این هر دعایی را بعضی در کناری هم قرار میگدن میگن که مکر زنها از مکر شیطان هم قوی تر است این غلط است این اشتباه است اگر زن یک وقتی گمراه بشه و مکری داشته باشه به سبب اینکه شیطان او را آموخته همونطور که شیطان مرد را هم گاهی مکار میکنه مرد را فریب میده گاهی زن را فریب میده پس اینکه این آیه را با اون آیه در کنار هم قرار بدیم بگیم که کید شیطان ضعیف است مکر شیطان ضعیف است مکر زنان قوی هست و عظیم است این درست نیست و به این صورت اگر کسی بخواهد به زنها توهین بکند اصلا به اون جنس این کار اجتماعی هست کار غلطی هست توجیه چیه خب قرآن گفته دیگه قرآن میگه کید شیطان ضعیفا و اینجا میگه کید کن عظیم اصلش اینه که ببینید اینجا کید زن در مقابل کید مرد است چونجا بحث بحث یوسف و زلیخا هست اونجا کید شیطان در مقابل تدبیر الله است بحث بحث جهاد اونجا الله تعالی می فرماید که بلاخره شیطان تدبیر میکنه مکر میکنه توتعه میکنه ولی من رب هم برای پیروزی شما برای موفقیت شما مجاهدین تدبیر میکنم این نکی شیطان ضعیف کان زعیفه مکر شیطان زعیفه شیطان در مقابل الله و اراده الله چی غلطی میتونه بکنه هیچی نمیتونه بکنه پس که شیطان ضعیفه در مقابل چی؟ در مقابل تدبیر الهی تدبیر الله اما اینجا که بزنگ گفته شده ان کید کن عظیم بله نسبت به مرد چی هست بزرگتر است مرد بیچاره اینقدر بلد نیست الا ماشاءالله لذا ان کید کن عظیم کید شما عظیم هست علی ای حال به یوسف گفت ای یوسف تو دیگه باز بیا بیشتر این را کش نده بیشتر مطرح نکن همین جا یوسف علیہ السلام از سودا میخواد که این فتن خاموش بسید جای دیگه نگه کسی نشنود ولی معلوم میشه که از طرف یوسف نه از طرف زلیخا خبر به بغیه مصر رسید به تمام از کنم که خانواده های درباریان رسید کسانی که در کابینه عوض بودن های اونها تمام متعله شدن که زن عزیز مصر چنان مطالبه از برده خودش کرده دورا دور شنیده بودند که این برده و این غلام خیلی زیبا رو هست خیلی زیبا هست لذا اللہ تعالی اینجا امانت را اینجا امتحان را بر یوسف سختتر تر می کنه امتحان مشکل تر می قبلا یک زلیخا بود الان بست زلیخا سیتا زلیخا چندی زلیخا در مقابل یوسف قرار دارند الله می فرماید و قال نسوات فی المدینه زنهای در شهر گفتند فی المدینة در شهر مصر گفتند امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه زن عزیز تلابیده غلام خودش را عن نفسی خودش را به خاطر کاری بد، غلام خودش را، خادم خودش را تلبده و خواسته با او چینی کاری بکند و مسخرش کردند، قد شغفها حب با، در دل او جای گرفته در رگو ریشه او جای گرفته، محبت این غلام، عاشق میشه برای ایک برده برای غلام. این ننگ بره تو این می گفتن تا ب زلیخا خبر برسه زنها با هم دیگه رقابت دارن دیگه انا لنراها فی ضلال مبین ما این زلیخا می بینیم در حماقت و بیاغلی آشکار ضلال اینجا به من حماقت نادانی هست خیلی نادانه تو که میخوای ارتباط داشته باشی با کسی که در حد تو باشه از اشراف باشه از بزرگان باشه ببینی این کار را شنی نمیدانند این کار را بد ند میدانند چون عرض کردم ایمان که نیست غیرتم نیست اما نبا غلام خودت نبا برده خودت ببینید زنها که این حرف را زدند اونا دلشون برای زلیخان سوخته بود و اونها رحمشون بر زلیخا نیامده اماده بود. اونها میخواست این حرف به زلیخا برسه تا زلیخا اونها رو بخواد توزی بدن. هدف این بود که زلیخا از اونها دعوت به عمل بیاره و اونها پاشون به کاخ زلیخا باز بشه به قصر زلیخا باز بشه تا یوسف را ببینند. اونها هر یک این مکری بود از طرفیونها چون قرآن میگه ما سمعت به مکری هن زلیخا چی را چنید؟ مکری اونها را میشه شه اونا مکار بودند اونا اعتراض نکردند اونا مکر کردن. اونا کردند اونا توطعه کردند زلیخا متوجه شد اینا دلشو میخواد یوسف را ببینه باشه زلیخا یوسف را نشان داد نشان دادن زلیخا به چند جهت بود یکی میخواست بگه که اگر من این کار را کردن کارم توجی داره غلام هست ولی ارزشش را داره این میخواست بگه و میخواست که جلوی اونها پزی بده به عنوان یک افتخار که من چنین غلامی دارم که تمام آغاهای شما هم در حد این غلامی من نیستند لذا زنها در همین چیزها اون زمان رقابتشون بود لذا فلما سمعت بمكرهن زمانی که زلیخا شنید مکر آنان را معلومی شونه مکه اربودن توطعه کردن که بیایند پاشون بقاسر باز بشه ارسلت الهن بسوی انها فرستاد قاسد فرستاد بیایید شما امرو زاوت منسید و اعتدت لهن متکعا برای اونها جاهای برای نشستن و برای تکیه دادن آماده کرد یعنی پذیرائی را آماده کرد برای نشستن و بعد و آقات کل واحدهایی می‌نن سکینا به هر یک کار دیداد کاری دی برای میوه برای از کنم که استفاده کردن غذای میوه هر چی باشه، بلکه متقاضی بود که اینها وقتی که وقتی که ببینند برای اولین بار خوب زلیخا دیده بود همیشه عادت کرده بود برای اولین بار اگر کسی ببیند عقل سرش میره بلای سر خودش میاره لذا گفت که بی یوسف هم دستور داد چیزی که در تفسیرها نوشته یوسف خودش نیازی به لباس زیبا نداشت یوسف خودش کل زیبایی بود اما یوسف را دستور داد که لباس خوب بپوشه شیک پوش بشه خب الان یوسف چرا تبعیت کرد یوسف چاره ای نداشت اولا از مکر زلیخا خبر نداشت بعد یوسف برده هست غلام هست و بهترین غلام اونه که فرمان ببره هرچی بهش میگند مگر اون فرمانی که معصیت باشه لذا زلیخا میگه اون لباس خوب بتانید کن بیا اینجا خدمت کن خب یوسف میاد این کار رو میکنه لذا الله می فرماید وا اتت کل واحده سکینه داد به هر یک از آنان کار داد چاغوی داد وقالت خرج عليهن بيوسف كفت اخرج عليهن برنه بي خارج شو بیا بیرون بيرون بي جلوينه ظاهر شو به بهانه‌ای چیزی بیار فلما راینه اکبرنه زمانی که این زنها یوسف را دیدند بدلیل حسن جمال اکبر نهو بسیار بزرگ دانستند اورا. یعنی به چشم اونها یک جلالی، یک عظمتی، یک زیبائی که از حد انسان بالاتر بود به چشم اونها آمد چنان مدروشش شدند، چنان خیره یوسف شدند که و قطعن ایدیهن دستشون را بریدند بجای اینکه میوه را ببرند بجای اینکه میوه را کنند تکه تکه کنند پوست و گوشت خودشون را تکه تکه کرد اصلا حواسشون انسان حواسش پرت باشه همین کار را میکنه نه بجای بعضی آهستم بجای لقمه غذای چیزی دیگر بدهن میبرم بعضی گوشی از بس با گوشی سر و کار داره حواس که پرد میشه انسان کارهای دیگه میکنه آقای حواسش پرد اینکش روی پیشانیش میگه اینکم اینک اینجاست انسان وقتی که واقعا خصوص در چنین موقعیتی اینا هم انتظار میکشند و بعد چه ماهی اونجا تلو میکنه لذا انها بی اختیار شدن، بی حال شدن، و ایدیهن ایدیا هون نه دسایشون ربودند، وقل نحاشل الله ما هذا بشرا پاکی برای خدا خدا و پاکی. این حاشل الله استلهای است. یعنی وقتی که شما، شما مسلمانان تعجب میکنیم گی میکنی میکنی سبحان الله. این کلمت تعجب هست. گفتن سبحان الله. ما ها از بشر این بشری نیست این که فرشته هست فرشته را کسی ندیده. ما هم نمی فرشته چه شکلی داره ولی در ازهان انسان هاست که فرشته زیباست چون فرشته از نوره هیچ چیزی از نور زیباتر نیست زیبایی ها را در دنیا چی ایجاد میکنه نور ایجاد میکنه لذا گفتن که ما هذا بشرا این بشر نیست این هذا الا ملک کریم نیست این مگر فرشته معزز هم از نوع خوب فرشتگان از همون بالا بالا هست که خدا نصیب زلیقا کرده همه الان حسرت خوردن که خوش آبیال زلیقا که چینی چیزی در خانه خودش داره الان خ بیچاره میگه متوجه شدید که من عذر داشتم متوجه شدید که مرا بی خود مللامت می کردید قالت ف فظال ک لظلم تون این هست اون چیزی که مرا ملامت کردید در بار این. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عن نفسی الان برای بار اول زلیخه اقرار میکنه اعتراف میکنه بله من را تلبیدم من را خواستم خودش را خواستم که باش اینکار را بکنم اما فَاسْتَعْسَمَ او پاک در آمد ای فَمْتَنَعَ امْتِنَاعًا شدیدًا او باز آمد بشدت باز آمد او معصوم در آمد و او اینکار را با من نکرد ولی من جلوی شما تهدیدش میکنم کنم شما گواه باشید. و باشید ف اگر این کار را نکند که من بهش امر میکنم من دارم بهش میگم لا یست حتما حتما زندان میشه. او فکر می کرد یوسف از زندان می ترسه و من صاقیرین حتما حتما از انسان الان که عزتی داره اما از ساغرین میشه ساغر به من زلیل پست دیگه کسی که گوشه زندان افتاده پست و ذلیله از اونها خواهد شد میخواد این عزت را از دست بده من طالب بیش مهلت دادم فرصت دادم اگر این کار را نکند حتما من در زندانش میبرم یوسف علیه صلی در تنهایی با ربش مناجات میکنه ببینید برای یوسف خیلی سخته این امتحان عرض کردم امتحان تطمیع امتحانی که با سختی نیست با خوشی است تو این امتحان اکثرا ناموفق میشند اکثرا گرفتار میشند یوسف علیہ السلام پریشانه دعا میکنه با ربش راز و نیاز داره قال رب گفت ای رب من ای خدای من ای تربیت کننده من ای پرورش دهنده من از و احب و زندان برای من محبوب تر است مما یدعوننی الی از اون چیزی که آنها مرا فرامی خانم بسوی آن گاهی انسان وارسته انسان با ایمان میگه بجای اینکه گناهی بکنم بذار من گرفتاد بشم بذار برای من مشکلات بیاد بذار مریض بشم ولی گرفتار نشم لذا زندان برای من محبوب تر است از آنچه که اینها مرا فرا میخانند ببینید کسانی که عربی بلد هستند میدونه یدعونه سیغه جمع موننس است مگه چند نفر دیسوف را دعوت دادند از اینجا معلوم میشه همه مفسرین نوشتند که اون زنهایی که مهمان بودند اون زنها به زلیخا گفتند که زلیخا تو حق داری تو اجازه بده که ما غانش میکنیم هر یکی گفت گفت چند دقیقه به من اجازه بده من میتونم غانش بکنم گفت باش اجازه داد پیش یوسف بره هر یکی میرفت پیش یوسف گفت یوسف زلیخانم من هر کسی به سوی خودش دعوت میدند این هر یکی وقتی که دیدند لذا یوسف علیہ السلام و سلام سوی خودش این این سیغه جمع مؤنث هم دلالت برین میکنه یدعوننی الی آن زنها مرا دعوت میدن نگفت که زلیخا مرا دعوت میده آن زنها مرا دعوت میده معلومی میشه که همه زنها دیگه عام شد بی و اِلَّا تصرف عَنِّي كَيْدَهُنَّا بار الهه اگر مکر همه را ببین همه زنها را اگر مکر همه انها را توتیه همه انها را از من منصرف نکنی خدایا من بنده ضعیفی تو هستم اسبو الههن بسوی انها تمایل پیدا میکنم و اکب من الجایل اون وقت من جایل میشم خدایا من خودم را تو بستم من به تو متوسل میشم تو مرا از مکر نجات بده و مکر انها را از من برگردان مرا حفاظت کن لذا تمام زنها تمام ایام دیگه بعد از اون یوسف را به راحت نگذاشتند هر روز یک گروهی می آمد کسی می آمد زلیخا به من اجازه بده اون می گفت به من رو بذار بلاخره تا اینکه یوسف علیه السلام زار زار گریه می کرد و دعا میکرد کرد که خدا اینها را منصرف بکنه. آخر تمام اراکین مصر به این نتیجه رسیدن که یوسف را به زندان بندازن نه تنها عزیز مصر بقیه وزیر وزره هم رسوا شدن تمام زنهایشون تمایل به سوی یوسف داشتند لذا اللہ می فاستجاب فستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن اجابت الهی رب برای یوسف اجابت کرد بس دور کرد از آنان کیده از یوسف دور کر قید زنها را مکر زنها را انهو هو السميع العليم. اللت این همانا رب هر سخن را شنواست، هر حالت را داناس می دونه لذا الله تعالی کاری کرد که یوسف بره از شر این زنها خلاص بشه ثم بدع لهم من بعد ما رأو ال سپس یعنی چطور خدا منصرف کردی صفره از اونها نجات داد به این صورت. سوما من بعد ما اول آیات سپس ظاهر شد برای آنان بعد از اینکه آیات را نشانات را دیدند علائم را دیدند دیدن, دیدن وضع همهشون خرابه همه زنهایشون در خطر هستند همه این تمایل را دارند لیس جنون نهو حتما حتما او را زندان کنند به این نتیجه رسیدند همه حتی تا این تا مدت تعین بالاخره به فراموشی سپرده بشه کار تمام بشه لذا یوسف را به همین نیت بردن زندان کردند گرچه سختی دیگری برای یوسف بود امتحان دیگری بود اما از اون جهنم اولی این بهتر بود از اون ده برای یک دیندار برای یک پیغمبرزاده و پیغمبر چینین چیزی که براش مطرح بکنند به مراتب زندان بهتر این. لذا یوسف علیه سلام به زندان انداخته شد و رفت به عنوان یک مجرم این واقعا ظلمه که تمام مجرم ها نشستند و اونی که پاک است اونی که معصوم است او را زندان میکنند مجرم شده زندانبان شده رئیس زندان شده دستور دنده همین زنها شوهرهایشون خودشون مجرم بودند در دنیای امروز هم داریم که بعضی وقتها هستن که گناه مال خودشون هست به جای اینکه برای گناه خودشون عذرخایی بکنند ابریه را بی گناهان را به زندان میندازن میخوان بالاخره پرونده درست بشه و مسئولی برای این پرونده و گناهکاری باید شناخته بشه چند تا آدمی گناه باید بره زندان لذا همین کار با یوسف شد برای اینکه این قضیه جمع بشه گفتن یوسف به زندان بره ولی از طرف یوسف برای این زندان راضی بود نه اینکه اینقدر این, این طولانی بشه الله می فرماید و دخل معه سجن فتیان همرا با یوسف داخل زندان شد دو تا جوان دو تا جوان بودند اینها ای داشتند در اون زمان ای بعضی افراد دیگه داشتند رغبای پادشا بودند که میخواستن پادشا را از بین ببرند و اونها توتعی کردن پادشاه را زهر بدن، سم میش لذا یکی از اینها اونطوری که معلوم میشه خباز پادشا بود، آشپز بود، نانوها بود هم نان درست میکرد، هم آشپزی میکرد و یکی دیگه ساغی بود اونی که مسئول شراب بود شراب درست میکرد مشروب برای پادشاه همیشه آماده میکرد به این دو این دور افرادی از رغبای پادشاه خریداری کردند و گفتن شما به شما اینقدر پول میدیم این کار را بکنید هر دو آماده بشدن سم آماده کردن اما در آخرین لحظه اون کسی که ساقی بود اون پشیمان شد. به پادشای گفت که نخور این مسمومه دیگه اون خباز لو رفت اون خباز به خاطر اینکه خودش را تبره بکنه اون گفت که خودش این کار را کرده این سم را خودش ریخته این گفت نه اون کرده تا اینکه هر دور پادشا فرستاد به زندان تا تحقیق بشه تا زمان تحقیقاتی تو زندان بودن لذا خواب را طوری دیدن که این خواب به ذره اونی بود که پشیمان نشد سم را ریخت و اون کسی که پشیمان شده بود و پادشاه را آگاه ساخت اون باید نجات میافت. معنای خواب همین بود. یوسف علیه و هم همین طور تعبیر کرد. اما قبل از تعبیر ببینید یوسف علیه و سلام معلوم میشه که قبل از اینکه به زندان بره دعوت را آغاز کرده بود. چون ما خاندم خداوند بهش نبوت داده بود. کم کم مردم را دعوت می‌داد، مردم را با خدا، با خدا پرستی،, یک تا پرستی، آشنا پرستی کرد. بر علیه بود و بود پرستی. سخن می‌گفت. اینجا هم موقعیت کی آمد اینجا هم بالاخره شرایط خوب بود تمام زندانی ها را جمع کرد و برایشون تبلیغ کرد توحید گفت و دخل ما هستجن نفتیان داخل شد همرا با یوسف دوتا جوان قال احدهما یکی از دو گفت اینی ارانی اعصر و خمرا من خودم را در خواب دیدم که می شراب یعنی انگور را فشار می دادم انگور می و آبشو میکردم و شراب برای پادشا درست میکردم و قال الاخر دومی دو گفت یعنی خباز گفت نانوه گفت اینی ارانی احمل فوق رأسی خبزه من خودم را دیدم که حمل می کردم باره سرم نام حمل می کردم نام داشتم برای پادشاہ می آوردم کہ تأکل تطیر من ہو پرنده از بالا می آمد و نان را که روی سرم بود می خورد نبینا بما به ما خبر بده تعویل این خواب و تعبیر این خواب چیه اینا نراک من المحسنین ای انسان ما تو فرد محسن و مخلصی می بینیم یا فرد نیکوکاری و کاری می بینیم می بینیم اینجا خیلی اخلاقت خوشه خیلی خدمت می خیلی حشاش و بشاش هستی به همه زندانیان تسلی میده آرامش میده هم دردی میکنی لذا دست بسرشون می کسی آدم خوبی معلوم میشی لذا اگر بلد هستی این خواب مارا بگو من این خواب چیه یوسف علیه صلی اللہ اول اطمینانشون داد که خواب شما رو من بلدم تعبیرش را چون اگر نمی گفت من تعبیر بلدم شروع می کرد تبلیغ می کرد اون می گفت این از یک وعدی دیگه داره صحبت می کنے. گوش نمی کردم اما پیشاپیش گفت که من تعبیر خواب شما را بلد تا اینها اول تبلیغ من گوش کنند معزه من گوش کنم بعدن تعبیر خواب خودشون را از من بگیرند لذا این یک مقدمه بود عز و الله عز وجل این فرصت را برای یوسف علیه السلام فراهم آورد قال لا یاتیکما طعام ترزقانی پیش شما نمی آید آیت غذایی که ترزقانی شما غذا داد بشید امروز یعنی قبل از نهار ظهر الا نباتكما بتاویله مگر اینکه من به شما خبر میدهم تاویل خواب شما را تعبیر خواب شما را قبل ان یعطی ما قبل زینکی غذا شما دو نفر بی من تعبیر بلدم ذالک ما مما علمانی رب ربی این چیز یعنی تعبیر خواب هر دو شما از امواردی هست که رب من به من آموزش داده رب من به من یاد داده من یاد دارم اما قبل از اون من یک مساله مهمتری میخوام به شما بگم انی ترکتو ملته قوم لا یؤمنون بالله وهم بالاخرتهم کافرون ای رفقا زندانی من من ترک کردم دین اون قومی را که ایمان به خدا یعنی به توحید خدا ندارد و هم چنین ایمان به آخرت ندارد و هم بالآخرت هم کافرون آنان نسبت به آخرت کافر و منکر هستند یعنی هم مبدع را قبول ندارند هم معاد را هم توحید را هم قیامت را من این دین را نمیخوام. من چنین دینی ندارم منظور اینه که شما همین دین را دارید شما در توحید مشکل دارید قیامت را هم قبول ندارید قیامتی هست و بعد خود پس دین چیه واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب من پی رویمی کنم از دین پدرانم یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب من پی روی دین انها هستم دین اونها مگه چیه خلاصے دین اونها خلاص دین انبیائین ما کان لنا ان نشرک باللہ من شئی سزاوار نیست برای ما لایق نیست برای ما اینک شریک بگیرین بی اللہ هر چیزی را سزاوار نیست ما بیایم شریک خدا قرار بدیم بوتی را یا مخلوقی از مخلوقات خات خدا را یا بندی از بندگان خدا را نا درست نیست برادران من این اینو شرک نکنید اشاره میکنه که شما داری میکنید انجام میدید. و این این دینی که من دارم این فضل خدا است این خیلی لطف بزرگ خدا بر من کرده ذالک من فضل الله علینا و علی الناس این دین و این عقیده یعنی عقیده توحیدی عقیده یک تاپرستی من فضل الله علینا فاز فضل الله اس کی برماست و علی الناس برمردم هست هر کسی که بین دین بی فضل خدا بر او هست اما مردم اکثر مردم سپاسگزار گزار نیستند ولیکن اکثران ناس لا اما اکثر مردم شکر نمی کنند جلال نویشت فیشرکون بجای شکر شرک می کنند یا ایوها الانسان ما غرک بربک الكریم ای انسان نسبت به رب کریم چی چیزی تو را فریب داد این رب کریمی که این همه احسان به تو داره تو شریک میسازی با او. لذا خدا انتظار داره بنده من شاکر باشه اما بنده میشه شه مشرک چقدر این بنده خدا را ناراضی می کنے ولیکن اکثر ناصل آیش کرون اکثر مردم شکر گزار نیستند در هر زمان امروز شما نگاه کنید امروز که علم و دین و روشنی همه جا آمده اکثر مردم دنیا مشرکند یا خداپرست مشرک همونا که خودشون را متدین میدانند یا عیسی را عبادت میکنه یا سلیب را یا مریم را یا جبریل را یا اوزیر را یا مجسمه بودا یا نمیدونم دونم را یا فلان را یا خورشید را آتش را هر یک ایک چیزی را عبادت میکنه اکثر مردم مشرکان و شکرگزار پروردگار نیستند اهل ایمان اهل توحید اهل سجده که فقط یک رب را عبادت میکنند کمند الحمدلله من و شما جزو آنها هستیم که هیچ کس دیگر را عبادت نمی کنیم بجز الله زیرا الله می فرماید ولیکن اکثر الناس لا يشکرون. و بعد یوسف علیہ السلام چه دلیل زیبایی ذکر بیکنه دلیل اقلی یا صاحبی السجن ای دو رفیق من دو همراه من دو همراه زندانی من ارباب متفرقون آیاء ارباب زیادی بهتر است انسان ده تا رب داشته باشه ده دا تا آغا و صاحب و مالک داشته باشه ام الله الواحد القهار یا اون اللهی کہ اون الله واحداس قهار اون الله غالب اس مسلط اس بر همه دوست دوست و دشمن او مسلط است خودم صورت بهتر این کہ ما ده تا خدا داشته باشیم یا یک خدا یک خدایی که دارای این صفات والا هست و بدونید ای من این من راهانیمن اینکه شما غیر خدا را پرستش میکنید و نامهایی برایشون گذاشتید ببین بطر خواصی برایشون تعریف کرده بودند مثلا یک می میگفت این بطر هزار است یعنی در اینجا که باشی در خانه باشی این عبادت کن این بوت دیگه بوت سفر است چرا او میتونه اینجا مشکلاتت حل کنه تو سفر این نمیتونه این یکی مال سفر است این بوت مثلا برای تجارت خوبه این یکی برای اولاد خوبه هر بوتی میگه یک تاثیری داره این بوت مثلا مریضی شفا میده اون یکی دیگه فرزند و بچه میده به آدم این صفاتی برایشون ذکر کرده بودن که این صفات را میگه شما درست کردید پدرانی تو درست کرده یکی نمیدونم شفا دهنده یکی بچه دهنده یکی رزق دهنده کی گفته اینه همه خداست این صفاتی که ما برای بعضی از بندگان خدا نام گذاری میکنیم این صفات صفات خدا هستند صفات بندگان خدا نیستند مثلا چند بار ارز کردم تکرار میکنم تا مسئله خوب تفہیم بشه ما یکی از بزرگان و از اولیاء خدا را نامش را گذاشتیم غوث پاک مردم همی هم میگن غوث پاک میدونی معنی غوث پاک چیه؟ یا غوث اعظم چیه؟ یعنی اون کسی است که بفریاد ما میرسے ایش شرک این نام را کی, کی گزاشتے کسانی کے قبل از ما بودن جاہل بودن نمی دونستان تا کجا فریاد ما محبیرہ اللہ از غوث اعظم اللہ از فریادرہ سے حقیقی نام کسی دیگر را چیزی دیگر گزاشتا کسی دیگر را چیزی دیگر اوصاف خدا به بندگان خدا دادن ایش شرک یوسف همی نمی میگه ماتا بدون من دونیهی الا اسما عبادت نمی کنید غیر از خدا مگر نام هایی را نام گذاشتی شما اونا سنگند این نام ها را شما گزاشتید سمیتموها نام گزاری کید را انتم شما و اباؤکم و پدران شما ما انزل الله بها من سلطان الله عزوجل هیچ دلیلی هیچ مدرکی برای این نام گزاری نازل نکرده هیچ دلیل وجود ندارد ان الحکم الا لله نیز حکم مگر برای الله است یعنی هر فیصله میکنه خدا میکنه کوچک و بزرگ مریضی را شفا میده اولاد میده باران میده کوچک بزرگ مشکل کوچک مشکل بزرگ همه به دست خدا این الحکم و تمام احکام تمام فیصله مال خدا الا لله لله لام اختصاص فقط برای خدا غیر خدا حتی پیغمبر نمیتونه که فیصله بکنه و بی کسی بچه بده، ده کسی مریضی بی یا شفا بده. و این خدا کی قدرت بی دست او هست بی ما چی دستور داده امر الا تابدو الا ایا اون خدا امر کرده که عبادت نکنید هیچ کسی را بجزعو فقط او را عبادت کنید ذالک الدین القیم دین استوار همینه دین محکم همینه دینی که در اون یک تا پرستی باشه فقط خدا پرستی باشه دین اصلی اینه ولیکن اکثر الناس لاعلمون بعضا اما اکثر مردم نمیدانند دانند با خدا شریک می سازند و از غیر خدا کمک می گیرند از غیر خدا استعانت می طلبند در حالی که کمک را فقط از خدا باید گرفت ایاک نعبدو و ایاک نستعین ما حرکت میخانیم معنیش چیه خدای فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط و فقط از تو کمک میخوایم از کسی دیگه کمک نمیخوایم معنیش همینه رضا اللہ میفرماید ولیکن اکثر الناس لا يعلمون خلاصه یوسف علیہ السلام باچی زیبائی تبلیغ اشرا کرد پیام پروردگار را که پیام یک تا پرستی هست و پیام نفی شرک هست به این دوتا رفیقش و دو تا دوتا همبندش بیان فرمود حالا یوسف علیه صلی اللہ بر اساس وعدهی که کرده تعبیر خوابشون را میکنه بعد از تبلیغ تویید تعبیر خواب یا صاحبی سجن ای دو هم من ای ہمراہان زندان من اے رفقاء من اما احدکما فیسقی ربه خمراء اما یکی از شما ہمونی کے خواب دیدے کہ من دارم برای پادشاہ شراب درست می کنم او ہمون طور دوبارہ میرے بشغل شدام میرے اما احدکما یعنی ساقی فیسقی ربہ خمراء آغای شراب پادشاہ را چکار می شراب برایش درست میکنه سقایر را دوباره شروع میکنه یعنی شراب دادن و تقسیم شراب و اما الاخر اما دیگری دیگری یعنی اون کسی که خباز بود نانوا بود او به زده میشه او بدار می او دار آویخته میشه فتاکل و طیرم رأس پرند میاد از سرش میخوره یعنی تاثیر روزون را آویزان میکنه پرند میاد سرش را نک میزنه منطور که خواب دیده بود خودی الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان یوسف السلام بعد از تعبیر میگه اون امری که شما فتوه میخواستید شما سؤال کردید فیصله شده برو برگشت نداره کاری از دست منم نمیشه معنیش اینه که خداون قضاوت کرده خداوند فیصله کرده خدا حکم صادر کرده که بعد همین بشه بالاخره خواب را تعبیر کرد و بر اساس همون تعبیر خداوند عزوجل همون اتفاقات را برای هر دو پیش آورد اما اون یکی که قرار بود آزاد بشه به او یوسف علیه الصلاۃ گفت چی گفت و قال للذی ظن انه ناجن گفت به اون یکی که گمان میکرد نجات می یابد به او گفت که دیر وقت شده بود یوسف تو زندان افتاده بود دیگه قرآن نمیگه که زلیخا بار بار به زندان می آمد و هنوز نه زلیخا فراموش کرد تمامشون داستان. دیگه خبری از زلیخا نبود دوباره زلیخا طالب و دنبالش نبود دیگه مسئله تمام شد بالاخره یوسف را هیچ که سؤال نمی کرد چندین سال گذشته بود حتی بعضی میگن که اون پادشاه اولی مرد این پادشاه دیگری بود این پسرش بود جانشینش بود و اون ها گفت که همون کسی که آزاد شد گفت که اذكرنی اند ربک یاداوری من را پیش آ갓 بکن پیش پادشاه بکن بگو یک آدمی بیچارے بی, بی چند سال تو زندانه بعضی میگن تا این روز که یوسف به او گفت که پیش پادشاه عنوان بکنم من تو زندان استم هفت سال گذشته بود هفت سال سپری شده بود اما فانساه شیطان و ذکر ربه شیطان او را فراموش داد کی را؟ همون ساقی را از اینکه ذکر یوسف را بکند پیش آغایش ذکر یوسف عند ربهی ببین اینجا بعضی تفسیر دیگه میکنند و یک علت میگن چرا یوسف چند سال دیگه تو زندان ماند بعضی میگن که حکمت این بود چون که خداوند میخواست یوسف را آزاد بکنه یوسف متوسل به غیر شد یوسف متوسل به پادشاه شد متوسل به اسباب شد به این خاطر خدای از و جل و الشیطان یعنی شیطان یوسف را فراموش داد ذکر ربی که رب را یعنی رب حقیقی را یاد بکند بجایین که از خدا بخواد از پادشاه است این تفسیر تفسیر غلطی هست به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر انسان در دنیا برای حل مشکل خودش به اسباب متوسل بشه این خلاف توکل نیست یوسف گناهی نکرد چه گناهی کرد یوسف اینکه با خدا مناجات داشت با خدا راز و نیاز داشت مگر خدا بهتر میداند یک پیغمبر شب روز با خدا راز و نیاز داره اما به اسباب هم متوسل میشه ما میخانیم ان در ادامه که یعقوب علیہ السلام که پدر یوسف باشه در توکل و در رضا خیلی معروف است از همه انبیا هر یکی از انبیا در وصف معروف است یعقوب علیہ السلام در توکل معروف است خیلی متوکل بود اما وقتی که پسرانش را فرستاد گفت یا ابو لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب از یک در وارد نشی این ببین توکل به خدا داره ولی اسباب را استفاده میکنه راهای نجات را بررسی میکنه راهایی که آسیب کمتر ببینه بررسی میکنه توکل هم همینه که من و شما از اسبابی که خدای عزوجل برای ما درست کرده از اون اسباب استفاده بکنیم ولی به اون اسباب اعتماد نکنیم مثلا شما به دکتر برید مریض شدید این خلاف توکل نیست این عین توکل است چون دکتر را خدا درست کرده علم را خدا بهش داده دوارا خدا درست کرده لذا شما برید استفاده بکنید ولی همون طور که بر نسخه دکتر دکترای قدیم نوشته بودن الان نیست یا من اسمه دوار و اسمهش و ذکره شفا ای ذاتی که نامش دوا هست و ذکرش شفا هست یعنی او را شافی بدن این دوا را شافی ندن بگو خدا یا اینه تو درست کردی تو دستور دادی من استفاده بکنم میکنم این من شفا نمیده تو من شفا میده این استوکل یعنی از اسباب کار بگیر اما نظرت به رب اسباب باشه نظرت به رب اسباب باشه عقل در اسباب میدارد نظر عقل در اسباب می, نظر. در اسباب می نظر فکر گوید مسبب را نگر اسباب را عقل می استفاده کن اما فکر کسی که فکر دینی داره او می مسبب را نگر اصل خالقین اسباب را نگاه کن لذا اسباب مشروع و اسباب جائز از اینا استفاده بکنید این نیست کسی بگه من میرم زیارت از اونجا شفا میخوام اینم یک سببی است نه از اسباب مشروع استفاده کن و بعد فکرت به رب الاسباب باشه شما وقتی که به سفر می روید خونه تون را قفل بکنید دستگیر را هم فعال بکنید تمام دوربین ها را فعال بکنید ولی اعتمادتون به این اسباب نباشه اگر خدا بخواد میاد دوز همین را خونسا میکنه چنانچه میکنند این کارها را بکن این اسباب را استفاده بکن ولی به خدا بسپار آیه کرسی را بخوان، بگو خدا بتو سپردم ماشین را غفلت کردم خدا بتو سپردم لذا فکرت به رب الاسباب باش این توکل پس توکل نیست که مریض شدی میگه بزار به دکتر نمی خدا خودش شفا بده نه این این دیوانگی هست این توکل نیست این خلاف توکل هست پس یوسف علیه صلی کاری خلاف توکل نکرد یوسف علیه صلی اللہ علیہ السلام شب و روز با رب راز و نیاز داشت اما این اسباب که پادشاه بود بیگنایش را بهش اعلام کرد اما خدای از جل یک از کننم زمان بندی برای اینکه یوسف هم به تکمیل برسه یعقوب هم امتحانش تمام بشه. الله تعالی زمانی بس تایین کرده بود. الله میخواست اون زمان تکمیل بشه. اون زمان ببین معلوم میشه بعدن یوسف از این شده. بعض هم تمام اختیارات را داره. بعض هم دنبال یعقوب نمیفرسته. چرا؟ برادران میشن اصلاح این برادر من هست چرا نمیگه برو به پدر بگو بیا دیگه تمامی بیشتر گریه نکن اونام دارم میگن که پدر ما یک سردار گریه میکنه چون خدا اینجا مرحله امتحانی یوسف تمام شد آمدش عزیزمیش شده اما مال یعقوب هنوز باید تکمیل بشه الله چی میخواد برای بندش وقتی مشکلی میاره تاکی که میخواد مال یعقوب با چل سالش کامل بشه چه سال فراق و دوری از فرزند دل بند باید کامل بشه لذا یوسف علیہ السلام خلاف توکل هیچ کاری نکرد اما الله میخواست چند سال دیگه تو زندان بماند. چند سال دیگه مفسری میگن تا این زمان هفت،, هفت سال شده بود شیطان که او را فراموشی داد هف سال دیگه اضافه شد. شد چند سال چهار سال چهار سال تو زندان ماند. الله می‌فرماید: فرمایت قال لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِمٌ مِنْهُمَا. گفت به عن زندانی کہ گمان میکرد یقین کرد کہ انه ناجن او نجات می از اذ ان عند ربک نزد آغایت نزد پادشاهت مرایات کن بگو یک یوسف مظلومی است که در کنج زندان افتاده فانساهُ الشیطان شیطان او اب فراموشی داد ذکر ربه یعنی ذکر یوسف عند ربه از يوسف پیش پادشا پیش پادشاه فلبث في السجن بضع سنین در زندام سال ها دیگر سال دیگر در زندان مانت ببین اگر الله حکمت را الله بهتر میدانه ولی به ذهن می آید اگر الان می گفت که به پادشاه می گفت یک بی هست خب پادشاه چیکار میکرد فوقش یوسف را آزاد بیکر میگو بیا بیرون دیگه یوسف جایگاهی نداشت اللہ میخواد هنوز مراحل جدیدی بیاد این پادشاه خوابی بیبینه همه مؤبران آجز بشن ناتوان بشن یوسف بیاد تعبیر بکنه فضل یوسف هنری یوسف کمال یوسف بایچ بشه مشخص بشه به این خاطر بالاخره اون فراموش کرد تا سالهای دیگه گذشت سالهای دیگه گذشت الان پادشاه خواب را میبیند و قال الملك انی ارا سبع بقرات پادشاه گفت من در خوابم دیدم هفت گاو هستند گاو خوابش معروفه هفت تا فربه هستند که اونها را هفت تا لاغر میخورد و هفت خوشه هستند که هفت خوشه خشک به اونها می و اونها خوش میکند کنند. چیه؟ معبیران تمام ماندن. بعضی گفت که این خواب پراکنده هست. ای هست. این خوابهای پوچ و پراکنده ما این خبر تأبیر نمی کنیم. و قال الملكو اني اراء سبع بقرات پادشاه گفت من در خواب می بینم هفت گاو سمان فربه چاغ یا کلون سبون عجافون که انها را می خورد هفت گاو لاغر و سبع سنبولات و هفت خوشه خدر سبز و اخر یاب سات هفت دیگه خوشه خشک که این خوشهای خوش اون خوشهای تر و سبز را خوش می کند یا ایوها الملع ای درباریان افتونی فی رویا یا به من جواب بده در خواب من درباره خواب من به من جواب بده تعبیرش چیه؟ این کنتم لی اگر شما خواب تعبیر میکنید پس این را تعبیر کنید این کنتم لی رویا پس این را تعبیر کنید خواب من منش چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ پریشان بود نگران بود اما همیشه درباریان هر سی باشن بیشتر غلابی اند چه ملا درباری باشه چه متخصص باشه چه معبر باشه بالاخره قال و و احلام گفت که از این خوابهای پراکنده هست خوابهای پراکنده و خیالاتی خوابهای پراکنده نشما میبینی یکی از اینجا یکی از اونجا، هی نمی دنیا اول و آخرش چی شد و ما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ما نسبت به تعبیر خوابها عالم نیستیم اینو خوابها خوابهای پراکنده اما الان اون ساقی بیاد آمد عجب یادی یوسف افتادم چه زیبا تعبیر کرد و به زیبایی تعبیرش عملی شد تعبیر شد چرا به یوسف نگم وقال الذي نجا منهما گفت اون کسی که نجات یافته بود از آن دو و ذكر بعد امه و ذكر تذکر بیادش آمد بعد از مدت طولانی بعد از یعنی مدت طولانی بعد از مدت طولانی که بیادش آمد گفت انا انبه وکم پادشا من میتونم خا... می بگم برای شما من تعبیر خواب را بهت میگم مرا زود بفرست زمینه ملاقات با زندانی را یک زندانی وجاس فراهم بکن بالاخره پادشاه که حریص بود پادشاه میخواست زودتر میخواست تعبیر بشه پریشان بود نگران بود گفت ببرید اینو به زندان ببرید فورا رفت زندان وقتی که رفت اونجا زندان یوسف ای یوح الان لقبش را گفت صدیق واقعا راستگو هستی هر چی گفتی همون شد یوسف او یعنی یا یوسف ای یوسف ای صدیق افتنا فی سبع بقرات بما جواب بده درباره هفت گاو هفت گاوی که سمانن هفت گاو چاغ یاكلهن سبع عجاف آن هفت رمی خورد هفت گاو لاغر و 7 سنبلات و هفت سنبلات و هفت خوش سبز هستند و دیگری آبساعت و هفت تا دیگه خشک هستند این خواب را برای من تعبیر کن لالی ارجعو ال الناس شاید من برگردم به سوی مردم برگردم پیش پادشاه برم لعلهم يعلمون شاید انها فضل تو را بفهمند و بدانند که تو چه انسان حکیمی هستی جو انسان دانا و فهیم هستی اینجاست جای زندہ نیست ببینی یوسف علیه الصلاۃ اخلاق پیغمبر را بگو نپیشات میگذاره نگلایه میکنه که بی انصاف این چند سال کجا بودی بیت نگفته بودم به پادشاه بگو اگر ما بودیم چیکار میکردی الان همه محتاج تعبیر من هستند یوسف میدونه که تعبیرش یعنی چه فو الله تعالی اون علم داده بود نبی خدا بود ولی بدون درنگ بدون پیش شرط بدون مننت بدون اعتراض خبر میگه حتی نمیگه منو ببر پیش پادشاه خودم همه چیزش به خدا وابسته قال تزرعون سبع السنين دابا شما زراعت میکنید کشاورزی میکنید یعنی بکنید که دوباره آپ نیست هست چی هست اخبار هست بمعنی انشا مستقبل به بمعنی امر زراعت بکنید کشاورزی بکنید هفت سال پیا پی دعبن بعضی بیگن پیا پی بعضی بیگن نم برحساسی همه عادت همیشه هر سال چکر می کردید همونطور عادی فما حسدتم آنچه که شما درو کردید فدروه فی سنبولی در همون خوشه بذارید دیروز ارز کردم که بعضی میگند که تعویل الاحادیس یعنی یوسف چه علمی داشت علم آیندنگری عاقبت امور در باره آینده میدونست اینقدر خدا بهش فهم و درک داده بود که اگر این گندم را بزارند این گردم را بالاخره حشره میخوره و این گندم خراب میشه لذا عین و دوراندیش بود گفت بذارید تو خوشه فسروه فی سنبله الا قلیل مما تاکلون مگر تعداد اندکی مقدار کمی که شما می‌خورید بغیر همه را بذارید ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد بعد از این 7 سال 7 سال سخت می‌آید 7 سال می می‌آید ه سال قط باران میآید كل ما قدمتم لهنا که اون ه سال خورند آن چیزی که قبلا شما تقدیم کردید یعنی اون ه سال میاد این ه سال را میخوره در اون ه سال محصولات این ه سال را بخورید خورید شما ال قللیلا من ما مگر تعدادی کمی که شما حفاظت شما بکرید لذا بعد از اون هفت سال دیگه میاد این هفت سال که بیاد ببینید این دوتا هفت سال تو خوابش بود دو گروه گاغ چاغ و ضعیف یا دو گروه خوشه سبز و خشک اما یه چیز دیگه یوسف میگه این تو خواب نبود ثم یأتی من بعد ذالک عامن فی سپس بعد از این می آید یک سالی که فيه يغاث الناس در اون سال مردم به فراوانی آب داده میشوند یغاث الناس یعنی چی یعنی به وفور آب داده میشوند پس وفيه يعصرون اون وقت گندم و میوه انقدر زیاد میشه که فيه يعصرون یعنی گند میوه ها را چیکار میکنند انگورها را می فشار شراب درست میکنند چون انگور وقتی کم باشه آدم میخوره وقتی زیاد باشه اضافه باشه اون وقت یک چیزی دیگه درست میکنه. پس چین سال هایی برای شما آیند خب حالا سوال اینجاست که این یک سال را از کجای خواب تشخیص داد. این یک سال تو خواب نیست. بعضی میگن این از فراست یوسف است، از فهم و درکی یوسف است. هر کسی که فهمیده باشه عاقل باشه میدونه که هفت سال که قع بیاد، بعد از این که تمام بشه دیگه سال آباد میشه خود به خود سال خیلی خوبی خواهد بود لذا به این خاطر یوسف بود اما بسیاری از مفسرین نوشتن هازا بالوحی این آخری را خداوند از طریق وحی به پیغمبرش گفته بود که این یوسف بعد از این مرحله وح... چی میاد باران زیاد میاد این میاد که اینها محصولاتشون چند برابر میشه بلاخره یوسف این را تعبیر کرد، اون آقای ساقی فوراً این خبره، این علم را از یوسف الحسلاط السلام گرفت، دوان دوان رفت که به پادشاه بر و قال الملك اتوني فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النِّسْوَةِ اللَّاتِ قطعن أيديهم إن رَبِّي بكيدهن عليم قال ما خَطْبُكُنَّ كن إذ يُوسُفَ يوسف عن نفسه قلنحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز آن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذالك ليعلم انني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن تر ادامه قصه و داستان عبرت آموز سیدنا یوسف علیه السلام والسلام که بعد از اینکه پادشاه خا دید و اون خواب باعث شد که همگان به فضل یوسف به علم یوسف به دانایی یوسف پی ببرند و اون خواب را به زیبایی تعبیر کرد پادشاه هم متوجه شد که این انسان انسان دانشمندی هست انسان حکیمی است و انسان فهمیده‌ای هست پادشاه گفت او را فوراً پیش من بیاورید بیا وقتی که رفتن به یوسف خبر دادند که شما را پادشاه احزار کرده و پادشاه خواسته یوسف علیہ الصلوۃ سلام قبل از اون مطلبی را ذکر کردند که این مطلب خیلی مهم هست چون یوسف علیه سلام میدونست که بعد از این امتحان و مرحله امتحان تمام شده بعد از این مورد لطف و مورد نوازش پادشاه قرار می گیرد و در کاخ سلطنت به خدمت مشغول میشه بلخصوص مد نظر یوسف علیه سلام تبلیغ دین بود آشنایی مردم با الله بود اما یک مشکلی که وجود داشت همون لکه بود که برای مردم مشخص نشده بود که اون جریان یوسف با زنان مصر مقصر کیه خداوند میدانست خداوند خبر داشت و خود اون زنها و همسران و نزدیکانشو رو اما انها برای اینکه که بدنام نشند برای اینکه پاپوشی باشه برای عیب انها یوسف را به زندان انداختند هم یوسف بری و مظلوم بود و هم به زندان انداخته شد لذا یوسف علیہ السلام میدانست که باوجود اون لکه باوجود اون عیب اون ایراد کار دین و کار تبلیغ مشکل میشه الله عزوجل انبیاء خودش را از همون ابتدا از زمانی که طفل بودند و بچه بودند و در میان قوم بودند چنان پاک و بی آفریده که بعد از اینکه اونها ادعای نبوت میکنند بعد از اینکه مردم را به سوی خدا فرا میخانند هیچ کسی نتوانسته روی زندگی انبیا و سابقه انبیا ایراد بگیره که فلان روز شما خودت این اشتباه را کردی فلان روز خلاف گفتی فلان روز دروغ گفتی خداوند تعالی چنان پاک و معصوم و زندگی پاکیزه به اونها عنایت فرموده و یوسف علیه السلام هم همان گونه پاک بود اما این لکره خودشون درست کرده بودند برای اینکه پرده بندازند بر ایراد خودشون بر اشکال خودشون اینا برای یوسف درست کرده بودند و کار یوسف با این اشکال در واقع میلنگید به این خاطر یوسف علیه الصلاۃ والسلام فرمودند من قبل از اینکه بیام باید تکلیف روشن بشه اون جریانی که مرا به خاطر اون جریان به زندان انداختید اونجا مقصر کی بود ما بال ننسبتلتی قط قطعنا دی نه اون زن که دستشون را بریدند چرا بریدند جریان را, را روشن کنید من میام لذا وقتی که پادشاه متوجه شد که یصوف شرط داره پادشاه بیشتر به فضل یوسف و به فهمی یوسف پی برد و بیشتر متوجه شد لابد پادشاہ پرسیده بود که چرا تو زندان هست گفته بودن یک سالی چنین اتفاقی افتاده لذا پادشاہم کنجکاف شد که باید ان جریان روشن بشه این که خود زندانی اصرار می که جریان من روشن بشه من میام چیه دستور داد که ان زنها را بیارند اللہ می فرماید وقال الملك اتونی بیهی پادشا گفت پیش من بیارید او را یعنی یوسف را فلم ما الرسول زمانی که قاصد آمد فرستنده آمد بی یوسف خبر داد او گمان خودش اونچه که در تفسیران نوشته همون رفیق یوسف دوستی یوسف که تعبیر رازش پرسیده بود او پیش یوسف بار دوم آمد و شادان آمد خوش با خوشخبری آمد به او گفت قال ارجع الى ربك برو پیش آغایت پیش اربابت برو بپرس که حال اون زنهایی که بریدند چی بود علت چی بود دلیلش چی بود چرا ببینید انجا اخلاق کریمانی یوسف را که پیامبر اللہ بود خوب متوجه میشیم جریان اصلی با زلیخان بود اما یوسف علیہ السلام نمک پرورده خانه زلیخان بود میخواست نام زلیخان برده نشه خودش نامش را نبرد اسمی از زلیخان ذکر نکرد گفت که اون زنها و بعد هم نگفت اون زنهایی که مرا دعوت دادم به سوی کار نامشروع، اون زنها را هم بدنام نکرد اون جریان بریدن کار دو زخمی شدن دستها معروف بود همون جریان را گفت ما بال و نصوتی لاتی قطان عیدیه نه. بعض هم اون زنها را هم نخواست که بدنام کند گفت اونایی که دستایشون را بریدند اونایی که دستایشون را زخمی کردند اونها جریانشون چی بود؟ چرا این کار را کردند؟ و منظور اینه که به خاطر اون زنها چرا من به زندان افتادم؟ من چقدر مقصر هستم؟ اولا یوسف علیه صلی اللہ وسلم این که این متانت را از خودش نشان داد این صبوری را از خود نشان داد این خودش جای فکر کردن داره انسان وقتی که بزرگوار باشد هیچ وقت عجول نمیشه عجله نمی کنه هر کاری را با درنگ با متانت با شخصیت انجام میده رسول الله صلی الله علیه و در همین جا شکست نفسی فرمودند البته فرمودن که خداوند بر برادرم یوسف رحم بفرماید او را مورد رحمت خودش و الطاف خودش قرار بداد که فورا وقتی که او را خواستا نیامد، اگر من بودم لعجبت داعی همین که داعی دعوت دهنده پیش من آمده بود بلاد درنگ می آن شکست نفسی کرده. یعنی یوسف علیه السلام اینقدر شخصیت داره اس اینی در واقع یک متانتی بود که یوسف علیه الصلاۃ نشان نشاند انسان برای هر کاری والا اینکه انسان قرار هست به یک بشارتی برسه، به خوشخبری برسه، به جای خوبی برسه، انسان عجله نکنه، عجله کاری خوبی نیست. هر کاری با تدبیر، با فکر کردن باشه اون نتیجهش خیلی مطلوبتر خواهد بود. لذا یوسف گفتید وضعیت اون زنها چیه ان ربی بکیدهن علیم اون کیدی کی اونها کردند اون هیله و توتی ای که اونها بکار بردند رب من نسبت به اون آگاه هست علیم هست رب من میداند ولی خب باید مردم هم بدانند بندگان رب هم بدانند لذا اونها پا پادشاه خاص و ازنها استفصار کرد ازنها جویا شد قال ما خطب كننا اذ راوتنا يوسف عن نفسه ما خطب كننا یعنی ما شانكننا شان, شأن جایگاه شما چی زمانی که شما طلبیدید یوسف را عن نفسی یعنی خود یوسف را خودش را خواستید اورا در واقع پیش خودتون دعوت دادید برای کاری دعوت دادید آیا یوسف مقصر بود در این زمینه یا نه؟ قلن حاشل الله حاشل الله بعضی از مفسرین گفتم معنیش هست معاز الله پناب خدا ببینی اون مردم گرچه بطپرست بود بودند بنده قبلا هم خدمت طلاب عرض کردم که در طول تاریخ بطپرستان منکر خدا که نبودند اونا هم بطها را می پرسیدند و هم معتقد بودند خدای بزرگ اون خدایی است که خدای همه هست و اون خدا به این بطها اختیارات و قدرتی البته بطها نه بطهان نمادی بودند از انسانها به اون انسانهایی که اونا اعتقاد داشتند خدا قدرت داد. لذا پس در همه زمانها عقیده نسبت به خدای عزوجل در انسانها بوده هیچ وقت انسانها این طور نبودن که کلن نسبت به خدا کفر بکنم مگر در ادوار اخیر که این هم الان سوز شده در زمیر هر انسان در فطرت هر انسان ایمان به خدا هست لذا باوجود که بود پرست بودن گفتند الله یعنی خدا پناه به خدا ما علمنا علیه من سو ما بر او هیچ سوئی هیچ بدی من سو کسانی که با عربیت آشنا هستم میدونند که سوئن خودش نکره است من که بر او آمده به معنی تقلیل میشه یعنی ذره بدی ذره سوئینیت در او نیافتیم در او مشاهده نکردیم اینجا دیگه کسی از زلیخا چیزی نپرسید ولی زلیخا خودش اقرار کرد خودش اعتراف کرد قالت امرأت العزیز زن عزیز مصر وقتی که دید همگان اقرار کردند همگان اعتراف کردند گفت الان حس حصل حق الان که حق واضح شد حق روشن شد منم اعلام میکنم مردم بشنوید انا راودته عن نفسه من اورا طلبیدم نفس اورا اورا من دعوت دادم و انه لمن الصادقین در این موضوع که یوسف اعلام کرد هی راودتنی در این هیاهوی راودتنی گفتنش در این که مرا متهم کرد او راست میگه اون صادق حال یوسف علیه صلات و والسلام دلیل این پیشرت خودش را میگه چرا من میخواهم که بدانند که جریان کی چی بود مقصر کی بود مقصر بود زنها بودند یا یوسف بود من میخواهم فقط یک نکته را ثابت بکنم و یک نقطه اینه که عزیز مصر بدانات و همچین پادشاه مصر بداند که من در زمانی که در خانه عزیز مصر بودم نسبت به او و نسبت به حریم خانه او خائن نبودم میخاد امین بودنش را نشان بده چون از این به قرار امین مصر بشه عزیز مصر بشه خزائن مصر در اختیار او قرار بگیره نباید قبلا در پروندش هیچ نوع مخدوشیتی نباشد هیچ نوع اشکال و ایرادی نباشد اون اشکال و ایراد در بعضی از اذهان بود لذا اون ایراد را پاک کرد یوسف میگذalik لیعلم انی لم اخنه بالغیب این برای این است که بداند عزیز بداند اون فتیفار بداند یا قتفیر هرکه هست بداند که لم اخنه بالغيب من در غياب او خیانت نکردم با او خیانت نکردم من در خانه اش بودم خاین نبودم و همچنین بداند که الله لا يهدي کید الله اللہ عز و موفق نمی گرداند مکرو توت خائن انرا این جمله جمله زرینی هست. هر کسی بخواد خیانت بکنه، خیانت نسبت به برادر، خیانت نسبت به قوم، خیانت نسبت به دینش، خیانت نسبت به آینش، خیانت نسبت به هر کسی، این توطئش تا سر نمیره، موفق نمیشه. آخر خائن پوزش به خاک مالیده میشه. اونایی که خیانت میکنند، اونها باید بدونند که اونها موفق نمیشند اونا اگر چند سبایی چند دولاری گیریشون بیاید بالاخره نتیجه ناکامیشون هست نتیجه بدبختیشون هست هم در دنیا رسوا میشن خیلی خائنان را ما میبینیم که به چه حالت زاری گرفتار میشن که همگان دست به گوش میشند و توبه می کنند از وضعیتی که برای انها پیش میاد واقعا همونطوری که الله عز و جل فرموده قید خائن و توتعی خائن هیچ وقت هدایت نمیشه یعنی به منزل مقصود نمیرسه به سرانجام نمیرسه آخر خائن رسوا و خاک به سر میشه لذا و ان اللہ لا یهدی قید الخائنین این نکته دیگری برجسته و مهمی که از موعزه یوسف علیه سلات و السلام به ما می اما یوسف علیه سلات و السلام با وجود امپاکی با وجود عفت با وجود امانت با وجود صداقت باز هم برای رفع عجب برای اینکه غروری نشه برای اینکه تکبری نشه برای اینکه نسبت بده همه فضل و خوبی و لطف را به پروردگار میگه من نفسم را تبرعه نمی کنم نفس هر انسان اما را بسوح است هر انسان نفسش او را کسرت به گناه و به بدی و به حوای نفس امر میکنه لذا یوسف علیه السلام اینجا در واقع رفع غرور میکنه رفع عجب میکنه رفع تکبر میکنه که نباید یک انسان مغرور باشه لذا میفرماید وما او و ما ابره و نفسی باوجود که یوسف علیه السلام نفسش معصوم و پاک است گناهی نکرده انبیاء همه از گناه پاک هستند اما یوسف و وما ابرع نفسی من نفسم را تبرع نمی کنم انا نفس لأمارتم بسو همان نفس اماره هست اماره مبالغه آمیره هست آمیر یعنی امر کننده اماره یعنی خیلی امر کننده خیلی دستور دهنده نفس خیلی انسان رب به بدی دستور میده چون که یوسف علیه و السلام نسبت به پاکیش و عصمتش در این قضیه اصرار داشت الان میگوید که این لطف به نفس من بر نمیگرده اگر من پاک هستم این لطف رب من هست و الا اگر برای نفس باشه نفس اماره ام سو هست بنده در درست های گذشته اقسام نفس را خدمت عزیزانم ارز کردم که نفس انسان چند مرحله داره مرحله اول اینه که اینجا یوسف علیه صلی اللہ ذکر کرده مرحله اماره هر انسانی چه نیک باشد چه بد باشد چه صالح باشد چه طالب باشد در فطرت او این چیز است حتی انبیا یعنی نفس انسان همیشه امر میکنه که این کار رو بکن اون کار را بکن اماره بسو هست یوسف علیه السلام میگه نفس اماره بسو هست اما اونایی که خدای عزوجل اونها را حفاظت می کند اونها نفس خودشون را نمیگذارند لگام نفس را به دست میگیرند لگام خود را به نفس نمیگذارند لگام نفس را به دین می دهند به دین تحویل می دهند به ایمان تحویل می دهند نه اینکه خودشون را به نفس بی دست نفس تحویل را. بعضی مردم هستند که لگامشون را به دست نفس دادند هر چی که نفس بگه شرابخواری هست میخاری هست غمار هست دود هست بالله ارتباطات نامشروع هست زنا هست قتل نفس هست هر چی که هر جنایتی که باشه انجام میده این،, این هم نفسش اماره ام هست او را امر میکنه ولی هر چی نفس میگه میگه چشم اما مومن اینطور نباید باشه مومن باید لگام خود را به دست نفس نده بلکه لگام نفس را به دست بگیرد مهار بکند، نفس را بگه نه هرچی تو میگی نه هرچی ربم میگه، اما من خاف مقام ربیه از استادن و حاضر شدن در محضر رب میترسد و نهن نفس عن الهوا، نفس را از هوا باز میدارد نفس میگه بخواب میگه نه وقت نمازه نفس میگه که ادامه بده میگه نه وقت اطاعت و بندگی هست نفس میگه این کار رو بکن میگه نه این خلاف است رب ناراضی میشه در هر دو راهی در هر سر راهی جلو نفس را میگیره و لگام نفس را به دست گرفته وقتی که انسان به این مرحله برسه این از کنم که نفس لوامه میشه لوامه یعنی چه یعنی این مرحله دوم نفس یعنی انسان نفسی را ملامت میکنه هر باری که کوچکترین اشتباه میکنه میگه نه تو اشتباه میگی ملامتش میکنه اگر از نفس اشتباه هم سر بزنه چنان تنبیهش میکنه چنان ملامتش میکنه که نفس بگه من غلط کردم دوباره نمیکنم قبلا هم عرض کردم نفس خودمون را همیشه تنبیه بکنیم اگر تنبیه بکنیم این مرحله لوامه میرسیم. اگر نفس اشتباهی کرد اگر نفس به گناهی گرفتاری من کرد به اون چیزی که بر نفس سخت میشه انجام بدیم مثلا به نفس بگه تو نگو نگذاشتی که نماز صبح بیدار بشم گفتی بخواب راحت باش بعدن خذا میاری خوابید بعدن بلند بشه علاوه از این که نماز صبح را میخانه 20 رکت نفلم بخانه تا این نفس خوب له بشه از کنم که یک میلیون دو میلیون ده میلیون در رای خدا صدقه بده تا بر نفس گرام بشه هرچی که نفس از اون اذیت میشه اون انجام بده نفسش را تنبیه بکنه لذا بر هر درائی نفس را ملامت بکنه وقتی که شما همیش با نفستون مبارزه بکنید خیلی از جوانها میپرسند ما گاهی توبه میکنیم به خدا بر اما دوباره زود توبه میشکنه دوباره زود فریم میخوریم به دلیل این هست که نفس را کنترل نمیکنیم ما ادامه بدیم گاهی نیاز میشه با یک استادی با یک مربی با یک مسلحی که در این زمینه تجربه داره مشوره بکنیم راهنمایی بگیریم خط بگیریم لذا وقتی که همیش در زندگیت در مبارزه با نفس بشی زیاد طول نمی کشه مدتی بعد این نفس نفس مطمئن نمیشه نفس مطمئن کدومه؟ نفس مطمئنه نکنه که تازمانی که اطاعت و بندگی نکنی تازمانی که نیکی نکنی تازمانی که خدا را راضی نکنی نفس آرامش نمیگیره وقتی بلند میشه تهجدت را میخانی نفس اطمینان حاصل میکنه آرامش وقتی که نماز صبح را خوب با شرایط ادا میکنی این نفس آرامش میگیره وقتی که صدقه میدی به بی یتیم و به فقیر میرسی این نفس راحت میشه یعنی هر کاری نیک میکنی امر به معروف نهی از منکر حقوق الله، حقوق العبادت، عیادت مریض، رسیدگی ببین و هر کار می نفس خوشش میاد. نکنی نا نفس ناراحت میشه این می نفس مطمئن نه. لذا این مرحله ابتدایی هست که یوسف علیه السلام والسلام ذکر میکنه این در فطرت هر انسانی هست اما انسان های وارسته نفس خودشون ربی اون جایگاه میبرند. آخر این حالت برای اونها نمیماند لذا میفرماید ان اما لاماره بالسو نفس, لا نفس بکثرت انسان را امر میکند به بدی و گنا الا ما رحم ربی رب مگر انت هر کسی اونچه یعنی که رب من رحم بکند، یعنی، لakin اینجا اصلش این استثناء استثناء منقطعه، اما اون حدی که رب من رحم بکند و رب من جلوگیری بکند. اون وقت نفس جلوش گرفته می و به سو امر نمی کند این رب غفور و رحیم همانا رب من بخشاینده و مهربان هست علا ای حال وقتی که کل این یوسف برای پادشاه گفته شد و تعریف شد پادشاه بیشتر علاقه شد عجب این انسان پس وارستگیش در حد بالایی هست این باید استاد ما بشه این باید ما را راه کند بیارید که من این را از خاصان خودم قرار میدهم، مقربان خودم قرار می دهم این یکی از حکمت‌های اون متانت اون درنگ کردن، اون سنجیدگی، اون بزرگی. و قال الملك توني به استخلصه لنفسی پادشاه گفت بیا اون را برای من. اون را پیش من بیارید از تخلیص و نفسی خالص او را برای خودم قرار میدم یعنی چه؟ یعنی مشاور خاصم درباری خاصم بالاخره یوسف علیه صلی اللہ علیه آمد با پادشاه مذاکره کرد صحبت شد و جلسات مختلفی وقتی که گرفتند و صحبت کردند پادشاه بیشتر به حکمت یوسف به فهم یوسف به دانایی یوسف پی برد و وقتی که کاملا پادشاه متوجه شد به یوسف اختیار تام داد قال انک اليوم لدینا مکین امین از امروز به بعد تو پیش ما جایداری یعنی در قلب ما در دل ما پیش ما جایداری معزز هستی و امین هستی معتبر هستی به اعتماد هست هر چی تو بگی هر مشوری تو بگی ما همون را عملی میکنیم ما به اون پایبند میشیم یوسف علیه السلام وقتی که دید اطمینان و اعتماد کامل شده فرمود اجعلنی علی خزائن الأرض. قال اجعلنی علی خزائن الارض مرا قرار بده بر خزائن ارض مصر بر ذخایر ارض مصر یعنی وزیر خزانه بزار و وزیر انبارداری بزار که این خزانه ها و این مال و مالیات در دست من باشه چرا دلیلش انی حفیظون چون من حفیظ هستم از از اونها محافظت میکنم نگهداری میکنم نمیذارم که خیانت بشه علیمون فراست هم دارم می دانم طور بکنم و چیکار بکنم که حفظ بشن نگهداری داری بشن هم علم و تخصصش را دارم به من نشان داده و هم الله عز و به من قدرت حفظ داده و صلاحیت حفظ اونها را داده ما بحثی که اینجا اهل تفسیر مطرح می کنن اینه که یوسف علیه صلات و السلام برای خودش خودش این منصب را خواست این پست را خاص، این ریاست را خاص. در حالی که ما در شریعت داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هیچ وقتی شما برای خودتون پست و مقام نخواهید، برای خودتون ریاست نخواهید. خب چرا یوسف خودش برای خودش خواست؟ به بخدمت شما درستش همینه که انسان هیچ وقت طالب پستی نباشه طالب مسئولیتی نباشه مگر اینکه تشخیص این باشه که به غیر از او هیچ کسی نمیتونه این کار را انجام بده وقتی که انسان یقین داشته باشه اذعان داشته باشه که اهل این کار من هستم اون وقت انسان میتونه که تقاضا بکنه ولی متعسفانه امروز ماه نه، امروز ماه، بلکه صلاحیت داریم یا نداریم. هر مقام را هر پست را طالب هستیم. در زمان انتخابات نگاه کنید. هر یکی تابلو چاپ میکنه و از کنم که تراکت چاپ میکنه اطلاعیه که من مهندسم من متخصصم من تحصیلاتم در غرب بوده من در اروپا بودم من امینم من صادق هستم من فلانم بلدم چه تعریفات این همه خلاف شر هستند اینها همه خلاف شر هستند نباید انسان اینقدر از خودش تعریف بکنه یا اینکه اصلا کاندید هم نشه چرا اگر کسی احساس میکنه که این مسئولیت را من میتوانم به نحو احسن انجام بدهم میتونه بگه من برای این خدمت آمادگی دارم یا اینکه بهترین صورتش اینه که مردم تشخیص بدن که ایشون میتواند ایشون صلاحیت داره مردم وقتی که شما مردم میدونید که یک شخصیتی توانایی داره قدرت داره استعدادش را داره شما مردم ازش دعوت کنی شما بفرمایید جا خودت را کاندید بکن ما میخوایم شما بیشید نمائنده ایما ما میخوایم شما بیشید رئیس جمهور ما نه اینکه که خودت طرف خودش را کاندید بکنه و میلیارد ها تومن هم خرج بکنه تا بی اون جایگاه برسه خوب مشکل سه، اینکه تمام زندگی خودش را فدا میکنه تا بی اونجا برسه برای چی این کار میکنه. لذا آن حضرت فرمود هیچ وقت پست نخواهید، هیچ وقت خودتون ریاست نخواهید. و یوسف علیہ صلی الله که خواستند یک دلیلش را که علما ذکر کردن مفسرین بنده عرض کردم اینه که یوسف احساس کرد کسی دیگه نیست و دلیل اصلیش را خدمت شما عرض بکنم. دلیل اصلیش اینه که یوسف پیامبر خدا بود پیامبران بدون اشاره خدا بدون وحی بدون دستور خدا هیچ کاری نمی کنند. لذا یوسف علیه صلی اللہ وسلم هر پیشنهادی داده بنا بر دستور خدا بوده یوسف مامور بوده کار یوسف و مسئله یوسف با فرق دارد. لذا الله می‌فرماید: قال جعل نی علی خزائن الأرض، اَنِّی حَفِیزُ عَلیم مرا بر های زمین مصر بگذار، چون من هم امین هستم حفاظت میکنم و هم دانا هستم علم شردارم. و کدالیک مکنالیو سفر در ارض الله تعالی انجل لطف خودش را زیک میکنه اینگونه ما قدرت دادیم جای دادیم یوسف را در زمین یعنی بعد از اینکه او را از زندان آزاد کردیم یتبوؤ منها حيث يشاء بعد از این زیق بعد از این تنگنا یتبوؤ هر جا جایی می گرفت یعنی هر جمی خاص خواست سکونت بکنت در زمین منها از اون زمین هر جا که می خواست کما هو شان یک پادشاہ دوست توی تو این شهر زندگی کنه، اونجا جا هم کاخ هست اون هم ویلا است. هم باغ نصیب و برحمتنا من نشا با رحمت خودمان ما میرسانیم هر کسی که بخواهیم یعنی خدا بر هر کسی بخواد بر اون رحمت میفرستاد ولا نضيع اجر المحسنين ما اجر مخلصان را ضایع این جایگاهی که یوسف علیه و السلام رسید این در واقع اجرش بود این پاداشش بود این مزد دنیاویش اخروی که الله بهتر میدونه در دنیا خدا به این عزت را بهشتاد از اینجا معلوم میشه که مرحله امتحانات یوسف تمام شده اما یعقوب علیه صلی اللہ هنوز در ابتلا است امتحان پسر تمامه و امتحان پدر هنوز ادامه داره یعقوب هنوز دست فنجه نرمی کنه با غم با اندوه با مسیبت اللہ تعالی می که خداوند اجر مخلصین ضایع نمی این در دنیا است اما در آخرت، ولا اجر الآخرة خیر لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ البته اجر آخرت بهتر است از اجر دنیا، من اجر دنیا تفسیر جلالین گفته، اجر آخرت بهتر است از اجر دنیا لِلَّذِينَ آمَنُوا برای کسانی که ایمان بیاورند به خدا ایمان خالصانه و کانویت تقون و از شرک و کفر و گناهان دوری کنن تقوی یعنی دوری کردن از شرک و کفر و بغی گناهان بلاخره امون که یوسف علیہ السلام پیشنهاد داد ایشون در رأس خزائن مصر قرار گرفت و پرسنل کاری خودش را مشخص کرد کار را آغاز کرد کار را آغاز کرد سالهای آبادی و سال های اس کنم که پرروونق که همه چیز فراوان بود یکی بعد از دیگری داشت میگذاشت و یوسفل سلامات و سلام با کارمندانش با پرسونش به کوب کار میکرد گندم ذخیر میکردند و سیلو درست میکردند انبار میکردند تا اینکه این هفت سال تمام شد این هفت سال که تمام شد سالهای قحط شروع شد تمام دنیا قهده تمام دنیا هیچی نداره اما کشور مصر و سرزمین مصر غنی هست و اینجا برای مردم خودش برنامه ریزی کرده مردم مصر به ترتیب از روی ترتیبی که یوسف علیه صلی گذاشته بود برایشون می آمدن جیره خودشون را دریافت می کردند و به اندازه جمعیت خودشون خرجی خوراکی خودشون را می گرفتن مصرف می, می و این روزهای سخت را پشت سر می گذاشتن. اما جاهای دیگر مشکل داشتند و بعضی از مردم جاهای دیگر بلاد دیگر مراجعه کردند. یوسف علیه سلام سخاوت از خود نشان داد و اونها را هم دستخالی بر نگردند به اونها هم گندم داد زیاد انبار شده بود برادران یوسف شنیدن که در مصر چنان عزیزی هست که انسان نجیبی هست انسان کریم و نفسی هست و نسبت به هم مصری ها و غیر مصری ها لطف دارد و به مردم گندم میده. اونجا هم نگی فشار آورد اونجا هم قحط فشار آورد یعقوب علیہ السلام فرزندانش را گفت که شما هم بروید به فکر معاش ما باشید به فکر گندم باشید برادران یوسف آمدند قرآن میگه این برادران که آمدند یوسف را نشناختند اما یوسف اونها را شناخت یوسف را نشناختند به چند دلیل بود یکی اینکه اون زمانی که یوسف پیش اونها بود یوسف بسیار بچه بود تفل بود و شما می دونید که شکل طفلی و بچگی با شکل جوانی و نوجوانی خیلی متفاوت میشه، کسی رو شما اگر در بچگی دیدید الان ببینید نمی که این هم بچه است مگر اینکه خودش را خودش معرفی بکند اما شکل جوانی تاامان سالی زیاد تغییر نمیکنه فوقش مواسفید میشه زیاد تفاوت نمیاد لذا اونها وضعیتشون این بود اونها اگر چند سالی بزرگ شده بودن اون وقت بزرگ بودن مرد بودند الان فوقش پیرتر شدند یوسف اونها رو شناخت اما یوسف اون زمان تفلی بود هفت سال و هشت سال بیشترش نبود لذا الان که مردی شده برای خودش و سن چهل سال و بالاتر از چل سال دارد خب اونها نمی بین این خاطر اونا نشناختن یک دلیلش این بود یک دلیل دیگه اینه که یوسف انتظار اونها رو می کشید یوسف منتظر اونها بود اما اونها انتظار یوسف را در این کاخ نداشتند اونها یوسف را به عنوان یک برده فروخته بودند خدا می دونه این برده الان برای کی داره از چه آب می یا سر زمین داره شخ می زنه یا داره برایش گسپندانش را نگهداری میکنه. اصلا به فکر این نبودند در خاطره در ذهنشون این چیز نبود که یوسف اینجا تو کاخ باشه و اون هم سروزیر بشه در رأس همه باشد لذا این دلائلی هست که یوسف اونها را شناخت و انها یوسف را نشناختن و جاء اخوت یوسف برادران یوسف آمدند فدخلو عليه بر یوسف داخل شدند فعرفهم یوسف انهار الشناخ وهم له منکرون ان ها نسبت به یوسف منکر بودند منکر یعنی ناشناخته ناشناختند ولما جهزهم بجهازهم معلوم میشه که اونها همه چیز را برای یوسف تعریف کردند چون اونها میخواستن گندومی بیشتری ببرند حتما گفتن که ما در خانه پدر پیری هم داریم که خیلی سال و پیر و ضعیف است و یک برادری هم داریم که اون برادر ما پدر نگذاشته با ما بیاد اون از پدر نگهداری میکنه و در کنار پدر از کارهای خاص خدمت پدر را میکنه برای اونها هم سهمی در نظر به بفکر اونها هم باشید بالاخره یوسف علیه صلی کرم نوازی کردند اما یوسف گفت که بار دیگر که آمدید حتما برادرتون را بیارید تا مشخص بشه شما راست میگید اگر نیاوردید دیگه کیلی برای شما نیست اونها گفتم باشه ما از پدرمون میخواهیم ولی پیشا پیش گفتم پدر براحتی نمیگذارد ولی ما از پدرمتالبه را میکنیم برادرمون را یوسف علیه و السلام هنوز اجازه نداره بنده عرض کردم که مرحله امتحان یوسف تمام شد فقط همین بخشش منده که میخواد پدر را ببیند اما مال عقوب تمام نشده یوسف الان چه مشکلی داره عزیز مصر است میتونه که پدرش را بخواد خودش بره ولی اجازه نیست الله تعالی حکمت هایی در, در نظر داره که اون را الله بهتر می‌دونه. لذا اگر برای بندی خدا امتحان آورد یک سال گذشت، دو سال گذشت، بعضیها میگن تعجب میکنیم چرا خداوند مشکل ما را حل نمیکنه؟ بعضیها حتی میگن ما هم صدقه میدیم، هم دعا میکنیم، هم نماز تعجب می میخوانیم، هم تلاوت میکنیم، هنوز مشکل حل نمیشه چرا؟ شما یه چیز بهتری بلدی به ما بگید فکر میکنه که ما در دست ما کلید تمام موجزات هست که ما یک چیز بگیم فورا مشکل حل میشه نا الله عزوجل برای هر یکی یک زمانی رتعین کرده اگر بخواد خدا مشکل, رحل بکنے مشکل یہ ایک روز حل بکنه مشکل یکی یک روزه حل میشه یکی یک یک ماهه حل میشه یکی یک ساله حل میشه یکی 10 ساله حل میشه یوسف علیه السلام فراق و جدایی اونطوری که مفسری میگه چهل سال طول میکشه و بعضی خواب می بینند هم فکر میکنند که فردا بعد این خواب تعبیر میشه خواب یوسف هم بعد از سال تعبیر میشه لذا هیچ وقت اجول نباشید وقتی که به شما گفته میشه که شما این را بخونید این ذکر را بخونید این دعا را بخونید این نماز حاجت را بخونید بخان اون فرج با خدا است حل مشکل با خدا است هر وقتی که خدا بخواد تو صبور باش بهترین کلید حل مشکلات صبره، از صبر الفرج کلید تمام فرج است صبر کن ادامه بده شاید خدا میخواد تو تا ده سال نماز حاجت بخوانی اشکال نداره ب این برای خوبه برات نف داره لذا الله تعالی کارهاي خودش را بهتر میداد یوسف اجازه داره بنیامین را ببیند اجازه نداره فعلا یاقوب را ببیند بهم این خاطر ااضطرار دارد که برادر را بیاریید معلوم میشه که محدودیتی که از سوی پروردگار تعیین شده برای یوسف اونها در رابط با فقط یعقوب هست این پدر و پسر با باید به با هم دیگه نرسند هنوز باید بگذرد تا خدای از و هنوز بینایی را از یعقوب بگیرد امتحان و مشکل بودن امتحان به اوجش برسه به مرحله آخر برسه لذا الله می فرماید وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ وقتی که آماده کرد جهاز انها را وسائل انها را قال اعتونی بی لکم گفت بیاورید برادر خودتان را که برادر شما من ابیکم از پدر شما همون برادری که شما تعریف کردید منم نیت بدی ندارم ال تنا اننی اوفل کیل آیا شما نمی بینید من کاملا به شما کیل میدم حتی برای برادرش محم میدم و انا خیر منزلیین من بهترین مهمان نواز هستم مهمان نوازییک از برادرانش، اقرامشون کرد غذاشون داد لذا احترام. با احترام باشون برخورد کرد اون احترامی که در جایگاه یک پیغمبر است و اصلا به روحشون هم نکشید اما فئل لم تعتونی اگر نیاوردید او را پیش من فلا کیل لكم عندی پیش من کیلی ندارید ولا تقربون دیگه نزدیک من نشید دوباره نزدیک نیایید اما برادران این وعده را دادند وعده آوردن ندادند وعده مطالبه از پدر دادند عنه اباهو ما از در رابطه با او از پدر میخواهیم یعنی از پدر طلبش میکنیم و اینا لفاعلون ما حتماً این کار را میکنیم که به پدر بگیم پدر بزار مایم این نیامین را هم با خدمیم ببریم اما یوسف علیه السلام تدبیر دیگر به برد برای اینکه برادران بیشتر تشویق بشند و بهتر بیایند دستور داد به خدمه خودش که تمام پول های اون هر اون زمان پول به شکل نقره بود یا از کنم که سکه نقره ای بود یا ظرف نقره ای بود یا جام نقره ای بود بلکه پولها به شکل کالا بودند. لذا گفت که هر چی که اینها وسایل آوردن به عنوان پول، اونها را بیزار دوباره تکیسه شون. معلوم میشه که در حد پولهای ما نبودند که گم شان سکههای ما، سکههای بزرگی بودند یا ظروف بزرگی بودند، درست بودند. گفت تکیسه هایشون بیزار، و در وسایلشون بیزارید. این چند نکته برای این بیان کردند یکی اینه بعضی میگویند اینها وقتی که برند چون پیغمبر هستند حلال خار هستند ببینند که پول آمده با ما برگشته فکر میکنند که اشتباهی آمده دوباره برمیگردند هیچ وقت مال حرام نمیخورند دوباره علاوه اینکه برای پس دادن پول هم شده برمیگردند بعض این توجیه را ذکر کردند ولی این توجیه زیاد قوی نیست به دلیل این که بلاخره اونا پول را تحویل یصف داده بودند اونا می دونستن خودش گذاشته اصل توجیه اینه که اینها اگر به دوباره بیاین شاید پول داشته نباشن طول بکشه دوباره پولی از جای جمع بکنند لذا وقتی برند اونجا پول حاضر داشته باشند بتونند در اولین فرصت در عصر وقت بیاد. گویا یوسف علیه صلی اللہ وسلم سراسیمه هست برای دیدن بنیامین میخواد زدتر بیاند به این خاطر دستور داد وقال لفتیانهی بی های خودش گفت به اون جوانهای خدمت گفت اجعلو بضاعتهم قرار بدهید وسائلشان را کالائشان را اون کالائی که به عنوان پول آورد بودند فیر رحالهم در اون کی سحائشان در اون گونی هائشان لعلهم یعرفونها شاید بشناسند ان را اذن قلبو الى اهلهم وقتی که برگردن پیش اهل ببینند بشناس ایمون پول ماست ما پس داده لعلهم یرجعون شاید اینها برگردند برگردن دوباره بیایم برای خرید مجدد اونجا وقتی که پیش پدر رفتند گزارش را دادند قضا آماده کردند نان خوردند بعد از اون به پدر گفتند پدر این بار به ما کیل نمی دهند از کنم که بودجه این, این مه و توشه این را بدون بنیامین نمی دهند بنیامین را می فرستی یا نمی فرستی فلما رجعوا الى ابیهم زمانی که برگشتم پیش پدرشان قالو یا ابانا ای پدر ما منع من الکیل کیل برای بار دیگر معنی شده یعنی جلوگیری شده بار دیگر به ما کیل نمیدن یعنی گندم نمیدن مگر به یک شرطی که فارسل فا معنا اخانا نکتل بفرست هم را با ما برادر من را که نکتل برای او هم کیل بگیریم گندم بگیریم و ان له لحافظون اگر تو داری ما قول میدیم این بار برای او از او محافظت بکنیم اما یعقوب علیه السلام اطمینان نداره یعقوب در هر جریانی بیاد یوسف میفته یعقوب میگه همون محافظتی که از یوسف کردید همون طور ازش حفاظت میکنید قال هل امنکم علی من بشما اطمینان ندارم من به شما اعتماد ندارم الا کما امنتکم على اخیه من قبل مگر همانگونه که اعتماد کردم به شما نسبت به برادرش قبل از همون اعتماد الان هست شما آدم های درستی نیستید شما امتحام پس دادید اعتماد رفته ولی بعض هم یعقوب علیه سلام میگه من که اعتماد ندارم ولی اگر خدا بخاد از بنده حفاظت میکنه میکنه فالله خیر حافظا الله بهترین حافظا است بهترین نگهبان است و هو ارحم الراحمین اون ارحم الراحمین است حرگا احساس خطر میکنی بخان فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین بهترین حافظ من خداست. بهترین نگهدارنده دی من دیومن خداست. ماشین سوار میشه از این شهر به اون شهر میری. کلی حوادث تو این راه است. کلی تصادفات و اتفاقات است. بخون الله فازتت میکنه. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. بهترین محافظ من الله است. و الله است که ارحم الراحمین از هر کسی رحمش بیشتر است. بلکه پدر رضایت نداد گفت نه گرچه محافظ خداست خدا نگه داری می کنید ولی من نمی زارم اصلا این فکر از سر بیرون کنید خلاصه کیسه را باز کردن کیسه هارا که کی باز کردن دیدند سبحان اللہ اینا پر پوله تمام دراهم برگشته و عزیزمیس خودش اینجا گذاشته. این باعث شد که یک مقداری یعقوب علیه صلی اللہ علیه تجدید نظر بکنه وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ زمانی که وسائلشون رباز کردند وَجَدُوا بضاعتهم رُدَّتْ إِلَيْهِمْ یافتن کالاهایشان را یافتن پولهایشان را ردتْ إِلَيْهِمْ برگردانده شده بود بسوئی آنان ببین متوجه شدن که خودشون گذاشتن قالو ابانا ما نبغي گفتن ای پدر ای پدر ما،, ما دیگه چی می‌خاهیم ما نبغي تفسیر جلاله نوشته من اکرام الملك اینقدر که پادشاه ما را احترام گذاشته هم ما را پذیرایی کرد غذا داد هم برای موجودین و برای غایبین به ما کیل داد هم پول ما را برگردنده بیشتر از این چی میخواییم از این بیشتر توقع داشته باشیم چنین انسان شریفی هست چنین انسان بزرگ مردی هست ما نبغی. ما دیگه چه بخوایم؟ هادیهی بضاعتنا ببین این کالای ما این پول ما ردتی لینا برگشته به ما لذا پدر معالم برمیگردیم میریم میریم و نمیرو اهلنا برای اهل خودمون بار خوراک میاریم میره میگویند اون کاروانی را که بارشی باشد بارش غذایی باشد مواد غذایی باشد و نمیرو اهلنا یعنی مواد غذایی میاریم برای اهلمون من و نحفظ و اخانا برادر را هم محافظت میکنیم و نزداد و کیل باییر بار یک شتر هم اضافه میاریم ذالک کل و یسیر این کلی کی که ما آوردیم این گندمایی که آوردیم انده که اینا فردا میشه پدر ما نیاز من سبحان الله یعقوب علیه صلی اللہ در دراه گیر کرده در منگنه هست از یک طرف اگر بنیامین را بگذارد دیگه سکته میکنه این بار چون می و اگر نگزارد به قول این بچه ها دیگه هیچ خبری از گندم نیست باید از گرستنگی تلف بشند در بین این یعقوب با خودش فکر میکنی چیکار بکنم تا اینکه آخر دل به دریا میزنه اعتماد میکنه میگه میفرستم به شرط اینکه که همه بیاید اینجا سوگند بخورید که این بار خیانت نمی کنید همه را سوگند میده با همه بیعت میکنه، باز همه پیمان می بله قال لن ارسله معکم گفت لن ارسله معکم هرگز با شما نمی فرستمش حتی تؤتون موثقم من الله حتی که شما بمن بدهید احدی پیمانی که از جانب به خدا باشد یعنی نام خدا را واسطه قرار بدیم کلت تون ننی بی حتما حتما او را بیآورید برای من مگر کی می ته چنین تضمینی بکنه؟ حوادث ساست اتفاقات هست؟ هزار مشکل است خودش استثناء میکنه اونها را الا ای حاط بكم مگر شما مورد احاطه قرار بگیرید یعنی برای شما آفت بیاد مشکلی بیاد اون من نمیتونم چیز بگم در باره آفت آسمانی تقدیر الهی اما شما کوتاهی نکنی شما حتما بیارید بالاخره همه میان میگن سوگند یاد میکنیم قسم میخوریم عهد بندیم که ما انکار را میکنیم بر میگرداریم فلما آتوهم موثقهم زمانی که بی امیدند پیمانشون را قال الله على ما نقول وکیل یعقوب علیه صلات و السلام مومن هست رسول الله فرمود لا يلدغ المومن من جحر واحد مرتين مومن از یک سوراخ دو بار نیش نمیخورد یک بار که دستت را تو سوراخ بردی نیش زد اونجا گشتم نیش زد دیگه دوباره دیوانگی نمیکنی برای دوم دست را ببری یک بار وقتی که ضربه خورده دیگه یعقوب سعی می میکنه ضربه نخورد به این خاطر همه این تدبیرها را میکنه سبحان الله که معروف است در زبان عربی میگه التقدیر و یضحک على التدبیر تقدیر بر تدبیر میخنده تو چقدر برای خودت برنامه ریزی بالاخره بلاخره جلوی این حادثه را هم میگیری جلوی اون خطر را هم میگیری جلوی این می را تا تاکی اینا سالم بیاند ولی اللہ عزوجل تقدیر میاره که همه اینا نقش برعاب میشی ببین اینجا خدا تعالی داره نشون میده که انبیاء باوجود که این قدر محاذبت میکنند تا آسیب نبینند تا اینکه مشکلی پیش نیاید بعضا مشکل پیش میاد معلوم میشه که انبیا مختار نیستند انبیا متصرف نیستند انبیا نمیتوانند از خودشون zarar را دفع کنند چطور از منو تو zarar را دفع میکنند حتى الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم صراحه می فرماید در سوره اعراف شما خاندید قل لا املک لنفسي نفعاً ولا ضرا الا ما شاء الله بگو من محمد برای خودم مالک نفع و ضرر نیستم مگر که خدا بخواد نفع خدا بخواد به می می من میرسه ضرری خدا بخواد به من میرسه من وقتی برای خودم مالک نیستم از شما چطور زار را دفع بکنم نفر بیارم برایش. لذا مالک نفع و ضرر فقط الله است. بغیر از Allah هیچ کسی. در این داستان شما می خانید که بیعقوب متصرف نیست، نافع نیست، زار نیست. برای خودش نمیتونه مشکلی, مشکلی را دور کنه. این قدر میکنه، این قدر برنامه ریزی میکنه، این قدر قسم و سوغندش میده. ولی کاری که خدا بخواد از دست یعقوب چی میشه لذا الله می فرماید فلما اتوه موثقهم وقت کی به او اهدِ پیمانشان را عهدشان را میثاقشان را قال الله علا ما نقول وکیل اینجا توکلش را خدا کرد گفت الله بر آنچه که ما میگوییم وکیل هست وکیل هست یعنی زامن است. یعنی به خدا میسپارمش به خداوند عزوجل میسپارمش که خداوند خودش زامنش هست وقالا یا بنیه لا تدخل من باب واحد ودخل من ابواب متفرق بعض هم یا قبول سلاط سلام تدبیر می تدبیر می کند باز هم برنامه ریزی می کند. سبحان الله چقدر این پیامبر دلش می لرزد دستش می لرزد چون که ضربه دیده نمی خواد دوم ضربه ببیند و قال یا بنی لا من ابواب من باب واحد میگه ای فرزندان من داخل نشوید از یک دری و دخلو من ابواب متفرق داخل بشید از درهای متفرق از درهای متفرق داخل بشید چرا این میگه؟ بعضیها اکثر مفسرین اینا این نوشتند که اینها فرزندان یعقوب بودند برادران یوسف بودند خدای عز و جل بینها چنان قد و قواره داده بود قد و قامت داده بود زیبایی داده بود که یکی از یکی زیباتر یکی از یکی جوانمرتر یازده تا برادر همه با هم لذا یعقوب علیه السلام اینا را گروه گروه کرد گفت نه شما از درهای مختلفی برید هر کسی چشمش بیفته نظر حق عین حق در رابطه با نظر خدمت شما بگم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که العين حق یعنی اینکه چشم انسان کسی را بگیره بعضی ها از عزوجل در چشمشون یک زخمی گذاشته که وقتی که به یک دید خاصی نگاه می بعضی به دید خاصی هم نه بدون اراده خود به خود این چشمشون زخمش را میزنه به طرف زربش اش را میزنه به همین خاطر در حدیث آمده وقتی که شما چنان حالتی دارید و چشمیتون گاهی گاهی ای هست که این بچه از کنم که چنان ناز هست چنان دوست داشتنی هست که تا کسی میاد میگه که چقدر این بچه نازه و محبت بچه در قلبش می، میاد ولی غافل از اینکه چشمش زخم میزنه به بچه بچه فوراً شب مریض میشه حالش خراب میشه از بین میره بعضی وقت اینا را شما تو زندگیتون زیاد تجربه کردید دیگه نیازی به دلیل نداره لذا در حدیث میاد هر کسی که کسی را دیدید و در چشم شما زیبا آمد محبوب آمد دوستش داشتید به خاطر اینکه ضربه به اون وارد نشه بگید فتبارک الله احسن الخالقین فتبارک الله احسن الخالقین بهترین خالق الله است برکت میده زیبایی میده و تمام خوبی ها را میده الله میده اون وقت تمام خیر را زیبایی را به خدا نسبت دادید و اگر در سنن ترمیزی روایتی هست و اگر یک وقتی چشم کسی زد بچه ای را دیگه چیزی ای را اینجا در اصطلاح ما در عرف ما مردم تخمرگ میارن تخمرگ میشکنند که چشم چه کسی یک چیز تجربی از تخمرگ هم واقعا میشکنه ولی اینها ثبوت نداره ولو اینکه شما تجربه کردید تخمرگ میشکنه بعض هم شما این کار را نکنید این خرافاته اون چیزی که در حدیث آمده اگر کسی متوجه بود که چشم من بود که این ذر این چیکار بکنه غسل بکنه آب بریزه روش رو بدنش غسل بکنه همین آبی که جمع میشه تو تشت بعد با همین آب روی همون چیزی که نظرش افتاده حیوانی هست گوسفندی هست انسانی هست چیزی دیگه هست با همین آب برون بریزه اللہ تعالی الله اون از بین میبره علا ای حالن، این حق است بسیاری گفتند که منظور یعقوب علیه صلی این چشم بود و بعضی میگند یعقوب علیه وقتی که احساس کرد که عزیز مصر به دنبال این برادران هست گفت که ای بنیامین را ببرید ولی خودتون را نشون ندید شاید همین طور که اینکه چون بازم احساس خطر میکرد بدون که ببینه متوجب بشه گندومتون را بگیری تو برگردید به این خاطر بچش مینایید کسی تشخیص نده که این همون کنانی ها هستند شما جدا جدا برید والله اعلم اما الله تعالی می فرماید وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد اي فرزندان من شما داخل نشيد از در واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وداخل بشيد از درهاي متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء دف شبهة من دف نمي كنم دور نمي كنم از شما از قزاء الله شيء من الله من قزاء الله از قزاء والتقدير الله من نمي چیزی چيزي ردف كنم من کاری نیستم یعنی من پیغمبر خدا هستم بنده خدا استم قدرت به دست الله تصرف به دست الله این الحکم الا لله حکم و فیصله نیست مگر برای الله خدا هر چی فیصله بکند فیصله نف میکنه فیصله زلل میکنه فیصله نجات میکنه فیصله گرفتاری میکنه علیه تو و علیه فلی توکل المتوکل این از توکل قبلا ذکر کردم این پیامبر در وصف توکل معروفه ولی ببینی توکل این پیامبر چیه اسباب ظاهری را انتخاب میکنه اسباب ساهری را بیکار میبره بعدا توکلش به اسباب نیست به این تدبیر و برنامه ریزی خودش نیست میگه الله مگر بکنه علیه توکل تو فقط و فقط بر او توکل کردم و علیه فلی توکل المتوکلون فقط و فقط بر او با توکل بکنند توکل کنندگان پس ببینید اسباب را هم کنار نگذاشت ازشون استفاده کرد بلکه خدا الله عزوجل میفرماید بچه های یعقوب توصیه پدر را عمل کردند. همونطور که گفته بود، به صورت متفرق و جدا جدا آمدند. اما چیزی را که خدا فیصل کرده، هیچ تدبیری، هیچ برنامه زی نمیتونه جنایت را بگیرد. الله تعالی از بالا چیزی دیگه میخواد. به پیامبرش هم اعلام نمیکنه. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم زمانيك داخل شدان از همون جهتی که امر کرد اونها رپدریشان ما كان يغني عنهم من الله من شيء الله میگوت اینجا پیامبر من نبي من یاقوب دفن کرد از آنان ما كان يغني عنهم از انها دفن کرد من اللہ یعنی من قضاء اللہ از قضاء و تقدیر اللہ من شیئن ہی چیزی را یعقوب نتوان اس قضاء الہی را پس بزند الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها لیکن این یک نیازی بود یک تدبیری بود حاجت بمینه تدبیر برنامه یک برنامه ریزی و یک تدبیری بود که احساس کرد در دلشت در نفس یعقوب بود که قضاها ها اون را انجام داد لذا احساس کرد که این کار را بکنم و انه لذو علم لما علمنا الله می فرمایعقوب تدبیر داشت علم داشت ولی علمش را کی بهش یاد داده بود ما یاد داده بودیم انبیاء همه علم دارا استاد همه الله هست انبیاء بغیر از الله از حد کسی دیگه چیز زیاد نگرفتند و انه لذو علم لما علمنا همان یعقوب دارای علم بود اما اون علمی که ما به دادیم ما به یاد دادیم و لیکن اکثر الناس لا يعلمون اما اکثر مردم نمیداند الا ای حال یعقوب علیه صلی اللہ دستور داد اینا اجرا کردند یوسف علیه صلی اللہ هم در انتظار بود لحظه شماری می کرد اینا کجا می تونه مخفی بشند هر کسی می آمد از دور می آمد یوسف نگاه می کرد برادرانم بالاخره تا تاکی آمدند یوسف پیششون رفت یا طلبید گفت آمدید بالاخره. همین برادر شما بالاخره تحویل گرفت استقبال کرد خدمت کرد، پذیرایی کرد و یوسف علیه صلی و سلام ترتیبی داد که بنیامین را با خودش برد الان این ترتیبش والله و علم به صورت بود؟ یوسف علیه و به صورت دو دو نفری هم برای قضا و پذیرایی و هم برای استراحت و خواب تاین کرد اخر بنیامین را گفتتو که تنها اصدی تو با من وقتی که اون را با خودش برد خلوتش کرد گفت که من برادر تستم یوسفم صحبت نکن و احساساتی نشو صبر کن هر کاری که من میکنم تو اعتراض نکن ولما لما دخلو علی یوسف وقتی که داخل شدم بر یوسف آوالیه اخا جایدات پیش خودش برادرش را به وقت شب ایوا همون استراحت را میگند اون اسکان را میگند اسکان در اتاق خودش در خوابگاه خودش اونجا بهش بهش اعلام کرد خالا انی انا اخوک همانا من برادرت هستم همون برادری که بنیامین. لابد یادش نبود اون زمان خیلی کوچک بود ولی بنیامین هم دیوانه برادر بود کسی که بلاخره از همون ابتدا پدر را ببینه که شب و روز میگه یوسف یوسف و بنیامین هم تنها باشد و میبینه همه برادرم با هم هستند از یک مادرند اون برادری که مال مادر منی نیست اون چه حالی داشت خدا میدونه قرآن نگفته ولی هر یکی از ما این احساس را داریم هر یکی از ما این شعور را داریم میدونیم که بنیامین چه وضعیتی داشت بنیامین در قلب خودش در درون خودش چه آتشی داشت برای یوسف و چقدر می‌خواست دلش می‌خواست که بدون یوسف کجاست یوسف چی شد ز الله می‌فرمايت قال انی انا اخوک گفت همانا من من برادرت هستم فلا تب تئس بما كانوا يعملون تو غمگین نباش فلا تب فلا تحزن تو غمگین نباش تو اندوهگین مباش آنکاری که خادم های امامی کنند تو فقط سکوت کن هیچ نگو بنیامین از خدا میخواست که اینجا پیش یوسف بماند گهسته از یک طرفی اینا همه در دوراهی هستند از یک طرف وضعیت پدر اما از یک طرف یوسف گمگشته سالها دوری چهل سال لذا کجا میخواد از یوسف جدا بشه سبحان الله فلما جهزهم بجهازهم زمانی که آماده کرد جهاز آنها را وسایل را جعل السقايه في رحل اخی این تدبیر را بعداً تو آیه می‌خانیم الله بهش الهام کرد بهش وحی کرد قرار در سقایه را در وسایل برادرش در اون کیسه برادرش است چیه؟ سقای اون ظرفی را میگویند که تو اون آب می‌خوردند میگویند که این ظرف مخصوص یوسف علیه السلام بود از نقره بود تو این ظرف آب می‌خورد اما ما چند آیه بعد میخوانیم که آمده سواع الملك، اون پیمانه پیمانه که با او گندم‌ها را پیمانه می‌کرد. حالا اینجا بس اینه که آیه این سقایه بود، پارچه آب بود، لیوان آب بود، یا این از کنم که واحد اندازگیری و پیمانه بود. مفسرین میفرمایند که هر دو بود در گذشته دیگه اینقدر امکانات و رفاه نبود که هر چیزی جداگانه باشه هر ظرفی جداگانه میشه. بالاخره این یه ظرفی بود ظرف خوبی بود هم باش کیل می‌کردند هم در اون آب می‌خوردند هم برای مصارفی دیگه هم بود لذا این تعارضی نداره ماگاهی همینطور هستیم یک پارچی هست توش آب هم میزاریم گاهی تو همون پارچ شیر هم میزاریم لذا این پارچ شیر یا پارچ آب هر دو هست لذا ولم فلم ما جهازهم به وقتی که جهاز و وسایل انها را آماده کرد جعل سقایت فی رحل اخی اون ظرف آب را در وسائل برادرش گذاشت بعد اینا که رفتند اعلام کرد گفت ایتوها العیر ای کاروانیان انکم لسارقون شما سارق استی و دزدی کردید بیایید شما تلاشی بکنیم شما را تعجب کردند بی خبر بودند قالو و اقبلو علیهم اون کاروانیان گفتند برادران یوسف گفتم وقتی که و اقبلو عليهم با اونها روبرو شدند قبل از دور جار زدند وقتی آمده از نزدیک روبرو شدند گفتم ماذا تفقدون چی چیزی را گم کردید قالو نفقد سوال ملک ما پیمانه پادشاه را و اون پیمانی که برای مردم گندم کیل میکنند اون پیمانه را گم کردیم حتما شما برداشتید اگر هر کی برداشته خودش بیاره جایزه تاییم میکنیم ولی من جابی حمل و بعیر هر کسی خودش بیاره یک بار شطور بار شطور گندم بهش میدیم و انا زعیم و انا بهی زعیم این جارچی میگفت من زامنم من قول میدم خودتون بیارید من یک بار اضافه به شما میدهم اما برادران خبر نداشتند بغیر از بنیامین قالوا اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لنفسد في فِي الْأَرْضِ قسم به خدا شما هم می دونید ما برای فساد نی آمدیم ان دوزدی فسادی هست لنفس دا الْأَرْضِ یعنی لنسرقه ما نی آمدیم که شما انجا بیئیمو دوزدی بکنیم وما کن صارقین ما اصلا پیشه سرقت نیست ما در اخلاق ما در سابقه و پیشینه ما از دوزدی اصلا نیست ما چرا دزدی بکنیم اونا گفتم بلفرض اگر شما دزد در آمدید اون وقت چی؟ اون وقت قانون خود شما چی میگه با شما چطور رفتار بکنیم یوسف علیه السلام میدونست که در شریعت یعقوب کسی که دزد باشد باید یک سال برای صاحب مال خادم باشه یک سال بردش بشه خدمتش را بکنه میخواست این اقرار و اعتراف را میخواست خدای تعالی میگه ما این تدبیر را بیوسف نشان داده بودیم میخواست با همین تدبیر برادرش را نگه دارد نگذارد که با انها بره به عنوان زندانی نگه دارد به عنوان اینکه پیمانه را برداشته و بقیه را بدرغه بکند بسفارت به خدا این یکی را نگاه دارد لذا میخواست اقرار را از خودشون گفت که بذاری تو دین ملک ما و پادشاه ما و قانون کشور ما چیه پیش شما قانون چیه ما میخوایم اصلا به قانون شما عمل کنیم قالو فما جزاؤه این کنتم کاذبین عمله گفتن خدمه گفتن جزای اون چی خواهد بود اگر شما دروغ گو بودید قالو جزاؤو آنها گفتن جزای اون فردی که این را دزدیده، من وجد فی رح هر کسی که پیمانه یافته شد در کیسه او در غذاهای او در گندمهای او فهو جزاؤو خود او جزاست یعنی خودش را تعویل بگیرید خودش میشه مال شما ابید شما خادم شما ازش کار بگیرید تا دوباره دزدی نکنه کذالکنا ضد ظالمین ما این گونه بکیفر اعمال میرسانی معجزه امیدیم ظالمین را یعنی دزدان را از ظالمین به سرقه هر کسی دزدی بکنه ما این طور میکنیم باش قانون ما اینه بالاخره گفت خوبه بیادت کساره باز کنید اول شروع کرد از بقیه از بنیامین شروع نکرد که کسی مشکوک نشه فبدأ بی قبل وعاء اخی آغاز کردن ظرف اونها را کیسه های را کیس قبل وعاء اخی قبل ظرف برادرش قبل از کیسه بنیامین اول از اونها شروع کرد ثم استخرجها من وعاء اخی بعدن هم پیمانه را در آورد آخر الامر وقتی که نوبت بنیامین رسید گفت عجب اینجا است پیمانه را از کیسه بنیامین بیرون کرد اینجا الله تعالی می فرمائی کذالک کدن علی یوسف این کید را این تدبیر را این نیرنگ را ما برای یوسف برای کردیم که این طور کار بکند این حیل را تفسیر جلاله نویشته ای علمناه الاحتیال بی اخز اخی خدا میگه ما به او یاد دادیم چهیلی بکار ببرد که برادر خودش را دریافت کند لذا خداوند بی یوسف کرد که از خودشون بپرس بعدن بر اساس جواب خودشون بنیامین اتر تحویل بگیر ما كان لياخذ اخاه فی دین الملك اگر بر اساس دین پادشاه بود و قانون مصر بود نمیتونست برادرش را از اونها بگیرد ما كان لياخذ نبود که برادرش را بگیرد طبق قانون پادشاه الا یشاء الله اگر خدا بخاطر لذا خدا خاص به این سوره راهنمایی کرد طبق قانون پادشاه چی بود پادشاه میگوین مفسرین این بود که اگر کسی در اینجا دزدی می کرد هرچی دزدی کرده باید بی آورد همون اندازه دیگه بی آورد مثلا اگر هزار درهم دزدی ده باید 2000 درهم بیارد تحویل بده هزار همون اصل مال هزار دیگه جریمه لذا اینجا این پیمانه رو باید می آورد یک پیمانه دیگه این هم باید می آوردن خب دارا به هر صورت شده تلاش می میرفتن بلاخره هرچی داشتن می فروختن برادرشون را نجات می اما نه طبق اون قانون اصلا مطرح نشد از همون اول مطرح شد طبق قانون خود شما بنی اسرائیل طبق قانون خود شما فرزندان یعقوب لذا ما کان خود و نبود تا برادرش را فی دین ملک طبق دین پادشا و قانون پادشا الا ان الله مگر اینکه خدا نرف نرفع درجات من نشا ما بلند بالا میکنیم کنیم درجات هر کسی رو که بخوایم و فوق کل ذی علم علیم بالای هر ذی علم یک علیم است. هر کسی علمی دارد اما بالاتر از علم او علیم هست یعنی یوسف هر چقدر فهمیده بود دانایی داشت، فراست داشت، علم داشت اما الله عزوجل الرحمای می کرد معتز خدا بود اما ببینید نمک نشناسی این برادران را که اینها وقتی که برادری یوسف بنیامین به عنوان دوست معرفی شد اینها اوغدهای قدیمی خودشون را دوباره تخلیه کردند گفتن که فاطشا عزیز مصر ما بقیه برادران نیستیم اینا هستن چرا اینا دو تا برادر هستن از یک مادر هستن یکی قبلا هم همین دزدی کرده بود اونی که قبلا بود او دزدی کرده بود الان نوبت این هست میخواستن خودشون رو تبرئه بکنند قالو اي يسرق فقط سرق اخوه له من قبل اگر این دزدی کرده هم آنها دزدی کرده برادرش قبل از این قبل از این برادری ای داشت اونم دزدی کرده بود یوسف علیه صلات و السلام سبحان الله اینجا ببین صبر را اینجا ببین تحمل پیغمبری را فأسر را یوسف فی نفسه یوسف این را مخفی کر در دلش ولم یبدها لهم بعض هم ظاهر نکرد برای اونها نزد تو گوش چی داری میگی؟ کنترل کرد خودش را این ها صبر پیغمبری ولم یبدی لهم اما تو دلش گفت قال انتم شر و شما بدترین هستید از نظر جایگاه و رتبه والله اعلم و بما تصفون خدا بهتر میدونه اون چی که شما بیان میکنید که آیا برادرش سرقت کرده یا نکرده اهل تفسیر میگویند که یک چیز ظاهری شده بود اینا میدونستن واقعیت را ولی خب اینها میخواستن یک اغدهی خالی بکنن اون ظاهری چی بود حضرت اسحاق علیه سلات و السلام که پدر یعقوب باشد سیدنا اسحاق به عرص گذاشته بود یک کمربندی را اون چیزهایی که گذاشته بود یک کمربندی را به دخترش داد خوهر یعقوب امی یوسف این کمربند خیلی برای اون خواهر ارزش داشت و حتی اهل تفسیر نوشتن یعقوب میخواست که اون بهش بده اون خواهر نمیداد بش بعد از اینکه که یوسف علیه و السلام مادرش فوت کرد در زمان زایمان بنیامین یوسف بچه بود خیلی کوچک بود نیاز به نگهداری داشت لذا امه یوسف یوسف را پیش خودش برد یعقوب داد به خوهرش که یوسف را نگهداری بکند و بنیامین را به زن دیگرش که هم از کنم خواهر مادر یوسف بود خاله یوسف بود به اون داد اون نگهداری بکند این دوتا برادر را از هم جدا کرد عمه یوسف بخوبی از یوسف مراقبت کرد هر روز بالاخره یعقوب هم میدید پیش یعقوب هم می آورد اما شب و روز در اختیار عمه بود و عمه با توجه به اون زیبایی که یوسف داشت با توجه به رعنایی که یوسف داشت و یوسف خیلی دوست داشتنی بود هم عمه گرفتار یوسف بود گرویده یوسف بود از یک مادر مهربان تر یک لحظه بدون یوسف نمی اما یوسف وقتی که دوران توفولیتش گذشت چند سالی گذشت به شش سالگی و هفت سالگی و بیشتر و کمتر رسید این زمان دیگه باید تحویل یعقوب می داد. یعقوب گفت که یوسف را می برم خیلی گریه کرد گفت پیش من بگذار گفت نه من هم نیاز به یوسف دارم هر یکی برای یوسف یه حالت خاصی داشتن لذا این میخواست که یوسف را پیش خودش نگه داره همون کمربند را به کمر یوسف بست زیر لباس های یوسف مخفیانه و روزی که آمد یوسف را تحویل بده اون را فرستاد با اون کمربند کمربند به کمر یوسف بسته بود و بعد از اون همون امه آمد خانه یعقوب و گفت که کمربند گم شده یکی از بچه های تسخونه برداشته بالاخره بچه ها تلاشی کردن کمر یوسف بسته بود او گفت بر اساس همون قانون شما و شریعت شما یوسف باید یک سال پیش من باشه یعقوب علیه صلی اللہ علیه هم متوجه شد که خواهرم چقدر به یوسف بالاخره محبت داره و با این حیله میخاد یوسف را پیش خودش ببره یعقوب علیہ السلام هم نادیده گرفت گفت باشه ببرش همه میدونستند که یک مسئله سوری بود ظاهری بود حقیقتی نبود اما اینجا برادران همین را به عنوان یک دوزدی در حال که خودشو میدونستند به عنوان یک دوزدی را عنوان کردن گفتن اگر امروز دوزدی کرده دیروز برادرش همین کار را کرده. یوسف علیه السلام بالاخره هر چی در دل گفت ولی گفت باشه ما بنیامین را می‌بریم بنیامین را بردند اینها التجا کردند تضرع کردند پیش یعقوب علیه السلام پیش یوسف علیه السلام آمدند خواهش کردند قالوا یا ایها العزیز این تدبیر برادران است قالوا <سؤال> يا أيها العزيز، <سؤال> إن له أبن شيخا كبيرا، أي عزيز مصر، إن برادر ما بدردارد که شيخ كبير است پير مرد است. خیلی ضعیف است اون بیشتر از این تحمل جدایی ندارد فخود احدنا مکانه یکی از ما را بجای او بگیر و این را بذار که بره پیش پدر نا نراک من المحسنین ما تو را آدم نیک کاری میبینیم آدم رحم دلی میبینیم رحم کن بر ما ما را زندان کن ولی این را بذار یوسف علیہ السلام چی جواب داد؟ یوسف گفت قال معاذ الله فنا به خدا فنا به خدا از این ما غیر دوز را بجای دوز ببریم. اونے کہ گناہ ہی نہ کر دو اور ببریم تنبیہ بکنیم ما اں کار نہ میکنیم۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا۔ ان اگر بگیر مگر اون ک کی یافتیم قال ایمن را انذو اگر ان کار ر بکونیم ان اذا ظالمون ما درین ہنگم ظالمیم ما ظلم نمیکنیم ما کار نہ با بقیے۔ ما مجرم را مشراسین۔ بالاخره بنیامین را بردند هم یوسف به هدفش رسید هم بنیامین به هدفش رسید اما برادران دیگه پریشان یک گوشه نشستن با هم مشوره کردن بیایید جمع بشید چه بکنیم چه حیله بکنیم چه تدبیری چه نقشه وقتی که با هم جمع شدن اون برادر بزرگ که یهوزا بود اون گفت من که رو ندارم پیش پدر بیام من همین جا میمانم من همینجا به اخره تو مسافرخانی یه گوشه‌ای میمانم و این سالی که این به اینجا بماند این سال را من هم همینجا دور دور ازش مراقبت میکنم خدمت اینها میکند من هم به در کنارش خواهم بود و شما به پیش پدر برید بگید که پدر این اتفاق لفتاد افتاد دزدی کرد ما مقصر نیستیم خودش مقصره بلاخر آخر مشوره بر همین شد که یهوذا بماند بقیه برگردند و این پیغام را به پیش پدر ببرند فلم مستع اصومنه وقتی که نامید شدند از پادشاه از عزیز مصر خلصو نجیین یعنی خ... تنها شدند نجیین برای جلسه خصوصی نجی میگوند حرف خصوصی سرگوشی جلسه خصوصی برای اینکه خصوصی با هم صحبت کنن تنها شدند قال کبیرهم اون تریشون گفت چه به اعتبار عقل چه به اعتبار سن یهودا گفت الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله یعنی شما نمیدانید که پدر از شما پیمان گرفته از شما عهد گرفته قد اخذ عليكم موثقا من الله پیمانی از خدای عز یعنی خدا رو در وسط قرار داده و من قبل ما فردتم فر فی یوسف قبل از اون کوتائی که شما در باری یوسف کردید نمیدونی شما چقدر پیش پدر مغسرید قبلا کوتائی هم از شما بود الان هم این پیمان را دادید چطور بدونی بنیامین میخوای برید من یکی که نمیام فلن ابرح الارض من هرگز از این زمین جدا نمیشم یعنی از این زمین نمیرم ارد ارد مصر است از مصر نمیرم تا اینکه خود پدر به من بگه بیا یا یعنی اینکه خدای از زوجل برای من فیصله بکند برادرم را بتونم تحویل بگیرم میام بدونی اون نه فلن ابرح ارض حتی یعذن لی ابی هرگز از این ارد مصر من جدا نمیشم حتی که اجازه بده پدرم من او یحکم الله لی یا خداوند برای من فیصل خیر بکند و هو خیر الحاکمین اون ذات بهترین فیصل کننده هست لذا شما برید ارجعو الى ابیکم شما پیش پدر برگردید فقولو یا ابان ان ابنک سرق ای پدر فرزند تو دزدی کرد ما شاهد دزدیش نیستیم اونجا ندیدیم که اون چیز اون برد دارد اما اون چیزی که ما دیدیم همینه که از کیسه او از از کنم میان های اون سوا در آمد درامد. در آمد و ما شهید نا الا بما علمنا ما گواهی نمی‌دیم مگر اون اندازه که علم داریم دونیم و ما کننا للغیب حافظین ما از غیب خبر نداریم ما غیب را حفظ نکردیم یعنی خبر نداریم محافظ غیب نیستین که پشت پرده چه خبر و چه چیزی شد چه اتفاقی افتاد ما نمیدونیم و میدونستن که پدر اعتماد نداره پدر باور نداره پدر شما حرف ما را قبول نمی کونی خب قبلا ما تنها بودیم در جریان یوسف الان یک کاروانی با ما بوده تمام کنانیها بوده شما از این کاروانیان بپرسید ما راست میگیم دروغ میگیم این شاهد داشتند واسال القريه التي كنا فيها شما بپرسید از قريه از قريه یعنی از اهل قريه از کنانی ها بپرسید یا بعضی میگم مراد از قریش مصر هست بری شما از اهل مصر بپرسید اون جا بری شما تحقیق بکنی اهل مصر به شما خاند گفت که جد اتفاق افتاده اون قریه که ما در آن بودیم اهل مصر و همچین کاروانی که ما در آن کاروان آمدیم کنانی ها از همه بپرسید از مصری ها بپرسید از کنانی ها بپرسید و انا لصادقون ما در این حرف صادق هستیم ما در این حرف راست میگیم دروغ در نمیگیم قال بل سوالت لكم انفسكم امرا الا ايها الازنجا یک برادر مانت بقیه برادران آمدند اینجا پیش یعقوب یعقوب میبینه که الان دو تا کمه هم یهودا هم بنیامین نیست چه خبره اینا داستان را بلاش تعریف کردند اما یعقوب علیه السلام اطمینان داشت که فرزند من دوزدی نمی کنه ولی نمی دونست که این هیله، این توتعه این مالکی هست فقط همین قد گفت قال بل سولت لکم انفسکم امره برای شما نفس شما یک امری را زیبا جلو داده آراسته کرده سوولت آراسته کرده زیبا جلو داده شما میگید فرزند من دزدی کرده نه چنین نیست شما واقعیت را نمیگید فصبر جمیل صبر من صبر جمیل است ای فصبری صبر جمیل من صبر میکنم من آه و فغان نمی کنم من داد و فریاد نمی کنم من شکوا نمی کنم صبر جمیل اون صبری را میگن که توش شکوا نباشد اون صبر انسان اگر اشک بریزد این منافی با صبر نیست ولی اینکه انسان یک کلمه ناشکری و ناسپاسی بیاره این با صبر در تضاد دست الله می که اصل الله ان یاتینی بهم جميعا من از الله توقع دارم امید دارم همه را برای من بیاورد هم یوسف را بیاره هم بنیامین را بیاره همین برادر بزرگ را همه بیانجم بشند در این غم امیدوار بود در این پریشانی امیدوار بود این ها سیرت انبیاء که در اوج مشکلات در اوج ناراحتی انها امید را هم از دست نمیدند. اما ما زود امید را از دست میدیم انسان امید را وقتی از دست بده دوچار مشکل جدی میشه از نظر روحی و هم از نظر جسمی در همین ایام کرونا خیلی مردم نامید شده بودند خدا خیر بده یک ایدی به مردم روحی می دادند. اکثرا کسانی که میترسیدن زود از بیماری رفتند. انسان نباید هر اندازه که مشکل برایش آمد انسان نباید ناومید بشه سخت تری سروتان را کسی داره روحیش را دست نبید نده من خدا را دارم خدا را که دارم همه چیز دارم چرا من ناراحت بشم لذا یعقوب علی سلام ببینید چقدر دلش قوی هست ضمن که زار زار گریه میکنه چشمش اینقدر گریه میکنه که و سیاهی چشم از بین میره مردومه که چشم سفید میشه از بس اشک میریزه اما از یک طرف امیدش به خدا زیاد است الله میفرماید اصل الله ان یاتینی بهم جميعا من توقو دارم امید دارم اللہ بیاورت پیش من همگیر انه هو العليم الحکیم همانا ان ذات ذاتی اس علیم هست هر چیز را میداند. الحکیم ان کا با حکمت است. و تولا عنهم وقال یا اسفا علی یوسف اللہ میفرمایت که یعقوب رخ را برگرداند از اونها ناراحت بود دیگه و شروع کرد دوباره یوسف را صدا زدن یا اسفا علی یوسف ای افسوس بر یوسف چی یوسفی داشتم دوباره یوسف را هر غمی که میاد غم جدید میاد غم کهنه دوباره تازه میش میبینیم گاهی بعضی مردم که در گزشت غمهایی دارند غم جدیدی برایش میاد اون غم گذشته تازه میشه اون فرزندی را که ده سال پیش از دست داده دوباره از اون یاد بیکنه این فرزندی را روز پیش از دست داده این هم میگه اون هم میگه غم گذشته هم تازه میشه خاطره گذشته هم تازه میشه لذا یعقوب علیه سلات و السلام غم جدید براش آمد غم ایک تازه شد یوسف ولی غم یوسف غمی, غمی نبود که فراموش بشه لذا میگه وقال یا اسفا علی یوسف افسوس بر یوسف ای وای بر یوسف الله می فرماید و بیضت عینا چشمان یعقوب سفید شده بود من الحزن از بس غم میخورد از بس جوش میخورد فهو کظیم الله میفرماید اون در دلش پر غم بود کظیم حالت قلبش است مملو بود از غم پر غم بود اما بچه تحمل نمی کردن بار بار یوسف بار بار یوسف اعتراض کردند. قالو تاللہ تفتع و تذکر و یوسف سوگن بخدا یاد میکنی یوسف را حتی تكون حرام حتی کتو چی میشی از بیم میری حتی از مریضی را میگند حلاکت را میگند حتی کتو از بیم میری حلاک میشی یا مریض میشی او تکون من الهالکین یا از حالکین میشی کلنان از بیم میری تو روز روز بتر میشی روز روز حالت خراب میشی اما ببینید سیرت پیغمبر را در این غم در بالاترین جایگاه و حد غم و مصیبت باز هم خدا را یاد میکنه کمال در این است که هر وقتی که غم به اوج میرسه پریشانی بالا میشه انسان خدا را زاری بکند زا قال انما اشکو بثی و حزنی الله جز نیست که من شکایت می کنم بثی غم خودم را بس غم عظیم را میگن، و حزنی و غم کم را غم بزرگ و غم کمم را غم بزرگ یوسف است غم کم یمینی است یا بالاخره هر غمی باشد غم بزرگم را و غم کوچکم را همه این غم ها من شکایت می کنم پیش الله، بدربار دربار الله می برم و عالم من از الله لا تعلمون، اما من از الله میدانم اون چیزی که شما نمیدانید، همین قدم میدانم که الله دار امتحان می کنے لذا من سبر می میکنم و هرچی غمی دارم اندوی دارم گریه دارم پیش خدا میکنم با شما کاری ندارم ولی ای فرزندان من باز هم بگردید ببینید تنها به دعا اکتفا نمی فرزندان من شما فتح سو جستجو کنید برادرش را برادرش ولا من الله از رحمت از فایزه الله و از لطف الله هیچ وقت نامید نشید چرا؟ این لا جئاس من روح الله، الا القوم الكافرون. همان اشان این است که از رحمت خدا و از فضل و لطف خدا نامید نمی مگر قوم کافر لذا شما که مسلمان استید، شما مومن هستید، شما مؤمن هستید. شما معتقد به خدا هستید شما بریم بگردید بالاخره فرزندان خودش را نگذاشت آرامش داشته باشند بار دیگر اونها را فرستاد که اونها بروند بگردن یا بنی یذهبو فتحسسو من یوسف و اخیه ولا تیئسو من روح <تصفح> الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز يا أيها العزيز مسنا وأهل ذر وجئنا ببضاع وجئنا ببضاعات مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف يوسف و أخيه اذ أنتم جاهلون قالوا لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين دار اياته گزشتہ در ارتباط با واقعیه سیدنا یوسف علیه وعلا نبینا افضل الصلوات و تسلیمات ما خاندیم که بعد از اینکه الله عز وجل مراحل امتحان و مراحل سخت یوسف را بپایان آوردند بپایان رساندند السلام و یوسف علیه صلی اللہ ابتدا به عنوان وزیر خزانه خزاندار مصر تعین شد و سپس مقام و جایگاه یوسف بالاتر رفت عزیز مصر شد از آیات معلوم میشه که جای نشین و گزین قطفیر یا فوتیفار همون عزیز مصر یوسف علیه و السلام شد خداوند یوسف را در اون جایگاه قرار داد و بعدن مردم می آمدند یوسف به اونها گندم میداد به اونها حسن میکرد برخورد حسنه داشت برخورد خوب داشت تا اینکه برادران آمدند برادران هم گندم دریافت کردند رفتند و بنیامین را آوردند اما یوسف علیہ السلام با تدبیری که رب سبحانه و تعالی به ایشون و نازل کردند بنیامین را پیش خودشون نشان نگه داشتند نگه داشتنی بنیامین از یک طرفی کم کم امتحانات یوسف را به پایان می رسند. کم کم عزیزترین افراد خودش را می دید اما از طرفی امتحان را برای, یوسف، برای یعقوب مشکل تر می کرد یعقوب همون یک فرزند را یوسف را سالها از دست داده بود و او را نمی دید و برای او داد و فریاد می کرد شب و روز انتظار می کشید و این زخم زخم دوم شد الله عزوجل می خواست که بیشتر این بنده صابر خودش را و این بنده متوکل خودش را امتحان بکند لذا غم بر غم پریشانی بر پریشانی بر یعقوب علیه و السلام وقتی که بهش گفتند که جریان از این قراره به غیر از اینکه گفت من صبر میتونم بکنم چیزی دیگه نگفت و شکایتش را غمش را اندوهش را به رب العالمین عرضه کرد انما بثی و حظنی الله و ااهلم و من اللهمال تعلمون. اما بعد از این فرزندان خودش را نگذاشت که آرامش داشته باشند نگذاشت که در خانه بمانند در خانه بنشینند به فرزندان دستور داد فرزندان من بروید بگردید برید. یوسف را پیدا کنید برادرش را پیدا کنید این همه سال گذشته هنوز از یوسف نامید نیست در سر فهرست یوسف است اول از یوسف نام میبرد بعدن از بنیامین نام میبرد معلوم میشه که خیلی با یوسف علیه صلی و سلام وابستگی داره بعد از این همه سال هنوز این زخم کنه حتی نشده و اول در صدر یوسف قرار داره چرا چرا ناامید نمیشد چرا مایوس نمیشد چرا دلش سرد نمیشد به دلیل اینکه اون خواب را که یوسف علیه الصلاۃ تعریف کرده بود یعقوب علیه السلام منتظر تعبیر اون خواب بود ازعان داشت باور داشت که یوسف علیه الصلاۃ یک روزی میاد و در یک جایگاه خاصی در یک جایگاهی که همه ما به او ادای احترام میکنیم با توجج به اون خواب به اون جایگاه قرار میگیرد به این خاطر اول از یوسف نام میبرد یا بنی یذهبو ای فرزندان من بروید شما فتحسسوا من یوسف جستجو کنید یوسف را بگردید برای یوسف و اخیه و برادرش بنیامین چرا سبوميرا نام نبرد چرا يهوذا را نگفت چون یهوزا خودش با اختیار خودش اونجا مونده بود و یهوزا مشکلی نداشت ولا تيئسوم الروح الله از رحمت الله و از فيز غیبی الله عز و نا امید نباشید که خداوند عز فضل خاص می کند رحمت خاص می کند شما فرزندانم نا امید نباشید اِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اما نشان این است که از رحمت خدا و از فیض الله عز از فضل الله نا امید مگر کافر اینجا مسئله را حضرت یعقوب علیه السلام عنوان کردند که خلاصه اون مسئله اینه که کسی که به خدا ایمان دارد هیچ وقت نباید ناامید بشه ولی اینکه اسباب اسباب ناامیدی باشند اسباب اسباب یأس باشند در رابطه با هر قضیه هر جریانی وقتی احساس میکنیم هیچ امیدی نیست ولی باید به رب امید داشته باشیم و خدای از خیلی دوست میدارد که بندگانش در کمال ناامیدی به خدا امید داشته باشند خداوند میفرماند من بر اساس گمان و زن بندگانم رفتار میکنم وقتی که به من گمان نیک داشته باشند من همان گونه عمل می کنمم بسیاری افراد هستن که خدای از زواجل را به صورت معجز نجات داده از حوادث اتفاقات اعدام دیگه مسائل اللہ تعالی لطف کرده در زمانی که کاملا نامیدی نا بوده انواع مریضی ها انسان تا دم مرگ رسیده حتی میدانیم کسانی که مردم برای اونها به فکر کفن بودند تا این حد رسیدند اما خدا تعالی نجاتشون داده لذا نباید از رحمت الله نامید بود و اون کسی که نامید هست قوم کافر هست قوم مسلمان نامید نمیشه لذا یعقوب این نصیحت را به فرزندانش میکنه بالاخره از یک طرفی برای یوسف فرستاد انها را از یک طرفی آزوغه هم تمام شد چیزی نداشتن بخورند اون خوراکیی که آورده بودن گندمی که آورده بودن زود تمام شدن از طرف دیگر گفتن که فرزندان من بری شما چیزی گندم هم بیارید معاملی هم بکنی، گرچه چیزی پولی هم نداشتن سبحان الله در این روزها سخت تری بود وقتی خدای تعالی بخواهد بنده خودش را سخت امتحان بکند از هر جهت امتحان میکند هم فرزندان را از دست داده بود و فرزندان نبودند برای فرزندان پریشان بود هم در خانه برای خوردن چیزی نبود تمام دنیا قهطه بقیه مردم میروند چیزی میدن پولی میدن میخرند پولی هم نداشت پولی هم در بسات نبود ایت سری پول ای پولهایی بود که ارزش آنچنانی نداشت در حدی نبود که به توان گندم بگیرند لذا از هر جهت کم بود داشتند لذا فرزندانی یعقوب الان برای اونها هم سخت بود این وضعیت برای اونها هم قابل تحمل نبود رفتند پیش یوسف و کلماتی که به یوسف گفتند فلما داخل علیه زمانی که بر یوسف داخل شدند بر سوم رفتند قالو یا ایوها العزیز ای عزیز مصر ای بزرگوار مسنا و اهلنا هم بما و هم به اهل ما آسیب رسیده الضر ضر یعنی عصیب ما کاملا آسیب زده هستیم ما کاملا مصیبت زده هستیم وزی نداریم وزی نداریم هم از نظر غم و اندوه در خانه همیش گریه هست همیش داد و فریاد هست و هم از نظر مال چیزی نداریم و آوردیم پولی که آوردیم بضاعت مزجات هست بضاعت مزجات یعنی کالای مختصر کالایی که به اندازه گندم نمیشه بزاعت مزجات را تفسیر خازن تفسیر کرده بزاعت ردیتن کاسدتن یعنی پولی آوردیم که پول ردی هست درس گذشته ارز کنم که ارزش پول ها و ارزش شکه ها با اون ایار بود ایار نقره چی اندازه بالا بود ایار طلا چی اندازه بالا بود اگر ایار پایین بود از پنجا درصد پایین بود دیگه این به عنوان پول حساب نمی شد این را کسی از دکاندار تحویل نمی گرفت همین تفسیر خازن نوشته که به بزاعت ردیت کاسدت یعنی این پول ردی هست بی ارزش هست که لا تنفق فی الطعام الا بتجووز من البائع این پول را برای غذا و برای طعام هیچ کسی نمی گیرد مگر اینکه فروشنده چشمای خودش را ببندد یعنی پول پولی نیست ارزشی نداشت لذ ما یک پوله به استلا کسه آوردیم، پول آور پوله بی پول هم نداریم گرسنه هم هستیم مصیبت هم داریم پدرمان هم زار زار گریه میکند اینجا یوسف علیه الصلا و سلام نتوانست بیشتر کنترل بکند یوسف علیه الصلا و سلام این وضع را دید از طرف دیگر لابد از طرف خدای تعالی هم اجازه داشت که این بار خودش را ظاهر بکند لذا وقتی که این وضعیت را گفتند گفتند به بضاعه مزجات فاوفلنا الكیل یعنی برای ما کیل کامل بده به ما گندم کامل بده به پول ما نگاه نکن و تصدق علینا بر ما لطف کن تصدق به معنی صدقی نیست چون علامه ابن کثیر نویشت که انبیا صدقه نمیخورند. اینجا تصدق را تفسیر کردم به معنی تفضل بر ما فضل بکن. بر ما احسان بکن. به ما ارزش پول ما را نگاه نکن همین طور به ما بده. و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. بدون شک الله عزوجل پاداش نیک میده کسانی که احسان میکنن کسانی که فضل و لطف میکنن. یوسف علیه السلام وقتی که این را از یوسف خواستند نتوانیس خودش را کنترل بکند من سفی در تفسیر مدارک نوشته لما قال مسنا واهلنا الضر وقتی که برادران این جمله را گفتند که ای یوسف ای عزیز بما واهل و ایال ما بالتمام ما آسیب به حد بالا رسیده و تزرعو إليه و پیش يوسف زاری کردند و طلبو منه ان يتصدق عليهم و خاصاً گفتن بر ما لطف بکن بما مفت بده ارفزت عيناه چشمان یوسف اشکبار شد و لم يتمالك و خودش را نتونس کنترول بکنه الى انعرفهم نفسه تا اینکه خودش را معرفی کرد با این کلمات معرفی کرد گفت قال هل علمتم ما فعلتم بیوسفه و اخی؟ شما می دونید با یوسف و برادرش شکر دید؟ اذ انتم جاهلون زمانی که شما جاهل بودید نمی دونستید کیچی میشه اینا تعجب کردن از کجا یوسف را میشناسه اسم او را اینا فقط گفته بود ما یک برادر داشتیم گم شده گرگ خورده اسم او را از کجا می دونه؟ رفتار بدی که ما با بنیامین داشتیم از کجا معلوم میشه که بنیامین در این چند روزی که با یوسف بوده بود کل ماجرا را تعریف کرد یوسف برای او تعریف کرده بود که با من برادران اینطور برخورد کردن بنیامین از خود تعریف کرده بود که بعد از تو با من هم حسد می کردن. همیشه منو می زدن همیشه منو اذیت می کردن. دیگه بهتر می دونید برادری که در خانه پیش برادران حسود وقتی باشه چه وضعی چه حالی داره لذا تمام اون که تعریف کرده بود از ستمهای اونها اونها رو یوسف به کشید می شما با یوسف و برادرش چکار کردین؟ اینا تعجب کردند از بالا تا پایین از سر تا پا نگاه کردند مطالعه کردند خیره ماندند آخر پرسیدن قالو اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف آیا واغین تو يوسفی چون الان شک کردند شباحت را نگاه کردند قبل اصلا تو فکرش نبودند تو خیالش نبودند يوسف گفت بله قال انا يوسف و هادا اخی من يوسفم این برادرم هست ببین ما به کجا و شما بکجا قد من الله علينا الله بر ما لطف کرد. الله بر ما مننت گذاشت. الله بر ما احسان کرد. اینه که منی اتق سنت الله را بیان میکنه یوسف. اینه که منی اتق. شان این است که هر کسی که با تقوی باشد، خوب گوش کنید. این نصیحت را آویزه گوشی من قرار بدیم. هر ای که با تقوی باشد، خدا ترس باشد و و در مقابله ظلم و ستم دیگران صبر کند تحمل داشته باشد این دو جوهر این دو گوهر یکی تقوا یکی صبر این دو زایه نمی شه فانا الله لا يضيع اجر بدون شک الله عزوجل زایه نمی فرماید اجر چنین مخلصینی را مخلصینی که صبر میکنند هر چی به اونها ستم بشه به خاطر خدا صبر میکنن کی در ظلم میکنه برادرم هست فرزند پدرم هست و زمن صبر تنها صبر کافی نیست تقوا خدا ترسی طاعت بندگی ذکر یاد الله تلاوت همه مواردی که برای تقوا لازم هست خدا جای نمیکند رضا عزیزان این دو چیز کلید حل تمام مشکلات هستند کی هست امروز در این دنیا مشکل داشته نباشه میخاهید مشکلات حل بشه این را الله عزوجل روایت میکنه از زبان پیامبری از پیامبران خودش و رب سبحانه و تعالی در این کلام برای من و شما این را نقل کرده این روایت و این نقل معنا دار است یعنی برای شما بندگان هم همین دو اصل هست انه من یتقی و یصبر همان شان این است هر کسی که با توا باشد خدا ترس باشد، راهش راه پرهیزگاری باشد و در مقابل مصاحب دنیا، آفات مشکلات و مصیبتها صبر را پیش بگیرد بالاخره این توا و صبر ضایع نمیشه. این بهدر نمیره این نتیجش را میده این نتیجیش را در همین دنیا میده در همین دنیا الله عز و جل چنان عزتی چنان سربلندی این آیت بکند که انسان خودش نمیدونه که از کجا آمد پس این دو اصل را به عنوان درس سیدنا یوسف علیہ السلام و سوره یوسف شما همیشه من و شما این را در صفحی قلبمون بر صفحه قلب بنویسیم آویزه گوش قرار بدیم که همیشه هم تقوا پیشه بکنیم و هم صبر فإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وقتی که یوسف خودش را معرفی کرد و ستمهای اونها را اشاره کرد اونها دیگه چی داشتن از خجالت آب شدند دیگه حرفی برای گفتن نداشتند به از اینکه اعتراف بکنند به از اینکه عجز و ناتوانی خودشون را بگند لذا گفتن قالو تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين اقرار به جرم گفتن سوگند به خدا به خدا ما سوگند یاد میکنیم همانا اللہ تو را بر ما ترجیح داد تو را افضل تر قرار داد و این کننا لخاطئین همانا ما در محاسبه خودمون اشتباه کردیم ما خطا کردیم ما حسادت کردیم ما راه درست نبردیم خدا شما را بهتر قرار داد خدا که افضل قرار داد ما چرا بخل بکنیم ما اشتباه کردیم ما را ببخش معنیش همینه ما از تو معذرت خواهی میکنیم کنیم اما ببینید پیانبر خدا را و اخلاق پیامبری را هر وقتی کسی از شما بخشش خواست کسی آمد و عذرخواهی کرد سخت نگیرید چون ما انتظار داریم ما وقتی که عذرخواهی کردیم از رب العالمین گفتیم خدای ما را ببخش و واقعا پشیمان شدیم خدا ببخشد و خدا هم میبخشد لذا ما،, ما سخت نباشیم و بعضی هاستن خیلی سخت میگیرن هرچی طرف میره گریه میکنه دست و پا میفته میگه نه این اخلاق پیامبر نیست اخلاق پیامبر همین هنوز معذرت خیلی کامل نکرده هنوز نگفته سراحتا که منو، ما رو ببخش فقط گفت که ما اشتباه کردیم بس یوسف می گلاتعریبا علیکم اليوم امروز هیچ ملامتی بر شما نیست یغفر الله لكم خدا شما رو ببخشه و هو ارحم الراحمین تسلی میده برادران را نگران نباشید طرف ما ذاتی است که و هو ارحم الراحمین از همه رحم, رحم کننده ها رحم کننده تر است او نمی بخشه او قطع می بخشه لذا شما نگران نباشید ببینید چه اخلاقی چه کرامتی و چه حسن برخوردی نه این که تنها بخشیده بلکه هم برایشون دعا میکنه هم برای اونها را میده یوسف فوراً اونها را چی کرد؟ بخشید چونکه یوسف علیه صلی اللہ علیه میدونست خدا تعالی اینها را سبب قرار داده بود که من باید همین مراحل را بگذارانم اینا اشتباه کردن اینا خطا کردن ولی مقدر من همین بود به بعد خطای اونها فکر نکرد به بعد دیگرش بعد تقدیر خودش فکر کرد لذا قفلا تفریب علیکم اليوم این جمله عیناً جمله‌ای هست بنده در ابتدای سوره هم عرض کردم که داستان یوسف با داستان رسول الله صلی الله علیه و وسلم خیلی مشابهت دارد بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم عزت مندانه مکه را فتح کرد تمام مردم مکه اونهایی که صحابه را شکنجه داده بودند اونهایی که رسول الله را اذیت کرده بودند اونهایی که ستم کرده بودند اونایی که در جنگها بهترین صحابه را شهید کرده بودند همه آمدن سریشون پایین بود گفت رسول الله ببخش رسول الله همین جمله را گفت عینن همین آیه خان لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین هیچ الزامی بر شما نیست هیچ ملامتی متوجه شما نیست خدا شما را ببخشد و خدا ارحم الراحمین است لذا بعد از اینکه این مرحله تمام شد الله عز و جل حالا به یوسوف علیه و اصل دستور میده تجویز می کند که الان پیراهنت را بفرست. پیراهن را بفرست برای پدر که پدر منتظر هست. ذهبو به کمیسی اذهبو به این کمیس من را ببرید پیراهن م را ببرید حاض این قمیس که بتنم هست همین را ببرید. فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِي يَأْتِبَصِيْرًا بر چهره پدر بیندازید بر روی چشمان پدر بیندازید يَأْتِبَصِيْرًا بینامی آید یعنی بینامی شه چشمانش نورش بر ببینید اون چه که یوسف هم یکی از معجزات یوسف بود اما به امر الله بود بار بار خدمت شما عرض کردم که معجزات حق است انبیا معجزات داشتند زیاد هم داشتند اما معجزات به دست انبیا فقط ظاهر شدند قدرت کلید شاه به دست الله الله که به خاطر پیرهن چیکار میکنه شفا میده لذا قال المحققون ان علم يوسف بأن القاء ذلك القميص على وجه يعقوب يوجب رد البصر كان بوحي الله تعالى تفسير خازن ميگه ان کی يوسف ميدانس كه این پیراهن چشمانش رو برميگردد خدا وحي کرد. همون طور كه اون پيراهن اول پيراهن مصیبت بود اين پیراهن پيراهن بشارت اين پیراهن پيراهن نعمت الله عز وجل به همین شکل این بنده خودش را با پیراهنی امتحانش را آغاز کرد با پیراهنی امتحانش را به پایان رسید هر دو پیراهن مال همون یک پسر بودن ببینید پیراهن شفا نمیده الله شفا میده پیراهن کاری نمی کنه بعضی میگویند که ببینید که غیر خدا هم شفا میده از این برداشت غلط می کنند اگر هر پیراهنی شفا بده درست پیراهن پیغمبر شما میگید خو اولین پیراهن پیراهن پیغمبر بود چرا اون وقت شفا نداد تا الله نخواهد لزمانه میتوانیم پیراہن کسی را امامه کسی را پارچه کسی را به چشم گذاریم بگیم که این چشم ما را شفا بده هر وقتی که در وحی بود اینجا برای پیغمبر وحی آمده به این چیزهایی که از طریق وحی و موجزه به صورت خاص ثابت هستن نمیشه قیاس بکنه کسی مسائل اعتقادی با قیاس حل نمیشند انسان بیت و قیاس بکنه بگه چون پیراہن یعقوب شفا داده لذا پیران پیر صاحب هم شفا بده نا خیر موجزه به دستور خدا میشه با وحی الله میشه وحیی که خدا به پیامبرش میکنه اینجا چرا قبلا یوسف علیہ السلام پیراهنش را نفرستاد مگر قبلا برادران تعریف نکردن که و بیضت عینا چشماش سفید شده از بس گریه میکنه قبلا برادران از غم پدر نگفتند از اندوه پدر نگفتند چرا اون زمان یوسف پیراهن نفرستاد چون اجازه نداشت معلوم میشه که هر وقتی که خدا بگه هر وقت که خدا تجویز بکنه میتواند لذا ببرید این را به پیش پدر بینام ید وقتونه بی اهلکم اجمعین این بشارت دوم است مجده اول برگشتن چشم پدر هست و مجد دوم وقتونه بی اهلکم اجمعین همراه با اهل و ایال همگی بیایید جمع کنید دیگه کنان جای شما نیست اینجا خداوند به ما عزت داده به ما حکومتی داده اللہ تعالی می فرماید وقتی که این کاروان جدا شد از مصر فاصله گرفت همین که از مصر خارج شد به طرف شام در حرکت بود و به اصطلاح چار دست اسبها بود و حیوانات بود یعقوب علیه صلی اللہ علیه احساس که اینجا اون موجزه یوسف است این موجزه یعقوب است معجزات خاص هستند از ماجزات هیچ وقت برداشت غلط کسی نکند یوسف یعقوب علیه السلام احساس میکنه بویی در میاد بوی مجده هست بوی خوش هست بوی پیک خوشخبری هست و بوی یوسف هست به اطرافیانش میگه به اون فرزندان و نواهای که دور و برش هستم میگه که به احساس میکنم به اون یوسف داره میاد اونا میگم پدر پدر بزرگ دیوانه هستی هنوز یوسف را فراموش نکردی بالاخره میگه همون دیوانگی قدیمت هست اما یعقوب میگه نا من میدونم چیزایی شما نمیدونید اللهمی فرماید ولما فصلت العیر زمانی که جدا شد کاروان کاروان از مصر فاصله گرفت از مصر دور شد. قال ابوهم پدرشان در کنعان گفت: انى لا اجدرى حيوسوف من احساس میکنم کنم بوي را لولا انتفن ندون. اگر شما مرا دیوان نگوید دیوان. تفندون در واقع مفند میگوین کسی که پیرو فرتود شده و الزائمر گرفته ما در بلوچی میگیم کاتا کاتا شده اگر به من نگویید که من الزائمر گرفتم فرطود شدم من به احساس میکنم قَالُوتَ اللَّهُ گفتاً سوگاً بِخُدَا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ تو در همون خطای قدیمی هستی ضلالِك تفسیر باسی نیشتا خطای که همون اشتباهات قدیم همون که قدیم بالاخره هزیان می گفتی هر چی که بدغانت می آمد الانم همونم میگی اما یعقوب علیه صلی و وسلم متوجه بود این معجزهی بود که الله تعالی به یع من این مسئله را مقداری روشن تر بکنم به این دلیل که خیلی ها هستند امروز از اهل خرافات که از احادیث و آیاتی که درباره معجزات هستند از اینها سوی برداشت می و به پیامبران که معجزه داشتند به اونها اوصاف خدایی می دند علی مثلا این معجزه درباره یعقوب هست میگه ببینید پیغمبر چند صد کیلومتری و چند صد فرسخی را بورا احساس میکند این خودش نشانی از علم غیب است اگر این علم غیب داشت تو چای کنعان میدید انکه چند متری بود یا مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و در حدیث شریف هست که دو تا درخت رسول الله میخواست که حائل بکند سایه درست بشه یک حجابی درست بشه اشاره کرد رسول الله موجزات زیادی داشت در احادی سامده بیشمار هستند موجزات همه انبیاء را جم بکنید بیندازه موجزات رسول اللہ نمی رسند این موجزهی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در مشکیزه آب دهن انداخت این مشکیزه یک کاروانی را جواب داد تمام کاروان چند صد نفر بودن آب خوردن ظرفاشون را پور کردن کوزه ها و مشکیزه ها را پر کردن آخر مشکیزه اون زنه همون طور پور بود نزدیک به مفجر بشه گفت که مادر ما از آب تو چیزی کم نکردی او آخر رفت پیش قومش گفت که من امروز کسی را دیدم که یا از حر البشر است از همه انسان ها جادوگر ترین است یا همون طور که میگه واقعا پیغمبر خداست بد تعریف کرد این شد و اون شد و خلاصه آب من برداشتند برداشتن من دستباچه شدم آخر همهشون استفاده کردن آب همون طور بود آخر همون رستاش تمام مسلمان شدم به خاطر همین یک معجزه حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنو غذای 5 پنشیش نفر درست کرده یه بزغاله کوچیکی با یک سا آرد یک سا چار کیلو هست رسول الله میگه دست نزینی خودم میان بلاخر آرد را هم چانه میکنم و اما را به دست میگیرم 1400 نفر را رسول الله به وسیله همون غذا مختصر شکمشون سیر شد چند روز گرست بودند در غزوه خندق لذا با یک لیوان شیر لشکری را بلاخر شیر داد همه خوردند آخر لیوان همون ماند. لذا معجزات رسول الله زیاد هستند خب یکی از معجزات همین که دوتا درخت را اشاره فرمودند درخت آمد الان یک ملای یک آخوند بی سوادی نوشته تو کتابش از منطقه پاکستان معلوم میشه که رسول الله مالک بر و بحر است بر زمین هم حکومت میکنه بر از کنم دریا هم حکومت میکنه آسمان هم حکومت میکنه که ما را با اشارش دو نصف میکنه و اینا ماجزه هستند مالک بر و ب مالک زمین و آسمان خدا است خدا اگر به پیامبرش معجزه نشان میده نباید از این معجزه انسان به پیامبر قدرت خدایی بده چندین آیه و معجزه مشرکین از پیغمبر خواستند الله فرمود که شما به اونها بگو قل انما الایات عند الله معجزه به دست من نیست به دست خداست خدا اگر معجزه بیاره شما قبول نکنید عذابتون میده خدا میدونه که شما قبول نمی کنید پیغمبر حتی دلش می‌خواست که موجزه بیاد ولی خدا نیاورد نا، موسی علیه سلیه اصلا موجزه اثار را داشت وقتی که اثار اندخت اشدهان شد خودش فرار کرد خدا گفت یا موسی تخف اینکا من الامینین تو نترس تو ایمن هستی هیچ آسیبی به تو نمیرسی پس موجزه فقط به دست پیغمبر ظاهر میشه کی موجزه را ظاهر میکنه کلید به دستی کیه؟ بدست الله است. یوسف اگر پیراهن خودش را میفرسته که پیراهن یوسف شفا است، الله درو شفا گذاشته. الله این بار در پیر، اون بار نه، بار اول نه، بار اول پی راہن پی راہن مصیبت بود. این بار درو شفا گذاشته. به جای اینکه توهان جت از یوسف بخوایی، بهتر نیست همون الله بخوایی. ما همین میگیم. توحید یعنی همین. یعقوب علیہ السلام وقتی که بوی پیراهن به مشامش میرسه چرا قبلا یوسف در اونچا افتاده بود اون وقت بوی پیراهن به مشامش نرسید شیخ سعدی رحمت اللہ علیه خوب تعبیر کرده یکی پرسید آن گم کرده فرزند که ای روشنگوهر پیر خردمند به یعقوب میگه زمسرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چاہ کنعانش ندیدی از اونجا بوی پیرانه احساس میکنی اینجا که تو چاہ کنعانش چرا اینجا نمیبینی اینجا چرا احساس نمیکنی یعقوب همین جواب میده که ما در اختیار خودش نیستیم. دیم بگفتا که احوال ما برق جهان است مثل این برقی که گای و برق میزنه گمی ظاهر و دیگر دم نهان است گهی بر تارم اعلان شینم گهی بر پشت پای خود نبینم. لذا این هر طوری که خدا بخواد، بس بجاییم که ما بیایم از انبیاء خدا بخایم حاجت بخایم، از انبیاء مشکلی من راه حل مشکل من را بخایم چرا از خدا نخواهیم؟ لذا ها همین موجزات و کرامات اے کرامات انبیام، اولیام حقیقی ولی ما نه نیست که ولی میتونه مشکلی من حل کنه ولی کلش خودش مشکل داره نبی کلش مشکل داره سوره امبیا را نگاه کنید در سوره امبیا همیشه مشکلات موجب امبیا نوشته یه پهگ انبیا نه در سوره امبیا تمامی قران مجید پر از از دعاهای انبیا نو دعا میکنه ربنی مغلوبم فانتصر خدایا من از دست این قوم مغلوبم نه غالبا تو انتقام منه بگیر از خدا کمک میخواد حضرت ایوب میگه ربنی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین مصیبت بر من آمده ارحم الراحیم تو از دی تو دور کن تو این بیماری رو بردار تی مشکل من را حل کن حضرت ابراهیم دعا میکنه رب حبلی من السالین خدای من فرزند ندارم صالح فرزند سالحی به من بده حضرت زکریه همینطور تو رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین هر پیغمبری برای حاجت و مشکل خودش دعا میکرد پیغمبران همه خودشون حاجت داشتند خودشون نیاز داشتند بس نمی توانند حاجات ما را برطرف بکنند به رسول الله صلی الله علیه و سلام الله در قرآن میگه که ای محمد اعلام کن قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا من محمد حتی برای خودم مالک نفع و ضرر نیستم الا ماشاءالله هر نفی هر ضرری خدا بخواد به من میرسه لذا معلوم میشه که انبیاء موجزه به دستشون ظاہر می شد ولی مالک موجزه نبوده مالک موجزه کلیدار موجزه صاحب اختیار موجزه الله است لذا اللہ می فرماید فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجِهِ زمانی که مجد هند آمد بشیر آمد این بشیر کی بود؟ این یہوزہ بود تفسیر مدارک نوشته، بقیه تفسیر هام نوشته. می گفت که این پیراهن را من باید ببرم. اون وقت اون پیراهن را من به من دادید، من بردم اون پیراهن مصیبت را، اون پیراهن دروغ را. حالا این پیراهن را هم من باید ببرم. قال یهوزا، انا احمل قمیس شفا، کما ذهب تو بقیمیس جفا. که ترک قمیس جفا و ظلم را به دست من دادید، باید قمیس شفا را هم من ببرم. لذا يهوذا آورد، آورد و انداخ بر چهره پدر، پدر سبحان الله در یک لحظه چشماش باز شد. الله می فرت ایفر تد بصیرا بینا برگشت. قال: علم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ای فرزندانم آیا من به شما نگفته بودم؟ من میدانم از الله آنچه که شما نمیدانید. من میدانستم یوسف منبر میگرده. من بالاخره با ربم ارتباط دارم من اشاراتی از ربم دیدم لذا اشارات دیگری هم یعقوب علیہ السلام دیده بود و یکی از اشارات همون خواب بود اما الان فرزندان به دست و پای پدر افتادن قالو یا عبان استغفر لنا ذنوبنا ای پدر ما برای ما این همه گناه کردیم اشتباه کردیم استغفر لنا ذنوبنا برای ما مغفرت بخواه از گناهان ما اینا کننا خاطئین ما خطا کردیم ما اشتباه کردیم ما غلطی کردیم الان شما از خدا بخواه که ما را ببخشیم اما يعقوب الله السلام مثل يوسف فوراً جواب مثبت نمیده چی میگه قال سوف استغفر لكم ربی ان قريب من از ربم برای شما مغفرت میخرم انه هو الغفور الرحيم بدون شک اون رب غفور الرحيم هست چرا یعقوب فورا نگفت مثل یوسف که یغفر الله لکم خدا شما را ببخشه یا ای خدا اینها را ببخش چند دلیل علماء نوشتند بعضی ها نوشتند از قول ابن عباس رضی الله عنهما که یعقوب علیه صلی میخواست در وقت استغفار که وقت سحر است گفت در اون وقت من برای شما مغفرت میخواهم وقت سحر اگر کسی بیدار باشد بهترین وقت استغفار است در احادیث می آید که الله عزوجل می فرماید که رحمت خدا به آسمان اول می آید و صدا می زند حلم مستغفرن اغفر له آیا کسی هست که در این ساعت در این لحظه از من مغفرت بخواهد که من او را ببخشم لذا در وقت سحر همیشه سعی کنی بلند بشید و این روزها توفیق اجباری دارید برای خوردن سحری بلند میشید اون وقت چند رکعت نماز بخونید از الله مغفرت بخواهید بهترین دعا دعای بخشش است با توجه به این حدیث لذا ابن عباس میفرماید که منظور حضرت یعقوب این بود که من در وقت سحر این یک قول بعضی دیگه میگویند که یعقوب میخواست بدونی که واقعا ندامت آمده واقعا پشیمان هستن یا نیستن به این خاطر میخواست جلوتر رفتارشون را ببینه هنوز ته دلشون چیزی هست اگر هنوز در دل چیزی باشد کینه باشد بخلی باشد سوی زنی و سوینیتی نسبت به برادر باشد به یوسف باشد پس مغفرت برای اینها فائده ندارین هنوز توبه نکردن خدا کسی رو می که واقعا از ته دل اصلاح بشه از ته دل بخشش بخواد از ته دل پشیمان شده باشه برای گناهش این یک اصلی هست که اگر در دل ما هنوز گناه باشد و شوق گناه باشد و ما می دوباره که فرصتی گیر آمد انجام بدیم ولی برای اون گذاشتهش مغفرت بخوایم خدا نمی خدا در صورتی می که در دل دیگه هیچ اراده ای نسبت به گناه وجود داشته نباشد لذا به این خاطر بود و بعضی گفتن که نه علت اصلی اینه که بزرگترین ظلم و جفاعی که صورت گرفته بود در حق یوسف انجام گرفته بود اینا با یوسف ظلم کردن یوسف را زدن یوسف را توچا انداختند یوسف را به عنوان برده فروختند حق حق یوسف است اول باید یوسف ببخشد لذا باید برم ببینم یوسف اینا بخشیده یا نه الله عالم این دلایل را نوشتند به این خاطر یاقوب علیه صلی اللہ علیہ فورا نخواست گفت سوفا استغفر لکم ربی ان قریب از ربم بعضی میگن که لیلت الجمعه مراد است از ربم برای شما مخدرت میخواهم انهو هو الغفور الرحیم بدون شک رب العالمین هم بخشاینده و هم مهربان هست نکته دیگر اینجا یاد بکنم هم نکته زیبایی هست اهل تفسیر نوشتند که یعقوب علیه صلات و وقتی که چشمانش باز شد و فرزندان تعریف کردن که پدر این عزیز مصر که این همه ما میگفتیم به ما احسان دارد به ما لطف دارد مهمان نواز دار نوازی میکنه این همه یوسف خودت هست این یوسف بوده ما نمی دونستیم، پادشاه شده عزیز شده تمام ملک مصر در اختیارش هست پدر ضمن که خوشحال شد اولین چیزی که پرسید گفت فرزندانم شما به من بگید که یوسف را بر چه دینی دیدید دی دی دی دی دی دی دی. دینش چی بود چون معمولا وقتی که انسان به طرف دنیا میره و بالخصوص چنان پادشاهی گیرش میاد دیگه دی دین را می دو و کنار می گزارد. فرزندان گفتن بر دین توحید است و بسوی دین توحید دعوت می ده یعقوب گفت پس لطف پروردگار و نعمت پروردگار الان برمن تمام شد تفسیر قرطبی نوشته عن صوفیان صوفیان فوری می گوید لما جا البشیر وقتی که این مجده دهنده آمد الی یعقوب یهوزا آمد بقیه برادران آمدن قال له علی ای دین انترکت یوسف بر چی دینی صفره گذاشتی قال علی الاسلام اسلام توحید تسلیم شدن در مقابل یک رب قال الان تمت نعمه نعمت الان تکمیل شد بر من الان دیگه خداوند واقعا بر من لطف کرد بس ببینه ازیزم برای فرزندان خودیمون دغدغه داشته باشیم اما بزرگترین دغدغه دغده دین باشد همین یعقوب در سوره بقره ما می خانیم وقتی که میخواهد بمیرد آخرین لحظات فرزندان خودش را همه را صدا می الله تعریف میکنه و وصا ابراهیم و بنی و یعقوب یعقوب وصیت کرد ابراهیم هم وصیت کرد یا بنی یا ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون الا وانتم مسلمون ای فرزندان خدا برای شما چنان دین زیبایی انتخاب کرده لذا بدون اسلام بدون توحید از این دنیا نروید بر توحید محکم بمانید تا آخر دین خودتون را محکم داشته باشید حتی یعقوب پرسید ام کنتم شو حدائد حضر یعقوب الموت خدا از بنی اسرائیل می پرسید مگه شما شاهد بودید شما که خودتون رب بنی اسرائیل میدانی اسرائیل اسم یعقوب ہے شما شاهد بودی وقتی یعقوب میخواست بمیره از قال لبنیه ما تعبدون من بعدی از فرزندان پرسید ای فرزندان بعد از من شما چی میخوایید میخوایید چه ذاتی را عبادت کنید اونا همه گفتند قالو نعبدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا اون معبودی که معبود تو هست معبود پدرانت ابراهیم و اسحاق و همه هست اون الهی که اله واحد است، خدا یگانه هست ما اون را میپرستیم و نحن له مسلمون در بست تسلیم او میشیم چی او بگه من عمل میکنیم لذا یعقوب تمام دغدغش دین بود ایمان بود شما یک پدر باید همین طور باشید برای دنیای فرزندانمون دغدغه داریم به فکر زمینی برایشون هستیم منزلی هستیم بالاخره کاری معاشی تحصیلاتی خوب اینها اما بیشتر از این باید به فکر دین باشی فرزند را کسی میفرستد تهران مشهد شهر دیگه دوبه کار میکنه هر روز زنگ میزنه وضعیت کارو بار چطوره بابا درآمد خوبه فایده خوبه آیا این هم پرسیدی هر روز که بابا نمازت را با جماعت میخونی یا نه؟ به مسجد صفی اول هستی یا نه؟ به نمازجوم شرکت داری یا نه؟ از اخلاق، از اعمال، از تقوی، از خدا ترسی آیا این دغدغه را دارید؟ اگر این دغدغه را ما پدران داشتیم و بر اساس همین دغدغه دعا هم کردیم و هم سفارش کردیم اون وقت فرزندانیمون انشاءالله فرزندان صالحی میشند فرزندان با ایمان خدا ترس میشند لذا این دغدغه باید در هر پدر مومینی باشد برای تربیت فرزندان برای دینداری آینده فرزندان باید برنامه ریزی بکند لذا اینها جواب دادم بله یوسف بر دین توحید هست بلخر رفتند رفتند یوسف علیه الصلاۃ والسلام با تمام ارکان سلطنت از پدر استقبال کرد و پدر و فرزند بعد از سالها به هم دیگر رسیدند هم دیگر را در آغوش گرفتند و با هم دیگه محبت کردند بعد از کلی استقبال و کلی تشریفات یوسف علیه الصلاۃ والسلام به پدر و مادرش گفت که جایدات انها را یه محلی یه منطقی و گفت پدر عظیم بعد اینجا انشاءالله با با امنیت زندگی کنی دیگه خطری نیست نه خطر جدائی من و شما آزمه اینکه که مرگ مارا جدا کند و نه خطر گرسنگی هست نه خطری دیگه هست دیگه آزمائش الله تمام شد در دنیا چند روزی که هستیم در دنیا دیگه سختی نخواهیم دید فلم ما دخلو علا یوسف زمانی که داخل شدن بر یوسف آوالیه ابویه جائداد بسوی خودش پدر و مادرش را وقالت خلو مصر انشاء الله آمینین بی آنان گفت ادخلو مصر داخل مصر بشید اگر خدا بخواد این الله برای تبرک است باید هر کار ما به مشیت الله باشد داخل بشید آمنین ایمن داخل بشید یعنی نازم بعد فراق و جدائی هست نازم بعد قهت و خشکسالی هست دیگه چند روزی که مقدر ما هست زندگی ما هست با هم دیگه زندگی می کنیم و از دیدار هم دیگر از محبت هم دیگر بحرمند بشیم و بعد از اون یوسف علیہ السلام, السلام پدر و مادر را برد الله تعالی میخواست اون خواب محقق بشه و رفع ابویه علی العرش پدر و مادر را بر روی تخت نشاند بر روی اون تخت بلند قرار داد برادران همه آمدن نشستند و وقتی که این منظره صورت گرفت شکل گرفت که همه پدر مادر یازده برادر هر دوازده برادر در یک سالون در یک اتاق همه به یوسف ادای احترام کردند به افتادن، سجده افتادند و خر له برای یوسف سجده کردند وقتی که همه به یوسف سجده کردند این سجده سجده تعظیمی در بر این سجده توضیح میدم همه ادای احترام کردند یوسف بیادی ان افتاد وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل ای پدر من این هست تأویل خواب قبلی که من بهت گفت بودم قد جعلها ربي ربی حقا ان خواب رب من خواب حق قرار داد وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن این کلمات یوسف حساب شده هست سبحان الله تک تک این کلمات اخلاق کریمانه یک پیامبر را ساند پیامبری که تمام کسانی که نسبت به او ظلم کردند نسبت به او جفا کردند با اونها کار ندارد حتی نمی خواهد بروخشم بکشد حتی نمی خواهد که ملامتی را متوجه اونها بکند اول و آخر ملامت کیه شیطانه لذا اول میگه رب من به من احسان کرد و قد احسن بی به من احسان کرد اذ اخرجنی من السجن مرا از زندان بیرون کرد رفتن به زندان را نمیگه چرا چون رفتن به زندان به وسیله زلیخا شد به وسیله فوتیفر شد به وسیله عزیز مصر شد اونهایی که نسبت به یوسف احسان کرده بودند اونهایی که یوسف در خانه اونها بزرگ شده بود یوسف نان و نمکشون را خورده بود نخواست که اسمی از اون واقعی تلخ و حادثه تلخ ببرد لذا رفتن زندان را عنوان نکرد بیرون آمدن از زندان را عنوان کرد و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن الله به من احسان کرد زمانی که مرا بیرون کرد از زندان و همچنین احسان کرد و جاء بکم من البدوی شما را از آورد شما را از کنعان آورد این لطف و احسان دیگری پروردگار که شما را در مصر پیش من آورد من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی بعد از این که شیطان جدای افکند بین من و بین برادران من نزغ شیطان یعنی ضربه شیطان شیطان ضربه زد و ما را جدا کرد دور کرد ببین این هم نشعت گرفته از اخلاق کریمانه پیامبرانه، پیامبرانه یوسف نمیگه بعد از اینکه برادران مرا انداختن تو چا نمیگه بعد از اینکه برادران به من ظلم کردن برادران را نمیخواد خجل بکند نمیخواد شرمنده بکند وقتی که بخشیدید ببخشید خوب ببخشید دوباره یاد نکنید بعضی از ما هستیم که می بخشیم ولی بعدا همیشه ذکر میکنیم که من به تو این احسان را کردم من به تو این چیز را بخشیدم این مننت و این ذکر کردن بخششی نیست الله تعالی می که صدقات خودتون را با مننت و اذیت کردن باطل نکنید شما دارید طرف را طرف را داری اذیت میکنید تو چیزی نداشتی من تو را زن دادم تو چیزی نداشتی من بهت ماشین دادم برادر بزرگ برادر کوچک را میگه این دیگه اخلاق پیغمبر نیست این اذیت کردن هست این منت گذاشتن هست یا کسی به شما ظلم کرد به شما ستم کرد به شما ضرر مالی زد به شما ضرر جانی زد قرار است که از او دیه بگیری قرار است که او را اعدام بکنی قرار است که از او قصاص بگیری ولی بعدن میبخشی بخشید دی دیگه دوباره یاد نکن بر اخلاق پیغمبران باش هر روز نگو که من تو را بخشیدم اگر نمیبخشیدم این وقت تو قبر مرده بودی نه دیگه اصلا یاد نکن برو نکش شرمندش نکن خجلش نکن الله می میفرماید یوسف اصلا بروخ نیاورد گفت یعنی طوری میگه که برادران من مغصر نیستن مغصر شیطانه من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی که شیطان بین من و بین برادرانم جدای انداخت ان ربی لطیف لما يَشَا همان رب من لطیف است خیلی لطف دارد به اونچی که خدا بخواهد انه هو العليم الحكيم بدون شک رب من دانا هست هر چیز را می داند و کار الله با حکمت است لذا هر چی شده به حکمت خدا بوده و کار حکیم خالی از حکمت نیست قطعا حکمت همه ما در حمین بوده که بعد از این همه سال به این نتیجه برسیم چند از از کنم برداشت ها هستن که بنده قبلا هم یاد، یاداوری کرده بودم الان هم مجدد یاداوری میکنم برای ما درس هستند یکی اینکه خوابی اگر انسان میبیند لازم نیسته که تعبیر خواب همین همی الان بشه همین فردا بشه همین، تو همین ماه بشه بستگی داره الله عزوجل اون خواب را که محقق میکند امروز فردا بعد از ده سال بعد از بیش سال این بالاخره یک چیزی هست که از سوره یوسف هم برای شما ثابت شد رسول الله صلی الله علیه و در سال ششم هجری خواب دیدند که دارند خانه خدا را تواف میکنه و عمره میکنه خوشحال بود رسول الله چینی خواب دیدم صحابه هم خوشحال شدند حرکت کردند خواب انبیاء وحی است حرکت کردند رفتن به طرف مکه در حدیبیه نگذشتند در حدیبیه نگذاشتن خلاصه جریان رشمخان دی در سوره فت چند روز طول کشید تا اینکه بر ارضت بستن سال آینده بیاید مشرکین دیگه لج کردن به اصطلاح زد کردن امسال نه سال آینده هر چی ما بگیم گفتم باش هر چی شما بگید الان بعضی مزمون منافقین اعتراض کردن مگر خاب ببیند و خواب محقق نشین چه پیامبری هست. الله آینه نازل فرمود: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلون المسجد الحرام. ان شاء الله آمنین، محلقین روسكم و مقصرین. يعني یعنی خاب پیامبرش را خدا خاب به حق و خاب راستی قرار داد. حتما حتما شما داخل مسجد حرام میشید. خدا به ایمن داخل میشه سرتون را میتراشید سرتون را حلق میکنید موهایتون را کوتاه میکنید ولخره الله میفرما این خواب محقق میشه ولی کجا گفته شده همین امسال هر وقتی خدا بخاط پس لازم نیست که خواب ما فوراً همین امروز سی بشه محقق بشه دوم اینکه هر وقتی که مشکل میاد برای حل مشکل دعا بکنید تلاش هم بکنید، دعا هم بکنید اگر زود مشکل شما برطرف نشد شما نگران نباشید شما ادامه بدید خدا حتما میخواد که شما با رب بتون همین ارتباط زاری و تظر رو گریه و آجزی همین که شما آجزی میکنی، گریه میکنی خودت را کوچک میشماری، همین توازویت را رب دوست دارد حکمت در همین هست که تو تا ده سال همین طور پیش خدا هر شب گریه بکنی لذا خسته نشو یک سال مریزی را دیدم خیلی زود خسته شده بود الله مغفرتش بکنه الان وفات کرد. به من گفت مولوی خدا چرا منو خوب نکرد من تمام رمضان یک شبم نخوابیدم. شب تا صبح عبادت کردم و دعا کردم ما این طور عجول هستیم ما میخواییم یک ماه رمضان کاملش دعا کردیم بعد از رمضان معجزه بیاد اللہ کا حکمت کارهای خودش را بہتر میدوند لذا دیر میشه نصرت اللہ یا زود میشه یا خداوند تو این دنیا فیصله کرده که این خواسته شما را برطرف نکنه در عوض این دعاها این قدر در آخرت بهت بده بعضی روایت هاست که در آخرت به یک انسان این قدر خدا میده این قدر میده تعجب میکن من این عمل نکردم اینا چیه میگه اینا عوضی همون دعاهایی هست که دعا, دعا کردی اونجا مصلحت نبود عوضشون را اینجا خدا به تو نعمتهای دیگه داد اونجا انسان آرزو میکنه کاش ایش دعایم تو دنیا قبول نمی شد لذا هر چی رب برای تصمیم گرفت تو ادامه بده خسته شو من یتقی و یسبر دو چیز بودن نه هم خدا ترس باش و هم صبور باش استقامت کن تا آخرین لحظات زندگی استقامت کن بعد از اون حواله الله هستی لذا بعد از این همه سال این پدر و فرزند به هم دیگه یک مطلبی که لازم هست در رابطه با اون هم صحبت کنم دو مطلب هستند این مطالب خیلی مهم هستند از کنم که چون آخر سوره یوسف هست یکی در رابطه با همین سجده اینجا آمده که یوسف را سجده کردند و در از به خدمت شما سوره بکره و سوره های دا دیگه داریم که فرشتگان آدم را سجده کردن از این بعضی استفاده میکنن سو استفاده می میگن سجده درسته اولا این سجده سجده عبادت نیست سجده عبادت در هیچ دینی برای غیر خدا جایز نبوده اصلا تمام انبیاء را خدا فرستاده برای همین مدعه که ای مردم مرا عبادت کنید غیر مرا عبادت نکنید اعبد الله ما لكم من اله غيره عبادت فقط مال خدا خدا را عبادت کنی غیر از خدا هیچ ذاتی که لایق عبادت باشد وجود ندارد پس سجده عبادت در هیچ دینی در هیچ آینی از دین آدم گرفته تا دین محمد صلی الله علیه و اسلام برای غیر خدا نبوده اما ادای احترام به شکل سجده که این را میگن سجده تعظیمی سجده تعظیم یعنی طرف را خدا نمیدونی معبود نمیدونی ولی بهش احترام قائلی براش بالاخره رکو می کنی یا سجده می کنی، این در ادیان گذشته بوده در دین ما نیست دلایل زیادی ما داریم که در دین ما نیست چیزی که در ادیان گذشته بوده نباید برای ما دلیل باشد به قول بعضی در ادیان گذاشته چیزهای دیگه هم بوده برادر و خواهر با هم دیگه ازدواج نمی کردند در دین حضرت آدم در دین خود حضرت یعقوب یک مرد و دو خواهر را همزمان اغد می کرد دو زن داشت هر دو با هم خواهر بودند دو زن خود حضرت یعقوب در اون دین شکاری نبود لذا هر چی که در دین های گذاشته از ما نباید این ها را انجام بدیم اینا در ادیان گذشته بوده و دلیلش که ما میگیم در دین ما خیلی زیاد هستند آیات هستند احادیث هستند یکی از اون احادیث اینه که صحابی احمد گفتی رسول الله اجازه بدید من رفتم پیش کشورهای دیگر رفتم پیش پادشاهان دیدم پادشاهان روم و ایران مردمشون پادشاهان خودشون را ادا احترام می‌کنند، میان سجده میکنند ما می‌خواهیم شما را سجده بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ناراحت شد و فرمود که لو کنت آمیراً احداً ان یسجد لِاحدٍ اگر من دستور میدادم کسی را که برای کسی سجده کند لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن من به زنها دستور میدادم هر روز شوهرانشون را سجده بکنن چون شوهر خیلی حق دارد لما جعل الله لهم عليهن من حق این در مشکات است که خدای تعالی برای انها چنین حقی گذاشته اللہ اللہ و بعد رسول الله صلی الله عليه و وسلم فرمودن ببینید سجده در گذشته بودی اداء احترام برای زنده‌ها نه برای قبر‌ها در همون شریعت سجده برای قبر نبوده رسول الله صلی الله علیه و وسلم میفرماید لعن الله اليهود والنصارى خداوند یهود و نصارا را لعنت و نفرین کند که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد قبرهای را سجدگاه قرار دادند اگر کسی بگه در گذشته سجد درست بوده اون سجد یعنی ادای احترام بوده برای زنده نبرای قبر در برای قبر در همون عدیان هم جایز نبوده در هیچ دینی برای قبر سجد کردن جایز نبوده برای نمادی از نمادهای غیر الله جایز نبوده پس سجد برای غیر خدا شرکی و یکی از مسادیق بارز عبادت برای غیر خداست نباید هیچ کسی از اینو احادیث از اینو آیات که مربوط به شرائع من قبلنا هستند، شریعت های گزشته هستن ما خودمون یک دینه یک آینه کامل داریم غانونچی داریم قرآن همه چیز را مشخص کرده وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تمام اماکن سجده برای الله چند تفسیر کردن یا تمام انواع سجده برای خدا هیچ کسی را غیر از خدا شما سجده نکنید و غیر از خدا صدا نزنید پس در رابطه با تحریم سجده برای غیر الله آمده به هیچ وجه جائز نیست سجده کنها کردن سجده از کنم عبادت نبود سجده تعظیم در دین ما هم همون سجده تعظیم منسوخ شده حرام است جایز نیست این یک مسئله و یک مسئله دیگر در رابطه با نکاح یوسف و زلیخا که خیلی این مسئله را میپرسند از ما که آیا بین یوسف و زلیخا نکاحی صورت گرفت یا نه در تفسیرها چیزهای مختلفی شما میبینید البته این را خدمت شما عرض بکنم که کسی اگر بخواد یک تفسیری را نگاه بکند از مطالعه تفسیر انسان ماهر قرآن نمیشه به خاطر اینکه تفسیرها اهل تفسیر از بقیه نقل میکنند چیزهای تر و خشک صحیح و غیر صحیح نقل میکنند تو تفسیرها اگر شما بریم مطالعه بکنید، حتی این تفسیرهای فارسی در بعضی تفسیرها نوشته که بله، زیوسف و زلیخا با هم نکاح کردن، بعضی تفسیرها نوشته نه، نکاح نکردن، معلوم میشه که اهل تفسیر با هم در این رابطه اختلاف نظر دارند، ولی بنده این را به صورت قط میخوام ارز کنم با قاطعیت ارز میکنم عقیده ما این هست باور ما این هست که چنین نکاحی که شایع هست و در اخبار اسرائیلیات آمده چنین نکاحی صورت نگرفت این خلاف است، این درست نیست که بعضی میگویند که زلیخا را خدای عزواجل جوان کرد چون زلیخا خیلی پیر بود یوسف بچهی بود زلیخا زن بزرگی بود تفخانه عزیزی مصر لذا بعضی میگن زلیخا را خدای تعالی جوان کرد دوباره همون حسنش برگشت آخی زلیخا چه کمالی داشت که این کرامت به زلیخا داده بشه لذا زلیخا را بعضی میگن که جوان کرد و یوسف علیہ السلام با او ازدواج کرد ما میگیم که این روایت از اسرائیلیات گرفته شده و این روایت قابل قبول به چند دلیل دلائل را توجه بکنید اولا بعضی از تفسیرها که دوچار سوء فهم شدند به چه دلیل هست؟ این روایت اینم اسطورات است این روایت هم برای ما لا نصدق ولا نکذب ولی بسیاری از اهل تفسیر اهل تحقیق این روایت کردند میگویند که یوسف علیه السلام چون در تورات نوشته با زن کاهن شهر اون یک شهری بود به نام اون کاهن داشت به نام فوتی فرع فوتی فرع یعنی آخر فرعن و عزیز مصر اسمش بود فوتیفار کسانی که دچار اشتباه شدند از این تشابه اسمی با دختر فوتیفار به نام آسنات یوسف ازدواج کرد دو تا فرزند خدا بهشت داد یکی اسمش مناسب بودی که افرایم بود لذا فوتی فرع را بعضی گفتن فوتی فر و اون دختر فوتی فرع بود این زلیخا زن فوتی فرع بود لذا اون چیزی که در اون روایت آمده غیر از این چیزی که هست که مردم شائع کردند لذا این نکاح و این ازدواج با هیچ روایت صحیحی ثابت نشده یک چرا ما مخالفین که بگیم که این نکاح صورت نگرفته به این دلیل که خدای عز و جل برای پیغمبرانش زنهای پاک دامن انتخاب می کند و انتخاب می کرده در گذشته اللہ تعالی برای انبیاش امکان داره زن پیغمبر کافر باشه امکان داره مشرک باشه چنانچه زن لوط و نوح در قرآن میاد هر دو تا کافر و مشرک بودند اما زن پیغمبر نمیتونه که بدکار باشه من از کنم بی و ناپاک باشه پاک دامنی داشته نباشه چون چند بار خدمت شما عرض کردم ذکر کردم در سوره نور این مسئله را انشاءالله با توضیح بیشتری میخوانیم که اگر زن پیغمبر کافر باشه این کفر یک ای بیست به خودش برمیگرده زن پیغمبر اگر مشرک باشه شرک به خودش برمی گرده چنانچه خیلی از پیغمبران هستن پدرشون مشرک بودن فرزندشون مشرک بودن زنانشون مشرک بودن این عیب و این آر متوجه پیغمبر نمی شه اما بالله اگر زن پیغمبر اون کاره باشه زانیه باشه این عیبش نه تنها به پیغمبر به تمام مردهای که با اون زن نسبت دارن به اونها برمیگرده زنی که بدکار باشد اون پدرش در واقع سرش پایینه برادرش سرش پایینه فرزندش و شوهرش یعنی این عیب در واقع به تمام مردهایی که نزدیک این زن هستن برمیگرده به این خاطر ما معتقدیم که خداوند عزوجل پیغمبران را چینی زنهای برایشون انتخاب نمی کنه ما یک همیشه بنده مثال ذکر می کنم تو مسجد دوست هم ندارم این کلمات را ذکر کنم یک دشنامی هست هم در عربی هم در فارسی میگن ده یوس به چی کسی میگویند به کسی که زنش این کارو باشد ببینید زنه اون کارو میکنه ولی چرا شوهر را میگند چون ای مال شوهر است اشکال به شوهر بر میگرده بنابراین زن پیغمبر بیاد اینطور طور بشه حضرت عبدالله بن عباس میگه ما زنت امرأت نبیین قد تو زن هیچ پیغمبری هرگز زنا نکرده و اراده زنا هم نداشته چطور یک زنی که تمام زندگیش دنبال یوسف بود و می خاص یوسف چنین عملی باش بکنه اون زن را خدای تعالی برای یوسف انتخاب میکنه این محال است این ممکن نیست حتی یک صحابی این پیغمبر به جای خود یک صحابی که به نام حضرت مرسد غنوی رضی الله تعالی نو در زمان رسول الله این صحابی خیلی چالاک بود خیلی زرنگ بود وقتی که رسول الله به مدینه هجرت کردن کار این صحابی چی بود می رفت بصورت می میرفت مکه اون مسلمانان ضعیفی که می‌خواستند اونها از مکه فرار بکنه اونجا اسیر بودن می‌خواستن نجات بیابن این صحابی همیشه میرفت اون را قاچاقی رد می‌کرد می‌آورد می‌آورد به مدینه این صحابی در همین رفت و آمدش بالاخره با یه زنی چشمش افتاد زنی مال اهل مکه بود به نام عناق این زن زن, زن زانیه و زن خوبی نبود اما اینها به هم دیگه دل دادن میخواست باش ازدواج بکنه عاشقش شد خدمت رسول الله صلی الله عليه و سلم مشوره کرد یا رسول الله این زن خیلی من گرفتارش شدم اجازه میدی باش ازدواج کنم محمد مصالحی میخواست ازدواج کنه بعد از اون نظره دیگه کنترلش بکنه رسول الله اجازه نداد گفت نه قرآن میگه از زانی لا ينكحو الا زانیه او مشرکت و زانیت لا ينكحها الا زانن او مشرک يعنی زن زانیه رب مرد زانیه اون رت اون سزاوار تو نیست اون لایق تو نیست مرصد نکنین کاره صحابی رسول الله من کرد غنوی هم نکرد لذا برای یک رسول الله نمی پسنده که زنی که دنبال چینی کارها بوده یا باشد درایند که نخواهد بود لذا الله تعالی در قرآن در سوره نور شما می خوانید الله که می فرماید الخبیثات للخبثین والخبثون للخبيثات پاک برای منافق پاک, پاک برای پاک الطیبات لل والطيبون و الطیبون لل این قوانین اینا چند تا قانون هستند که قرآن داره برای ما مشخص میکنه اینا چند تا ضابطه هستند لذا ما معتقدیم چنین نکاحی صورت نگرفته لذا نکاهی یوسف و زلویخه هم منتفی هست باورش نکنید الله می فرماید که بعد از اینکه این جریان تمام شد پدر و فرزند به هم دیگه رسیدند مدت ها با هم دیگه زندگی کردند بعد از اون یوسف علیه صلی اللہ مرگش فرا رسید موتش فرا رسید در باره یعقوب ما در سور بقره خاندیم یعقوب علیه صلی وقتی که موتش آمد تمام فرزندان خودش را جمع کرد وصیت کرد به توحید وصیت کرد به خداپرستی به اطاعت و بندگی و یعقوب علیه السلام هم وصیت کرد که ما را در شام دفن کنید یعقوب علیه السلام فوت کرد یوسف با بقیه برادران جنازه پدر را برداشتند برد شام در همون کنعان اونجا یعقوب را دفن کردند و برگشتند برگشتند یوسف علیه و سلام چندین سال حاکم بود حتی میگویم بعدا بعضی اهل تفسیر نشدند که از اون جایگاه عزیز مصر ارتقا کرد پادشاه مصر شد ملک شد و تا اینکه آخرین روزهای یوسف علیه و سلام هم فرار رسید الله عزوجل دعای یوسف را که این دعای یوسف در وقت دعای حسن خاتمه هست برای من شما نقل کرده ان دعا رب خانی انشاءاللہ ار وقتی موت ما مقدر بشه حسن خاتمه میشه خاتمه خوب میشه رضا یوسف علیہ سلام در آخرین لحظات زندگی با ربش مناجات کرد رب قد آتیتنی من الملک بار الہا تو بمن ملک دادی پادشاهی دادی نعمت ظاهری دادی علاوه از نعمت ظاهری و علمتنی من تأویل الاحادیث بمن یاد دادی مرا از تأویل احادیث یاد دادی یعنی تعبیر خواب یا انکه عاقوة امور یا علم نبوت چند تفسیر قبلا کردم بار اله همه نعمت های ظاهری را و باطنی را بمن دادی لذا پروردگار یک چیزی دیگه میخام فاطر السماوات از این جامیشه بخانید فاطر السماوات والارد اے خالق آسمانها و زمین اے آفرینند اے آسمانها و زمین انت ولیی فی الدنيا والآخرا تو هستی حامی من تو هستی ولی من کارساز من مشکل گشای من در دنیا و آخرت به معنی چیئے حامی کارساز مالک من دون الله من ولی و لا نصير بغير خدا هیچ ولی ندارید و نسیری هم نداری یعنی ن نصرت کننده داری نه حامی و کمک کننده داری مشکل کشا نداری انت ولیی فی الدنیا والآخرة تو حامی من تو پشتیبان من و کار ساز من در دنیا و آخرت این همه لطف را من کردی حال یک مطالبه دیگه دارم این اصل دعا توفنی مسلمم و الحقنی بالصالحین مرع موسلمان بميران مرا موت بده در حالي كمم مسلمان بميران والحقني بالصالحين با باصالحين ملحق بگردان با انها محشور بگردان يعني معيتي انها را رفاقت انها را حمراهي انها را در خيل و كاروان انها مراء قرار بده لذا ان دعا يوسف بود ويوسف عليه الصلاة والسلام بعد زون وفات کرد قبلا من برای شما تعریف کردم که مرشد بزرگوار ما استاد بزرگوار ما حضرت علامه جعفری رحمت الله علیه همیشه ما را توصیه میکرد می گفت که این دعا را یک وقت خاصی نخانید همیشه بخانید همیشه تو دعاهاتون این دعا را هم بخانید خاتمه ایش به شما با ایمان میشه و خود استاد رحمت الله علیه اونطوری که خانواده نقل میکنند وقتی که آخرین لحظاتش آخرین لحظات زندگی بود قلب بعد از نماز مغرب ایشون را گرفت ایشون را بردن به خانه همونجا روی تخت خودش میگه به سجده افتاد سه بار همین آیه را خاند و بعد از اون روحش پرواز کرد لذا هر یکی هر بنده صادقی بنده مخلصی بنده خوب خدا با اراده با نیت یه چیزی از خدا بخواهد با صدق دل الله میده چه سعادتی بزرگتر و چه خوشبختی بزرگتر از این که در آخرین لحظات ما کلمه گویان با کلمه توحید از دنیا بریم و با این آیه که از خدا بخواییم خدایا با اسلام و با ایمان و با توحید من بمیرم و همچنین در خیلی سالحان قرار بگیرم در صف سالحان قرار بگیرم لذا این سعادت بزرگی هست انشاءاللہ اجابت میشه تو اسیه می کنم همیشه این دعا را انشاءاللہ بعد از اینکه داستان یوسف تمام شد حالا الله عزوجل روی سخن را به پیغمبر خودش به محمد صلی الله عليه و وسلم و هم گویا گویا سمت مشرکین مکه چون مشرکین مکه از پیغمبر خواستند که جریان چی بود که بنی اسرائیل از شام آمدند به مصر جیشون شام بود اما موسا اونها را سعی میکرد از مصر نجات بده جریان را الله تعالی تعریف کرد اول اینطور یوسف را به عنوان برده آوردند الله تعالی عزیز مصرش قرار داد همه پیروانش را آورد اما ادامهش را من به صورت خلاصه به شما بگم که بعد از این برادران یوسف حکومت را به دست گرفتند و بعد از برادران یوسف فرزندان اونها بیشتر میگویند که کسانی که در رأس حکومت بودند، فرزندان روبیل بودند. و بعضی میگه یهوزا، میگه بعضی میگن نه. فرزندان یهوزا پیغمبر بودند، بیشتر فرزندان روبیل بیشتر پادشاه بودند. اینها خوب عمل نکردند. تا مدتی بالاخره مردم مصر تمام دشمن اینها شدند، قبیله‌ها دشمن اینها شدند و آخر. فرعون آمد و فرآن بدترین شکن جهارا داد تا اینکه خداوند موسی را انتخاب کرد موسا علیه و السلام چار سال بعد از یوسف علیه سلام آمد در مصر و به عنوان پیغمبر تعیین شد و وقتی که نصبی موسا علیه سلام را نگاه میکنیم موسا علیه سلام در چارمین پشت به فرزند یعقوب به یکی از فرزندان یعقوب می رسد لذا موسی بعد از چهار قرن بعد از چهار پشت آمد در این زمان دیگه بنی اسرائیل چون به اوج فساد رسیده بودند خدای تعالی فرعونهای مصر بر اونها مسلط کرده بود و بدترین شکنجا لذا موسی اول و آخر تلاشش این بود که بنی اسرائیل را از اینجا آزاد کنه برگردند یوسف از اونجا آورده بود موسی می دوباره ببره اونجا آخر همین کار را کردی موفق شد فرعان غرق شد بلاخره مری اسرائیل را نجات داد پس الله تعالی به پیغمبرش میگه ای نبی من ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو که درس نخاندی تو که تاریخ هم نخاندی و وقتی که برادران یوسف با هم دیگه مشوره کردند یکی میگف بکشیم یکی میگف تو چاہ بیندازیم تو اونجا نبودی الان که داری تعریف می کنی داستان را بیان می‌کنی از کجا معلوم میشه تو پیغمبر خدا هستی معلوم میشه که با وحی سرکار داری معلوم میشه که الله عز وجل برایت تعریف میکنه بس این داستان یکی از دلائل نبوته رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و می کسانی که سوال کردند آنها بیاندو ایمان بیاورند الله می فرماید ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک این از اخبار غیب هست که ما وحی کنیم به تو دلیلین که بر تو وحی می آید وما کنت لدیهم اذ اجمعو امرهم ای محمد نبودی تو پیش آنها پیش برادران یوسف اذ اجمعو امرهم وقتی که درباره امرشون با هم دیگه مشوره می با هم دیگه توافق کردند و یم کرون در حالی که انها توتع کردن اون زمانی که توتع کردن که یوسف را در چابی اندازد تو که نبودی ولی چطور از مشورهای دقیق اونها داری تعریف کنی؟ خدا برات میگه و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین اینجا ببینید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم تمام جریان را تعریف کرد تمام داستان را بیان فرمود انتظار میرفت که همه ایمان بیاورند چون جواب را درست گفت هم مشرکین ایمان بیاورند هم ها ایمان بیاورند اما رسول الله هر چه انتظار میکشید، خبری نبود قومی که در تعصب گرفتار بشه از کجا جوابش را بگیرد هم ایمان نمیآورند. خداوند تسلی میده ای پیامبری من تو ناراحت نباش و ما اکثر الناس اکثر مردم نیستند ولو حرست اگر شما حریص باشید به مؤمنین اکثرشون ایمان نمیآورند. خب چرا ایمان نمی آورند مگر شما از پول میخواهی در مقابل این آیاتی که بیان میکنی حقوق می و ما تسألهم عليه من اجر شما از اونها نمی کنی هیچ نو مزدی هیچ نو حزینی چرا ایمان نمی آورند ان هو الا ذکر للعالمین نیست این مگر پندی برای جهانیان یعنی همه دنیا اگر بخواهند از این قرآن پند میگیرند این پندی هست اندرزی هست واقعا آیات قرآن مجید پند و اندرز هستن حال توجه بفرمید در ادامه خداوند چی میفرماید؟ ببین این یک آیه بود یک نشانی بود داستانی از رسول الله تعریف خواستند رسول الله کاملا تعریف کرد خب این یکی از دلائل و یکی از آیات بود که پیغمبری خداست با وحی سروکار داره الله می این آیه بجای خود آیات خیلی بزرگ بزرگ کلان کلان شب و روز می بینن باز میمان نمی آورند همین آسمان آیه کمی هست آیه بزرگی بر توحید خدا است همین زمین نشانه کوچیکی هست خورشید ماه، شب، روز، دریا، دشت، صحرا، همه ها آیات هستن به هر یکی فکر می کنی سبحان الله چه خدای قادری هست الله می فرمائے از این آیات زیاد می بینن بندگان من اما کور کوران از کنار آیات رد می شوند وکا من آیت في السماوات والارض چقدر از آیات و نشانات نشاناتی که دال لبر توحید هستند در آسمان ها و زمین ی مرون علیها بر اون آیات مرور میکنند هر روز از کنار اون آیات می گزرند و هم عنها معرضون و اینها از اون آیات اعراض کنند هستند مگر نمی خدا را خدا آسمان را خلق کرده چرا قبولم دارن به خدا ایمان دارن اما ایمانی که به درد بخورن ندارن ایمانی که غاطی با شرک ببین ممکرین خدا خیلی کم بودند ایمانی که مخلوط با شرک توأم با شرک و ما يؤمنون اثرهم بالله اکثر اینها ایمان ندارم به خدا الا وهم مشرکون مگر اینکه آنها مشرک هستند ببین من این مسئله را در مقدمه با تأکید و با دلایل خدمت عزیزانم عرض کردم که مشرکین به خدا ایمان داشتند به خدا ایمان داشتند خدا را خالق می‌دانستند تو قرآن آمده خدا را مالک می‌دانستند خدا را رازق می‌دانستند خدا را پادشاه بزرگ میدانستند اشکال کار پس کجا بود میگفتن غیر خدا بقیه کچلوها هم چیزکی دارند اختیاراتی دارند در حد پایین مثلا میتونه مریض منو شفا بده مثلا میتونه تو بیابان دست منو بگیره تو کارهای بزرگ تو دریا اونجا ها نه تو این کارهای کوچک کوچک پس اکثر مردم به خدا ایمان دارن اما ایمان تو ام با شرک این ایمان به درد این ایمان ایمان منجی نیست انسان را نجات نمیده ده بیاییم ایمانهای من را بررسی بکنیم با قرآن بیاییم بعد آیات قرآن مقایسه بکنیم ببینیم آیا همون ایمانی که خدا میخواد ما داریم اون ایمانی که خدا میخواد چیه؟ اینه که الله عز و جل را در ذات و صفاتی گانه بدانیم خداوان همون طور که در ذات یکی از هیچ مشرکی نگفته دوتا خدا هستند مگر فقط آتش پرستان گفتند دوتا خدا هستند یک خدای خیر، یکی شر، یکی یزدان، یکی اهرمن بقیه همه میگفتند خدا یکی بقیه همه مغربان خدا هستند خاصدان خدا هستند لذا خدا را در ذات هم گانه بدانیم در صفات کدوم صفات صفاتی که قرآن گفته عالم الغیب فقط خداست نافع خداست دار خداست مشکل کشا حاجت روا غیبدان دهنده اون چیزایی که قرآن گفته که فقط مال خداستند تو اونها با خدا کسی را شریک نسازیم غیر از خدا خدا فرموده هیچ کسی را صدا نزنید از هیچ کسی کمک مگر نمیخانیم نمی خانیم ایا و ایاک نستعین خدای فقط و فقط تور عبادت میکنیم. فقط و فقط از تو کمک می چرا یا فلان ادرکنی یا فلان انصرنی یا فلان خوز بیدی چرا از غیر خدا کمک می خواهیم لذا وقتی که می ان ایاک نستعین از غیر خدا کمک نخواهیم الله می فرماید و ما یومنو اکثرهم بالله اکثر مردم به خدا ایمان ندارند الا وهم و هم مشرکون مگر شرک میکنند و خدا می فرماید ای بندگان شما که با من شریک می سازید آیا نمی ترسید که عذابی براتون بیاد افامنوا آیا ایمن هستند بیغم هستند ان هم غاشیه من عذاب الله انکه آفت بیاد غاشیه اون آفتی که تحت پوشش قرار بده اون آفتی که اونहारा اسبیم بین ببرد آیا ایمن هست از این که آفتی بی از عذاب خدا او تعتیهم ساعت و بغتتن یقیامت بیاید ناگهان و هم لا یشعرون حسلا درک داشتن باشن که چطور قیامت یک ہو آمد نفهمند که چطور آمد بعد از این الله تعالی به پیغمبرش میگه در پایان سوره یوسف که ای نبی من ای پیغمبر من شما موزه را شفاف اعلام کن خط ترا بگو خط من اینه خط من و پیروان من قل هادهی سبیلی ادعو الله بگو این هست رای من این هست رای من کدوم ادعو الله من بسوی خدا می خانم بسوی یک خدا به همین خاطر مفسرین میوشتن ادعو الاله یعنی ادعو ال توحید الله خود خدا را که قبول داشتن مشرکین اما توحید خدا را قبول نداشتن ادعو الاله من فرامی خانم بیسوی یگانگی خدا اما بدون دلیل نا على بصیرت من بر بصیرت هستم بصیرت یعنی چه؟ یعنی على بیان و حجت واضحة من کی میگم فقط یک خدا من دلیل دارم مدرک دارم بعضی دیگه گفتا على بصیرت یعنی على دلائل توحید من دلیل دارم دلائل توحید فراوان هستند لذا راه من همین راه توحید است. انا و من اتبعنی هم من وام تمام پیروان من کسانی که بر مسیر من محمد صلی الله علیه و وسلم هستند و خلاصه اینه که من میگویم و اقول میگویم سبحان الله سبحان الله یعنی چه یعنی خدا از شریک پاکه خدا از همسر و همتا پاکه خدا از نائب پاکه از جانشین پاکه از دستیار پاکه از فرزند و دختر پاکه از هر عیبی که مردم نسبت میدهند، از همه اینها پاکه و سبحان الله و ما انا من المشرکین الله است و من هم از مشرکین نیستم با خدا هیچ کسی را شریک نمی سازم و ای پیغمبر همین دعوت را بگیر استقامت کن تا آخر صبر کن بلکه نصرت خدا میاد دیر میاید ولی میاید قبل از تو هم پیامبرانی بودند، اونها هم بسوی اونها هم همین واحد شد، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا ما نفرستادیم قبل از تو، مگر مردانی را فرستادی مردان معلومی که زن به اونها پیامبر نیامده نوحی ایلم من اهل القرا از اهل همین شهرها روستاها بودند ما بسوی اونها وحی می کردیم اونها هم همین پیام را همین مطلب را به اقوام خودشون رساندند اما کسانی که از اونها حرف شنوی نداشتند بریم ببینید شهرهایشون را دیارشون را به چه عذابی گرفتار شده آثار عذاب هنوز هست افرام یسیرو فی الارض آیا اینها در زمین سیر نمی کنند فینظروا ببینند کیف کان عاقبت الذين من قبلیم عاقبت کسانی که قبل از اینها بودند و دعوت انبیاء را لبیک نگفتند چی شد لذا شما برید ببینید برای خودتون درس عبرت بگیرید ما وقتی که بریم معلوم میشه که به این نیت اگر انسان سیر بکند بره بگرده هم مستحسن است بزرگترین وعظ هست برای انسان و از این یک نکتی که ما می اینه که واقعاً دنیا وفا ندارت اللہ می فرماید و ال آخرت خیر دار آخرت خیر چون وقتی میری میبینی سبحان اللہ چه کاخایی چه قصرحایی چه باغهایی، چه امکاناتی چه جاهای خوب و دینجی به اسطلاح مردم امروزون زندگی می کردند و امروز کجا هستند؟ هر یازون هانی است. اونایی که دعوت حقرا لبک نگفتند امروز شکنجه دار میشند. امروز آه و فقان داد و فریادشون هست. مگر ببینیم دارس میگیریم. الله میفرماید وما أرسنا أفلم ييسير في الأرض آيا انها سير نكنند ال زمینين فيننظروه ببین كيف كان عاقبة الذي قبلهم عاقبت و انجام کسانی کے قبل از انابوا چی شد والدار آخرتی خیر للذین التقوم به این نتیج می رسیم کے البت دار آخرات سرای آخرات بهتر برای متقیان برای اونایی که تقوار پیشگیرند برای اونهایی که از شرک و کفر و گناهان دوری کنند افلا تعقلون آیا شما عقل ندارید خرد ندارید ای مشرکان عقل ندارید که شما از این واقعات درس بگیرید از شرکتون دست بکشید بیایید بسوی توحید خب ما خاندیم که قبل از تو ای محمد صلی الله علیه و اسلام ما همیش پیامبران میفرستادیم آخر چی شد اللہ می فرماید اونجا هم تاخیر شد عذاب زود نہیں آمد ملت ها امت زود بیاد ولی عذاب زود نہیں آمد حتی اذا استعی اثر رسول حتی وقتی که رسول نا شدند رسول چی شدند نا امید شدند وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا این ظنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا چندین تفسیر داره یکی اینکه اون مخاطبان رسول فکر کردند که انهم قد کذبو اونها تک دروغ گفته شده از طرف رسول یعنی اونا میگفتن عذاب بیاد امروز فردا امروز فردا دیدن عذاب نمیاد آخر اونا فکر کردن په که میگم ما پیان اینا به ما دروغ گفتن اونا یقین کردند اینجا زنبی من ای, ای قنو یقین کردند این همه سال گذشت عذاب نیامد حتما این اینایی ای که میگن ما پیغمبریم به ما دروغ گفتن و بعضی میگن که رسول فکر کردند که انہم قد کذبو یعنی تکذیب شدند دیگه چون عذاب نیامد مردم اونا رو تکذیب میکنند. خلاصه آخرین لحظات جاهم اهم نصرنا نصرت ما آمد یاری ما آمد پس نصرت خدا دیر میاد ولی میاد چونکہ بنا نیست در این دنیا فقط برای مشرکان عذاب باشه وقتی که نصرت آمد اللہ می فرمید فنجی من نشا نجات شد اونی که ما می خواستیم ولا یرد بحثنا عن القوم المجرمین و عذاب ما گرفت ما برگردانده نمیشه از قوم مجرم از قوم مشرک یعنی تمام مجرمان و تمام مشرکان گرفتار عذاب شدند لقد كان في قصصهم عبره لاولل الباب الله می در داستان های این انبیا و در داستان های این امت های گذشته عبرت است درس است این داستان ها واقعا می به عنوان داستان نخانیم به عنوان درس بخوانیم عبرت و درس هست برای عقلمندان حالا چند تا درس ما مذاکره بکنیم از همین داستان یوسف معلوم میشه که عزت و زلت به دست الله است به دست بندگان خدا نیست اللہ تعالی وقتی که بخواد عزت بده هر چی که اسباب زلت را اختیار بکنی اونا ببر به عنوان یک برده بفروش اونا ببر تو چاه بینداز خدا عزتش میده پس عزت و زلت بدسته الله هست دوم انسانی که حسد داشته باشه حسود درونش میسوزه حسود هر اقدام نامشاروی بکنه ضربه را خودش میکره رسوایی فردا برای خودش است سوم بهترین چیز برای یک انسان پاکی و افت است انسان وقتی که با پاکی زندگی کند با افت زندگی بکند. الله عز و جل این انسان را می درخشاند این انسان گرچه چار روزی برای شاید مشکلات هم بیاید ولی این انسان نتیجه تن میدرخ دیگه از این داستان این نتیجه رو گرفتیم درسای اعتقادی و ایمانی گرفتیم که اون ذاتی که اختیارات به دستش هست مختار کل هست مدبر است متصرف است الله هست حتی انبیاء نیستند انبیاء نتوانستند مشکلات خودشون را دور کنن سالهای سال سرگردان بودند. دیگه از این داستان به این نتیجه رسیدیم که عالم الغیب فقط الله عزوجل از این انبیا در آینده نمی دانستن یعقوب علیه و سلام جغد یوسف را دوست دارد نمی آینده چی میشه. و الا یک قدم نمی گذاشت یوسف با اونها بره همچنین گذاشت بنیامین بره گذاشت یوسف دو اون چا، اون چند شب بمانه لذا غیب را هم فقط الله از عزوجل میداند و در دیگر یکی از دست های که برجسته‌تر است خود قرآن فرمود انه من یتق و یصبر فان الله لا یضيع اجر المحسنين که ای مؤمنان از این داستان یوسف یاد بگیرید که هر کسی که خدا ترس باشد در زندگی خودش و هر کسی که در زندگی خودش صبور باشد استقامت داشته باشد خداوند عزیز و جل عجر چرین نیکوکاران و مخلصین رضایه نمی گرداند یه روز نتیجه را می گیرن. لذا اللہ می این داستان عبرت بود درس بود اما درس برای عاقل لعول الالباب نه که سطحی نگر هستند و نه کسانی که نظری اونها فقط از کنم به خود داستان سطحی از ما کان حدیث یفترا در آخر فضیلت قرآن ببین این تمام مطالب زیبا از قرآن به قرآن بچسب قرآن سخن افترایی نیست سخن ساخت ای نیست سخنی که خود رسول الله اون رب سازد درست کنت نیست بلکه قرآن کلام خداست برای حقانیت قرآن الله تعالى اینجا پنج نکته بیان فرموده پنج وصف یک ولی تصدیق الذي بین يدي قرآن کتابی هست که تصدیق کننده اون کتابی هست که قبل از قرآن است یعنی من التورات والانجیل ببینید مطالب قرآن با مطالب اونها چقدر هم خانی دارد به توحید، به رسالات، به قیامت، به آنچه که اونها راهنمایی میکنن قرآن همون تایید میکنه و دیگه و تفصیل کل شی نسبت به اونها یک ویژگی دارد که تمام مسائل و حلال و حرام را مفصلا قرآن با توضیح و وضاحت کامل بیان کرده. این وصف دوم قرآن هست و هدن و هدایت هست قرآن مجید سوم هدایت هست یعنی اگر کسی میخواهد راه هدایت را راه هدایت را بگیرد راه درست را بگیرد قرآن هدایت هست کسی میخواهد اون راهی که با خدا میرسد همی قرآن و چارم و رحمتان و رحمت هست یعنی وقتی که با عمل کدی عملن برتون رحمت نازل میشه لقامی یؤمنون برای قومی که ایمان میآورند. اولی ماکان حدیثاً یفترا بود اولین وصفش که از اونجا باید شروع می کردیم ماکان حدیثاً یفترا یعنی این سخنی که افترا بشه نیست یک سخنی حق است کلام حق است کلام رب العالمین است